من فرد تنبلی هستم و به تنبل بودن خود اعتراف می کنم. این موضوع است که سالها مانع از موفقیت من در زندگی شده بود. هر هرچه باشد برای رسیدن به موفقیت باید به شدت و سخت کار کرد. آیا اینطور نیست؟ این همان مطلبی بود که در واقع به من گفته می شد و من هم با آن معتقد بودم. در اینجا به چند مورد از آنچه که اصول اخلاقی کار نامیده می شود اشاره می کنم. کار کردن خوب است. آیا اینطور نیست؟ کار کردن برای پرورش روح انسان مفید است. کار کردن موجب شکلگیری شخصیت فرد می شود و بالاخره این که کار سخت به موفقیت فرد در زندگی کمک می کند. همه اینها درست است. اما اگر راستش را بخواهید با قبول این موضوع که کار سخت موجب موفق شدن فرد در زندگی می شود مشکل داشتم. زیرا دوست نداشتم آنقدر سخت کار کنم. اگر از من میخواستند بین دو گزینه که اولی عبارت از روزی است که باید ساعت زنگدار را هنگام شب تنظیم کنم و صبح زود از خواب بیدار شوم و دوش بگیرم و صورت خود را اصلاح کنم و به سر کار بروم. و دومی عبارت از روزی است که در آن میتوانم تا هر وقت که بخواهم در رختخواب خود دراز کشیده و سپس هر کاری که دلم خواست انجام دهم یکی را انتخاب کنم، همواره گزینه دوم را انتخاب می‌کردم من هرگز شخصی نبودم که عادت داشته باشم صبح زود بیدار شوم. معمولا سه یا چهار ساعت طول می کشد تا خود را آماده رفتن به سر کار کنم و اگر راستش را بخواهید بعضی روزها هرگز آماده رفتن به سر کار نمی بعضی روزها هم آماده سازی بسیار مختصری انجام می دهم. رفتار من از بچگی این گونه بوده است. مردم به من گفتند که نگاهی به کتاب هایی که تعلیف کرده اید و آثار موسیقی که ضبط کرده اید بیاندازید شما یک شرکت انتشاراتی را نیز اداره می امکان ندارد که شما تنبل بوده و در عین حال همه این کارها را انجام داده باشید. من در پاسخ می گویم که بله، امکان دارد. تنها عاملی که برای نوشتن یک کتاب یا ضبط یک اثر موسیقی یا اداره یک شرکت انتشاراتی لازم است، سرسختی و جدیت در کار می باشد. ممکن است شما تنبل باشید، در این حال سرسخت نیز باشید و وقتی که چگونگی انجام این کار را یاد بگیرید، می توانید به میزان بالایی از موفقیت دست پیدا کنید. تنبل بودن لزوماً به معنای آشفته و گیج بودن، بی میل و بدون انگیزه بودن و توفیق نیافتن نیست. کاملا ممکن است، در واقع به شکل نسبتا سادهی ممکن است که شما تنبل باشید و با این حال بر روی هدفی تمرکز کنید و برای حرکت به سمت هدف خود و تحقق بخشیدن به آرزوی خود، هر کاری را که لازم است به صورت گام به گام و با حالت تنبلی و بیحالی خود انجام دهید. برای بسیاری از مردم واژه تنبل بر کلیه معانی زمینی منفی دلالت میکند به طوری که اگر شما فرد تنبلی باشید شما را به عنوان فردی خواهند شناخت که در انجام کارها تعلل می برزد. یا هرگز قبل از دیگران شروع به انجام کاری نمیکند یا اگر همین کار را کند زود دست از کار میکشد بیشتر مردم معتقدند که رسیدن به موفقیت در عین تنبل بودن امکان پذیر نیست بالاخره هرچه باشد، نمونه های بسیار کمی از افراد موفق و تنبل در جهان یافت می شوند. اینطور به نظر می رسد که بیشتر افراد موفق، انرژی ای داشته و از جمله افراد دارای نوع شخصیتی الف معتاد به کار بودند. شما برای موفق شدن، باید همواره به سختی کار کنید. این یک باور عمیق و است که در جامعه ما رواج یافته است، من تصمیم گرفتم این باور را به چالش کشیده و ببینم آیا ممکن است با آسودگی خاطر نیز موفقیت آفرید یا خیر. در حدود سی سال پیش تصمیم گرفتم این مسئله را مورد آزمایش قرار دهم. ده من تصمیم گرفتم تلاش کنم و موفق شوم البته با تعریف موفقیت بر اساس میارهای خودم و این موفقیت را با شیوه توأم با تنبلی خودم کسب کنم. منظورم از این شیوه این است که صبحها و روزهای شنبه سر کار نروم و فرصت رفتن به تعطیلات تابستانی را هرگز از دست ندهم. آنچرا که می‌خواستم آزمایش کنم در واقع این بود که آیا می‌توان تلاش کرد و آرزوهای خیش را زنده نگه داشت و در این حال در راحتی و آسودگی خاطر زندگی کرد یا خیر. به محض انجام این آزمایش به مطلب مهمی پی بردم. پس از اینکه به خودم اجازه می‌دادم برای مدت زمان قابل توجهی تنبل و بیکار باشم حداقل برای لحظه هم که شده احساس میکردم فعال و پر انرژی شدم. در طی این زمان ها عجیب است که بدانید چه مقدار کار را می توان در مدت زمان نسبتاً کوتاهی انجام داد. من بیشتر روزها به هیچ وجه مطلب نمی نویسم. بعضی روزها به مدت پانزده دقیقه می نویسم و در برخی دیگر عملا چند ساعت را به نوشتن اختصاص می دهم. شما اگر بتوانید هر یک روز در میان به طور متوسط یک صفحه مطلب بنویسید در عرض یک سال یک کتاب 180 صفحه‌ای تعلیف خواهید نمود. نوشتن جدیدترین کتاب من با عنوان سیر زندگی یک میلیونر برنامه رؤیایی برای آفرینش دنیای آرزوهای شما سه سال طول کشید. من در این کتاب هر را که میدانستم و در طی مسیر زندگی خود آموخته بودم اهم از هر آنچه که در این مسیر زندگی من را از وضعیت فقر به وضعیت وفور نعمت و مهمتر از آن، از وضعیت ناکامی و مبارزه به سطح نسبتاً چشمگیری از راحتی و لذت، آنچه را که در جوانی تصور آن را هم نمی کردم، تغییر داد، آوردم. اما شما احتمالاً آن کتاب را نخونده اید، آیا اینطور نیست؟ تعداد افرادی که نزد من آمده و گفتند که من کتاب شما را خریده و آن را نزدیک تختخواب خود قرار دادم، اما هنوز شروع به خواندن آن نکرده ام، به قدری زیاد بوده که نمیتوانم تعداد آنها را به شما بگویم. حتی بودند افرادی که به من گفتند جای تعجب دارد شما یک کتاب 300 صفحه‌ای تالیف کرده ای. کتابی با این حجم در کل راجع به چیست؟ به عبارت دیگر آنها میخواهند به ما بگویند که هرگز یک کتاب 300 صفحه‌ای را در عمل نخواندند و اینکه خواهان دریافت پیام اصلی کتاب به شکلی مختصرتری باشند. تقریبا همه ما میخواهیم موفق شویم اما اگر راستش را بخواهید بیشتر ما نمیخواهیم با سختی و جدیت کار کنیم در همین رابطه در کتابی که برای شما تعلیف کردم، به شما نشان خواهم داد که چگونه میتوانید برخی تغییرات مسلم و مفید را به شکل ساده و راحت و از راه سالم و سازنده در زندگی خود ایجاد کنید. شما حتی اگر تنبل هم نباشید میتوانید از این کتاب کوچک بحری فراوانی ببرید. ابزارهای ساده این کتاب برای هر شخصی مفید هستند. و اگر شما فرد تنبلی باشید میتوان گفت که به طور قطع کتاب مناسبی را انتخاب کرده‌اید. من تا جایی که می توانستم مطالب این کتاب را برای شما به شکلی ساده بیان کردم. من یک دوست و همکار به نام رابی دارم. او خود را یک معتاد بکار دارای نوع شخصیتی الف که در حال بهبود است میداند. او از من خواست این جمله را به مقدمه کتاب خود اضافه کنم که این کتاب تنها مخصوص افراد تنبل نیست. این کتاب مخصوص هر کسی است که می خواهد موفق شود و در این حال این موفقیت را به شیوه منحصر به فرد خود همراه با تنبلی کسب کند. به گفته وی دو گروه خواستار خواندن کتاب من می باشند. گروه اول افراد تنبلی مانند من هستند و گروه دوم افراد دارای تیپ شخصیتی علف مانند همکارم هستند که در تمام طول عمر خود سخت کار کردند و اکنون ترجیح می دهند که کمی بیشتر استراحت کنند و از شر استرس و کار مداوم خلاص شوند. ابزارهای ساده این کتاب برای هر فردی که آنها را کار گیرد موثر واقع می شوند. در اینجا داستان کوتاهی را برایتان تعریف می کنم که در رابطه با یکی از روزهای عمر من است با تعریف این داستان کمی از بحث اصلی منحرف می شویم چند وقت پیش برای جمع پرسر و صدا و مشتاقی که بیشتر آنها را نوجوانان تشکیل می سخنرانی سخندرانی می کردم من از حضور در جمع آنها بسیار لذت بردم قبل از من یک سخنران با انگیزه شروع به سخنرانی کرد که انرژی ای داشت و در حین صحبت پاهای خود را مدام به بالا برده و به زمین می‌کوبید. بالاخره وقتی که نوبت سخنرانی من رسید، چیزی شبیه این سخنان را بیان کردم. من با هر چه که سخنران قبل از من گفت و خصوصاً با تاکید ایشان بر اهمیت اهداف و تدوین اهداف چالش برانگیز و انجام آنچه که فرد را به هیجان دارد کاملاً موافقم. من تک تک لغات سخندرانی ایشان را میپذیرم با این حال مطلبی برای اضافه کردن به این سخنان دارم که شاید حدیه منحصر به فرد من به جهانیان باشد و آن عبارت است از این که شما میتوانید به شکلی ساده و راحت موفق شوید برای رسیدن به موفقیت لازم نیست که شما از جمله افراد دارای تیپ شخصیتی معتاد به کار الف باشید در واقع من فرد تنبلی هستم توکنون هیچکس مرا یک فرد معتاد به کار دارای تیپ شخصیتی الف نخوانده است. من بیشتر دارای تیپ شخصیتی یه بودم. ناگهان دختر جوانی دست خود را بالا برد و با صدای بلند گفت: آیا شما واقعا تنبل هستید؟ من گفتم که بله، من فرد تنبلی هستم و به تنبل بودن خود افتخار می کنم. شخص دیگری فریاد زد: امروز چه کارهای انجام داده اید؟ تا کنون کسی چنین سؤالی را از من نکرده بود. من مجبور بودم برای لحظه‌ای هم که شده راجع به آنچه در روز انجام داده بودم فکر کنم. من علاوه بر تنبل و شلخته بودن، حافظه‌ام نیز ضعیف است. هرگز از من انتظار نداشته باشید که نام شما یا هر فرد دیگری را به خاطر بسپرم. فقط گاهی اوقات در هنگام عصر لحظه ای را صرف به یاد آوردن آنچه در کل روز انجام داده ام می‌کنم. من گفتم که بسیار خوب، اکنون به شما می‌گویم. امروز شنبه است، لذا امروز را مرخصی گرفتم. من همیشه شنبه‌ها را مرخصی می‌گیرم. من شنبه‌ها را صرف رسیدگی به خودم می‌کنم. این در حالی است که جمعه‌ها را صرف رسیدگی به امور خانواده و استراحت می‌کنم. و در آن روزها هیچ نوع کاری انجام نمی‌دهم. روز شنبه روزی است که می‌توانم آن را متعلق به خودم بدانم و برگشت به عقب مختصری را برای رسیدگی به امور شخصی خود انجام دهم. من امروز تا حدود ساعت 11 خواب بودم. سپس در حال استراحت تا حدود ساعت یازده و سی دقیقه در رخت خواب خیش به پشت دراز کشیدم. بعد از تختخواب خود برخواسته و مقداری قهوه صرف کردم. و دقیقاً به خاطر نمیآورم که چند ساعت بعد مشغول چه کاری بودم. فکر میکنم کمی کاغذ های خود را و رو کردم یا شاید موجودی سهام خود را در اینترنت بازبینی کردم. در ساعت دو بعد از ظهر یا حدود این ساعت دوباره به رخت خواب رفته به پشت خود دراز کشیده و نرمش آرامش بخشی را تجربه کردم این تمرین منجر به مراقبه یا خواب آرام من شد که هرگز مطمئن نیستم منجر به کدام یکی از این دو مورد شد خانواده من ادعا می کنند که در حین دوره مراقبه صدای خراپاف من را می شنیدند سپس دوش گرفتم و زود خانه را ترک کردم تا با اتومبیل به این شهر برسم به گونه ای که بتوانم به مدت یک ساعت یا حدود یک ساعت در کافی شاب یک کتاب فروشی گزیده و قبل از اینکه مجبور شوم این سخنرانی مختصر را ارائه دهم کمی استراحت کنم. امروز را این گونه آنچه آن گفته شد نحوه سپری کردن یک روز شنبه ی نوعی من است جز اینکه من در روزهای شنبه تقریبا هرگز خود را درگیر صحبت کردن نمی کنم. من در روزهای شنبه و همچنین هنگام صبح کار نمی کنم. من معمولاً حدود سی ساعت در هفته را صرف کار کردن در دفتر خود می کنم. زمان کار کردن من از بعد از ظهر یکشنبه شروع می شود من همچنین حدود سی ساعت در هفته را صرف رسیدگی به امور خانوادم کرده و حدود سی ساعت در هفته را صرف رسیدگی به خودم می کنم آنچه گفته شد برنامه زمان بندی است که نتیجه خوبی برای من داشته است نوجوانان دبیرستانی فکر کردند حرفهای من خنده دار است و شاید تنها تعداد کمی از آنها تحت تاثیر این طرح یا امکان قرار گرفتند که برای موفق شدن لازم نیست 60 تا 80 ساعت در هفته روی موضوعی کار کرد. شاید تنها تعدادی از آنها به آنچه از نظر من یک حقیقت است پی بردند. این حقیقت به این شرح است. اگر من توانستم به روش همراه با تنبلی خیش از وضعیت فقر به وضعیت موفقیت رضایت بخش برسم، شما نیز می توانید به روش خودتان و در حالی که تنبل هستید موفق شوید. من هیچ نوع ابزار خاص یا جادویی ندارم که شما نداشته باشید. همه ما دارای قوه تعقل مشابهی هستیم. همه ما دارای قابلیت پردازی و تخیل بوده و همه ما تردیدها و هراس را تجربه کرده ایم. هیچ تفاوت فیزیکی بین یک فرد موفق و یک فرد فقیر وجود ندارد. با این حال طرز تفکر این دو گروه با یکدیگر فرق می کند. افراد موفق یاد گرفتند که چگونه ذهن خلاق و قوه تخیل خود را بر روی هدفی متمرکز کنند و سپس گم های آشکار بعدی پیش روی خود را بردارند. آنچه گفته شد: راز بزرگی نیست. موضوعی با عنوان رازهای موفقیت وجود ندارد. هر شخص موفقی را که من می شناسم علاوه بر اینکه عاشق صحبت کردن درباره موفقیت های خویش است تمایل دارد که در مورد شکست های خود نیز صحبت کند. ما دوست داریم به مردم کمک کنیم، اما تنها مشکلی که در این خصوص وجود دارد این است که گفته های ما ممکن است شبیه اسرار کلی مذهبی مانند اسرار آین زن بوداییان به نظر برسد یا بدتر از آن شبیه آنچه که میلیون بار شنیده ایم و برای ما به صورت قالب درامده است تلقی شود ممکن است ساده به نظر رسیده و یا اینکه که با آنچه که به اعتقاد ما درست است در تضاد باشد به عنوان مثال عبارت به جای سخت‌تر کار کردن تر کار کنید یک قالب تلقی می‌شود با این حال بسیاری از این عبارتهای به جای مانده از گذشته که بارها و بارها شنیدیم حاوی کلیدهای بسیار پر پرارزشی برای موفق شدن میباشند به جای سخت‌تر کار کردن تر کار کردن واقعا راه حلی بزرگ و حتی ضروری برای موفق شدن است همه ما این موضوع را شنیدیم با این حال چند نفر از ما واقعاً با آن عمل می‌کنیم بیشتر ما به قدری سخت مشغول کار کردن میشویم که زمانی برای هوشمندانه کار کردن پیدا نمی کنیم. با این حال، هوشمندانه کار کردن آنقدرها هم زمان زیادی نمیبرد. فقط کافی است که اهداف روشنی را ترسیم کنید و سپس طر‌های شفافی را برای رسیدن به آن اهداف طراحی کنید. این کار تنها مستلزم برخورداری از قدرت تخیل که همه ما داریم و سرسختی است که یا هماکنون در ما وجود داشته یا میتوانیم آن را در خود پرورش دهیم. من پیش از این گفته بودم و دوباره نیز میگویم گویم که همه ما کلیه ابزارهای مورد نیاز را برای موفق شدن در زندگی دارا هستیم. با این تفاوت که افراد موفق ذهن خلاق خود را در جهت درست متمرکز می کنند. از کجا معلوم که آنچه گفتم درست است؟ در اینجا داستان کوتاهی را که داستان روزی است که زندگی من را تغییر داد برایتان تعریف می کنم. چگونه یک فرد تنبل نامان فقیر تبدیل به فرد تنبل نامان میلیونر شد روز تولد سی سالگی هم بود که با هولوتکان تکان از خواب بیدار شدم آن روز برای اولین بار به این موضوع پی بردم که دیگر یک بچه نیستم من دیگر سی ساله شده بودم بیشتر آن روز را صرف قدم زدم به جلو عقب در منزل کوچک و ارزان قیمت واقع در محلی فقیر نشین خود کردم و در همان حال درباره زندگی خود فکر میکردم کاری که در گذشته بسیار به ندرت انجام داده بودم. در آن زمان حتی فهمیدم که یک نقطه قوت بزرگ دارم، نقطه قوتی که با آن زایده شدم. اکنون میبینم که هر شخصی با نوعی هدیه منحصر به فرد به دنیا می آید. آنچه که خدمتگزاری بزرگ آن را در طی سالها با قلب و روح خود درک کردم، نقطه قوتی است که یادگرفتن آن برای بسیاری از افراد سالیان سال طول می کشد و برخی افراد هرگز آن را یاد نمیگیرند و اون نقطه قوت عبارت است از اینکه من به این مسئله پی برده بودم که چقدر مهم است کاری را انجام دهم که آشقش هستم. من میدانستم که اگر به هر نحوی که شده به دنبال آرزوهای خود بروم کلیه اسباب و لوازم برآورده شدن آنها نیز به هر نحوی که شده جور خواهد شد. هرگز نمیتوانستم بفهمم که چرا بسیاری از دوستان من سخنان من را درک نمیکردند و به انجام کارها و شیوههایی از زندگی که واقعا از آنها لذت نمی بردند راضی می شدند. من از بچگی میخواستم هنرپیشه و موسیقیدان شوم. بنابراین در دبیرستان در زمینه موسیقی به مطالعه پرداخته و وارد حرفه تئاتر شدم. در دبیرستان عضو دسته موسیقی راک نیز بودم و پس از دوره دبیرستان در دانشگاه در رشته تئاتر درس خواندم. پدرم از من میخواست که در زمینه بازرگانی درس بخوانم اما من در آن زمان هیچ علاقه‌ای به بازرگانی نداشتم پس از گذراندن دوره دانشگاه شغلی را در زمینه اجرا و نوشتن آثار موسیقی برای یک شرکت نمایش تئاتر پیدا کردم این کار برای مدت یک سال یا بیشتر و قبل از اینکه شرکت فروپاشیده شود کاری بزرگی به حساب می‌آمد پس از این کار برای مراقبه نفس به دنبال دوست خود به مرکز زن در هاوایی رفته و حدود شش ماه در آن مرکز اقامت کردم تا اینکه به دلیل قانون شکنی از آنجا اخراج شدم یکی از قوانین آنجا این بود که باید در ساعت پنج و سی دقیقه صبح از خواب بیدار می شدیم. در این مرکز به مدت شش روز از هفته مقررات شدیدی حاکم بود و من با این موضوع مشکل داشتم من تجرب می می‌کنم که چگونه توانستم تا این مدت در این مرکز دوام بیاورم پس از اخراج از آن مرکز من و دوستم به کشور خود بازگشتیم و این سفر مدت زمان خیلی زیادی طول نکشید. پس از این سفر سالهای زیادی در حوالی مرکز تأمین غذای معنوی شهر برکلی در کالیفرنیا سرگردان بودم. سرانجام عضو دسته موسیقی راک شدم. پس از گذشت چند سال این دسته موسیقی منحل شد. سپس ماههای زیادی گذشت. و اکنون به سختی میتوانم توانم به بیاورم که کل این زمان را چگونه گذراندم. تا اینکه سی ساله شدم تا قبل از سی سالگی آنچه دوست داشتم انجام دهم را انجام داده بودم با این حال برای پرداخت اجاره منزل مدام در حال تلاش و تکو بودم و نمیخواستم در این وضعیت قرار بگیرم من خواهان زندگی پر از تلاش و استرس نبودم در آن روز پی به موضوعی بردم که قبلا هرگز نسبت به آن آگاهی کامل نداشتم در آن روز متوجه شدم که هیچ گونه خط سیری در زندگی خود ندارم و از گذشته تا کنون هیچگاه در حال تعیین مسیر یا هدایت کشتی زندگی خود نبوده و هیچ هدفی نداشتم تعجبی نداشت که تا آن زمان به سمت هیچ هدفی حرکت نکرده بودم بیکار مانده بودم. هیچکنه پسدازی در جایی نداشتم از حمایت خانواده بی بهره مانده بودم و برای درآوردن 65 دلار در ماه بابت کرایه منزل مجبور بودم صفه کنم به عبارت دیگر تا به آن روز من در وضعیت فقر به سر می بردم. من در آن روز سؤالی را برای خود مطرح کردم که قبلا به ندرت پرسیده بودم آن سؤال ساده و مهم این بود که با بقیه عمر خود میخواهم چه کار کنم من در حالی که قدم زنان از پله ها بالا و پایین میرفتم یک لحظه در خصوص این موضوع فکر کردم من حتی نمیدانستم از کجا باید شروع کنم امکانات و گذینه های بسیار زیادی در پیش روی من قرار داشت تا اینکه به یاد بازی کوچکی افتادم که یک بار در اوایل بیست سالگی در حین تجربه چند روزه برگشت به وطن با دوستانم انجام دادم. ما یک شب دور آتش نشسته بودیم و یک زوج به ما پیشنهاد دادند. بیایید بازی کوچکی را انجام دهیم که سابقا در اردوگاه کلیسا انجام میدادیم. بیایید تصور کنیم که از حالا پنج سال گذشته است و دوران همه چیزهای قدیمی تمام شده است. به نظر شما زندگی هر یک از ما در آن زمان چگونه به نظر خواهد رسید من برای اولین باری که این بازی را انجام می‌دادم، نمیدانم در پاسخ به این سؤال چه پاسخی دادم بنابراین بدیهی است که این بازی تأثیری بر روی زندگی من نگذاشت با این حال روزی که سی ساله شدم به یاد آن بازی افتادم و آن بازی زندگی مرا تغییر داد من بازی ساده‌ای را انجام دادم چشمانداز آرمانی خود را برای پنج سال آینده تصور کردم. این بازی کوچک به من یاد داد که چگونه تخیل کنم، چگونه تصور کنم و چگونه خلق کنم. من در آن روز خط سیر خود در زندگیم را به گونه‌ای که قبلا هرگز انجام نداده بودم، ترحریزی نمودم. ساز و کار واقعی انجام این کار کاملا ساده بود. برای این منظور، چشمنداز آرمانی خود را رو رو روی یک صفحه کاغذ نوشتم. سپس، کلیه هدفهایی را که میتوانستم در موردشان فکر کنم، روی صفحه کاغذ دیگری فهرست کردم سپس هر یک از آن اهداف را به صورت یک عبارت تأکیدی بازنویسی کردم با گذشت زمان و پس از چند ماه طرحهایی از دل هر یک از اهداف اصلی بیرون کشیده شد و به تدریج گام های بعدی که باید برمی داشتم مشخص شدند البته به محض اینکه که شهامت پیدا کردم راجع به آرمانی خود و نوشتن اولین هدف خود فکر کنم تردیدها و هراس‌های وجودم را فرا گرفت و دوچار دست پاچگی شدم مدیریت آن تردیدها و هراس‌ها تبدیل به مهمترین کاری شد که تا کنون انجام داده بودم من برای رسیدن به اولین هدف اصلی خود اداره یک شرکت موفق که از خودم و دیگران حمایت کند پنج سال به طور مداوم به اصلاح مسیر خود پرداختم همچنین تحقق کامل چشمنداز آرمانی من که یکی از آنها عبارت از مالکیت یک منزل جادار و بی سر و صدا در کالیفرنیا شمالی و در یکی از زیباترین مکان‌های بود که تا کنون در زمین دیدم حدود ده سال طول کشید. من در روزی که سی سال شدم کار در شرکت انتشاراتی خود را شروع کردم. در سن سی و پنج سالگی از لحاظ مالی به درجه پایینی رسیدم. شرکت من تقریباً ورشکسته شده بود و من شخصاً تا سقف 65000 هزار دلار زیر باره بدهی کارت اعتباری خود قرار داشتم. این رقم به اوایل دهه 80 مربوط می شود ولی این رقم به دلار امروز مبلغ قابل توجهی می شود. جاده من به سوی موفقیت، جاده ناهموار و منند مسیر بازی هیجان ترن هوایی پرپیچ و خم بود. و من به پایین ترین درجه از آنچه چه که به اصطلاح جایگاه شغلی خود نامیده می شود رسیده بودم. سپس سه اتفاق تقریباً به طور همزمان روی داد که به سرعت شرکت ما را تکان داد و موجب رونق آن شد. شرکت ما سوداور شد و من به طرز نسبتاً شگفتانگیزی به مالک بدون بدهی یک سرمایه گذاری خوب ترازبندی شده تبدیل شدم. یک من راهی را برای مدیریت حداقل برخی از تردیدها و های خود پیدا کردم. من به تنهایی و گاهی همراه با دیگران در جلسات متعددی با عنوان آنچه که ما فرایند باور درونی می نامیم شرکت کردم. این فرایند تنها شامل یک دسته سوالات می شود که باید به صادقانه ترین شکل ممکن به آنها پاسخ داد. این موضوع را در فصل سوم مورد بررسی قرار خواهیم داد. انجام این فرایند مرا به سوی درک این موضوع سوق داد. که من یک باور عمیق و درونی دارم و آن هم این است که بر مال خود کنترل نداشتم و مانند یک فرد پولدار ولی احمق بودم سپس این فرایند مرا به کشف یک عبارت تأکیدی قوی سوق داد که عبارت بود از اینکه من فردی منطقی هستم و بر اموال خود مسلط می باشم من در حال خلق موفقیت کلی به شکل ساده و راحت و از راه سالم و سازنده هستم من به تکرار این عبارت تاکیدی ادامه داده و شهده تأثیر قوی آن بر زندگیم بودم دو. من راجع به کنترل های مالی مطالبی را آموختم و فهمیدم که وجود آنها برای موفقیت ضروری است در فصل پنجم وارد این بحث خواهیم شد در واقع منظور از کنترل مالی این است که شرایط را طوری تنظیم کنید که بیش از آنچه مصرف می کنید درآمد داشته باشید این موضوع در آن زمان برای من تازگی داشت سه. من جمله را شنیدم که انگیزه لازم برای ایجاد تغییر اساسی در زندگیم را فراهم کرد یک جمله ساده میتواند فکر شما را متحول کند و مسیر افکار و مسیر زندگیتان را تغییر دهد. زمانی که در وضعیت فقر مالی به سر میبردم و غرق مشکلات کاری خود شده بودم چند کلمه الهام بخش را در رادیو شنیدم که وجودم را پر از نوع عجیبی از شور و هیجان کرد و در نهایت مسیر افکار مرا تغییر داد. نشنیدم که چه کسی این کلام را گفته یا نوشته است. بعدن شخصی به من گفت که اینها کلام ناپل اونهیل در کتاب فکر کنید و من شوید است. کلام وی این بود: در دل هر سختی منفعت برابر یا بیشتری نهفته است. من این کلام وی را به حروف بزرگ یادداشت کرده و آن را کنار تلفن ادارم قرار دادم سپس این جمله را به آن افزودم در دل هر مشکلی فرصتی نفته است و بعداً نقل قولی را از بهاجواد گیتا نیز به آن اضافه کردم نص روحانی به جا از از 5000 سال پیش در کشور هند که با کمال شگفتی نشان میدهد که مطلب جدیدی در هیچ از این گفته ها وجود ندارد کلام نقل شده چنین بود حتی در بدبیاری‌های زندگی می توان هدایای بزرگی را پیدا کرد به دنبال مواجهه پی در پی با مشکلات در طول دوری از زندگی خود که سرشار از مبارزه و ناامیدی بود، شروع کردم به طرح این سوال از خود. در دل هر مشکل چه منافع، چه فرصتها و چه هدایایی ممکن است وجود داشته باشد؟ و من مورد عجیبی را کشف کردم که عبارت بود از وقتی که شما سوالات درستی را برای خود مطرح می‌کنید، پاسخ‌های مناسبی دریافت خواهید کرد. پاسخ‌ها از درون خود شما و نه شخص دیگری نشأت می‌گیرند. تنها با طرح سوالات درست شما میتوانید بخش تفکر خلاقانه ذهن خود را که عاشق پیدا کردن راه حل برای معماها و مشکلات حتی گیج کننده ترین آنها است، باز و فعال نگه دارید. وقتی که سوالات درستی را مطرح می‌کنید، پاسخ‌ها ساده و آشکار می‌شوند و این پاسخ‌ها برای شما کاملا مناسب و بجا باشند، زیرا از ذهن خلاق خودتان نشعت می‌گیرند. آنچه اکنون بیان می‌شود تفکر ریشهدار و عمیقی است که طرز فکر و زندگیم را تغییر داد. در دل هر سختی منفعت برابر یا بیشتری نهفته است. در دل هر مشکلی فرصتی نهفته است. حتی در های زندگی می‌توان هدایای بزرگی را پیدا کرد. البته ما اقرار می‌کنیم که مشکلات وجود دارند. ما نمی‌توانیم به طور قطع منکر وجود مشکلات در زندگی خود شویم. امان وقت همیشه خوب است از خودمان بپرسیم در این وضعیت ایجاد شده چه منافع چه فرصت ها و چه هدایایی ممکن است نصیبمان شود آیا منظورم را متوجه می شوید؟ شما می توانید تنها با طرح این سوال دریچه ذهن خود را به روی جدید و قابل گسترش بگوشایید. به محض اینکه شروع به جستجوی فرصت ها منفعت ها و هدایای نهفته در هر وضعیت معلومی می کنید آنها را به تدریج در خواهید یافت فرصت ها همه جا هستند. این فقط ما هستیم که معمولا به خصوص هنگام مواجه شدن با مشکلات حتی یک بار از خودمان نمیپرسیم که چه فرصت هایی ممکن است درست در مقابل ما وجود داشته باشند. فرصت ها همه جا هستند. به محض اینکه شروع به جستجوی آنها کنیم آنها را مشاهده خواهیم کرد. درست در همین لحظه از چه فرصتهایی میتوانید بهره ببرید. تنها خود شما پاسخ این سوال را میدانید. زیرا پاسخها در قلب و ذهن شما وجود دارند و منتظرند که آنها را پیدا کنید. تمام آنچه که برای این منظور لازم است انجام دهید، پرسش میباشد. بخش یک چهار گام ساده برای موفق شدن همراه با آسودگی اولین گام ضروری پیدا کردن جرأت خیال پردازی می باشد. همه چیز با یک خیال شروع می شود. مسلم است که غیر از این نمیتواند باشد. در حالی که یک خیال بسیار بی اهمیت به نظر میرسد، باید بگویم که زندگی و شغل ما بر پایه تخیلات بنا شده است. حتی جهانی که در آن زندگی می کنیم نیز بر پایی تخیلات استوار است. چنانکه جیمز آلن در کتاب کوچک ولی مهم خود به نام آنطور که شما فکر میکنید اظهار داشته است خیال پردازان نجات دهندگان جهان هستند البته موضوع فقط این نیست که آنها در وهله نخست با استفاده از قوه تخیل خود موجب ساختن چیز جدیدی در جهان میشوند بلکه هر آنچه که خلق شده در آغاز یک خیال یا یک طرح زودگذر در ذهن کسی بوده که شجاعانه امکانات جدید و گسترش یافته را در ذهن خود در نظر گرفته است وقتی که چشمنداز آرمانی خود را می نوشتم، بدون اینکه حتی خودم نسبت به این قضیه آگاه باشم به خیالپرداز درونی خود اجازه می دادم که اوج بگیرد چشمنداز آرمانی خود را یادداشت کنید گام اول ساده است یک برگه کاغذ سفید بردارید یا برنامه قدیمی پردازشگر لغات را باز کنید و در بالای صفحه عبارت چشمنداز آرمانی را بنویسید حال فرض کنید که 5 سال از امروز گذشته و این چشمانداز و بسیاری از امور دیگر در زندگیتان به قدری برای شما الهامبخش بخش بودند که به طرز سهرامیزی به همون خوبی که میتوانستید تصور کنید پیشرفته است و شما زندگی خیالی یا همون چشمنداز آرمانی خود را خلق کرده اید. در چشمنداز آرمانی شما زندگیتان چگونه به نظر میرسد؟ در کجا زندگی میکنید؟ مشغول چه کاری هستید؟ به چه هدفهایی یافته اید؟ یک روز معمولی شما چگونه به نظر می میرسد؟ به خودتان اجازه دهید که آزادانه خیال پردازی کنید. برای یک لحظه کلیه تردیدها و حراسها و طرز تفکر واقع بینانه را کنار بگذارید. ما بعدا به این موضوع خواهیم پرداخت. اکنون اجازه دهید که روحتان بلند پروازی کند. همانطور که استفان کاوی در کتاب هفت عادت افراد بسیار موثر آورده است، با داشتن یک هدف نهایی در ذهن شروع کنید. بجنبید. انجام فعالیت‌های بعدی فقط چند دقیقه طول می‌کشد. یک بریه کاغذ سفید بردارید و در بالای آن عبارت چشمنداز آرمانی را بنویسید. حال فرض کنید که پنج سال از امروز گذشته و همه کارها به همان خوبی که می‌توانید تصور کنید پیشرفته است. در این صورت زندگی شما چگونه به نظر می‌رسد؟ مشغول چه کاری هستید؟ صاحب چه چیزهایی هستید؟ دارای چه نوع شخصیتی می‌باشید؟ وقتی که این تمرین مختصر را در روز تولد سی سالگی خود انجام می دادم، ناگهان خیالی به ذهنم خطور کرد که مرا را متحیر نمود. این خیال به واقع یک جهش بزرگ به ماورای دنیای واقعی من در آن زمان بود. من تصور کردم که مالک یک شرکت انتشاراتی موفق هستم که به آسانی اداره می شود و کتابهایی که نوشتم و آثار موسیقیی که زبط کردم را منتشر می سازد. من همچنین تصور کردم که مالک یک کاخ سفید بزرگ هستم که بر روی یک تپه و در مکان زیبا و خلوت واقع شده است. من نمی‌دانستم که چگونه این خیال را به واقعیت تبدیل کنم. نه ثروتمند بودم و نه تجربه کاری داشتم. من نمی‌دانستم که چگونه می‌توان از وضعیت فعلی یعنی فقر به وضعیت آرمانی یعنی کامیابی و موفقیت رسید. در آن زمان برخی عقاید سربسته و مبهمی را در خصوص ضرورت حتمی وجود برنامه مطرح می‌کردند اما من در ابتدای کار حتی نمی‌دانستم چگونه می‌توان تصور کرد که این برنامه ها چه باید باشند به محض اینکه جرأت تصور این, این خیال را پیدا کردم جریان بنظر پایان ناپذیری از تردیدها و حراسها به ذهنم حجوم آورد مارک خیالاتی که در سرداری خیلی خیلی زیاد هستند می‌خواهی تجارت راه تو هیچ مطلبی راجع به تجارت نمیدانی. می‌خوای چند عدد کتاب بنویسی؟ تو هرگز این کار را انجام ندادی و به اندازه کافی زرنگ نیستی. می‌خوای اثر موسیقی ضبط کنی؟ این کار مستلزم صرف تلاش و هزینه بسیار زیادی است. میخواهی ملکی را خریداری کنی؟ بدون داشتن پول چگونه میتوانی این کار را انجام دهی؟ و بالاخره این که تو اهداف خیلی زیادی داری. فقط یک هدف را انتخاب کن و روی آن تمرکز کن. با وجود چنین تردیدها و حراس هایی، افکار و خیالات خود را دوباره متوجه چشمنداز آرمانی خود کردم. بله، من در چشمنداز آرمانی خود خواستار همه چیز از انجام یک تجارت موفقیت آمیز گرفته تا داشتن وقت زیاد، هم برای انجام پروژه های مبتکرانه و هم برای خانواده و دوستان بودم. وقتی که خوب راجع به چشمنداز آرمانی خود فکر کردم، فهمیدم که نه تنها خواستار موارد فوق هستم بلکه میخواهم همه آنها را به شکلی ساده و راحت و به شیوهی سالم و سازنده به بیاورم. اما تردیدها و حراسهای من میگفتند که غیر ممکن است. در تاریخ بشریت هرگز چنین کاری صورت نگرفته است. در حالی که از پله ها بالا و پایین میرفتم برای مدتی از واکنش نشان دادن به تردیدها و حراسهای های خود بازماندم. اما پس از این قضیه به طور تصادفی به طرح بی نظیری برخوردم که من را از قید آن تردیدها و حراسها رها کرد تا همچنان به دنبال خیالهای خویش خیش بروم. به زندگی خود به عنوان یک تجربه نگاه کن. افکار من به شکل تصادفی به سمت آنچه که یک بار به بخ مینستر فولر نظریه پرداز و آینده نگر شنیده بودم منحرف شد. به من گفته شده بود که او در یک برهی زمانی از زندگی خود در سن بیست و چند سالگی به خودش گفته که قصد دارد یا خودکشی کند یا به زندگی خود به عنوان یک تجربه کاملا جدید نگاه کند. خوشبختانه او گزینه دوم را انتخاب کرد و در پایان زندگی خود قادر بود نگاهی به تجربه 50 سالی نسبتا شگفت‌انگیز و موفقیت خود داشته باشد. من به عبارت فوق تجربه پنجاه ساله تکیه کرده و به تردیدها و حراسهای خود گفتم که فقط یک یا دو سال به من وقت دهید تا این تجربه را آزمایش کنم. من یک سره به دنبال زنده کردن خیالهای خود خواهم رفت و این کار را به شیوه منحصر به فرد خود که شیوه افراد تنبل دارای تیپ شخصیتی یه است انجام خواهم داد و خواهم دید که چه اتفاقی میافتد. تردیدها و هراسهای من که در آن زمان بسیار قویتر از امیدها و خیال من به نظر می رسیدند احساس کردند که انجام این کار کاملا نامید کننده است و معلوم است که من شکست خواهم خورد. اما من به تردیدها و هراسهای خود گفتم که فقط اجازه دهید که این تجربه را آزمایش کنم و اگر شکست خوردم اوضام از آنچه اکنون هست بدتر نخواهد شد حتی تردیدها و هراسهای من قادر به مخالفت با این موضوع نبودند بنابراین می توانستم آنها را به قدری که مانع شروع تجربه خیش دنبال کردن خیالهای خود به شیوه توام با تنبلی نشوند کنار بگذارم در ظرف کمتر از یک سال با قدرت احساس کردم که در مسیر صحیحی قرار گرفتم در آغاز نشانه های اندکی که بر این مسئله دلالت کنند وجود داشت البته پیشرفت های کوچک و در این حال دلگرم کننده ای صورت گرفته بود مانند چکی که دقیقا در زمان مورد نیاز به دست فرد میرسید یا دوستی که به نحوی برای کمک رسانی به افراد پیشنهاد میداد. به این ترتیب شرکت باهستگی در زمان مناسب خود رو به جلو حرکت کرده، شروع به رشد نمود و من هم بخشی از یک کتاب را تعلیف کردم و چند اثر موسیقی را ضبط کردم. من شروع به مشاهده و سپس باور کردن این قضیه نمودم که نه تنها خلق موفقیت به شکل ساده و راحت و به شیوه سالم و سازنده امکان پذیر است، بلکه بهترین راه برای موفق شدن نیز همین میباشد. هر نوع از فشارهای روانی ما زرعی به ما کمک نمی کنند. آنها در واقع علیه ما کار می کنند. ما هرچه بیشتر استراحت کنیم، قادر خواهیم بود که هر نوع کاری را به شکل موثرتری انجام دهیم. من هیچ الگویی نداشتم که بتوانم آن را مد نظر قرار داده و از آن پیروی کنم. بنابراین به تجربه خود به عنوان تجربه جالب و ارزنده نگاه می کردم. این کتاب کوچک حاصل آن تجربه است، من از شما نمیخواهم که حرفهای من را قبول کنید یا هر چه راجع به کسی یا موردی در این کتاب آورده شده باور کنید. من تنها از شما دعوت می کنم که این چند گام ساده را صرفاً به عنوان یک تجربه امتحان کنید و ببینید که چه اتفاقی می افتد. آیا مورد برخورداری از یک زندگی راحت در چشماندوز آرمانی شما گنجانده شده است؟ اگر این چنین است، آن را در اولویت قرار دهید و این طرز فکر را در ذهنتان نگه دارید که میتوان موفق شد و همچنان زندگی راحتی داشت. از هر لحاظ که مایلید موفقیت را تعریف کنید. همین حالا و قبل از اینکه وارد قسمت‌های بعدی این کتاب شوید، شما را تشویق می‌کنم که یک برگ کاغذ بردارید و چشمندوز آرمانی خود را بر روی آن یادداشت کنید. برای این منظور جلوی بروز امیال و احساسات خود را نگرفته و خودتان را رها احساس کنید. سپس هرچه به ذهنتان خطور می‌کند را فوراً یادداشت کنید. همیشه این امکان برای شما وجود دارد که در فرصت بعدی به عقب برگردید، برخی موردها را حذف یا اضافه کنید و یا مطالبی را بازنویسی کنید. حالا فقط به روح خود اجازه دهید که اوج بگیرد. فصل دو گام دوم تصور کردن آیا چشمنداز آرمانی خود را ایجاد کرده اید؟ شما حتی اگر واقعا هم تنبل باشید، باید بدانید که این کار فقط چند دقیقه طول می کشد. اگر بخواهید میتوانید این کار را هنگام دراز کشیدن بر روی زمین یا در تخت خود انجام دهید. وقتی که من برای اولین بار در سن سی سالگی چشمانداز آرمانی خود را مینوشتم، فکر می‌کنم این کار را در مدت کمتر از 5 دقیقه انجام دادم. انجام گام بعدی نیز تنها چند دقیقه طول خواهد کشید. گام بعدی را بردارید. کار کردن تر وقت کمتری از سخت‌تر کار کردن می‌برد. یک برگ کاغذ دیگر بردارید و در بالای آن واژه اهداف را بنویسید و سپس هر هدفی را که میتوانید برای چند سال آینده در نظر بگیرید، فهرست کنید. اگر چشمنداز آرمانی خود را تا کنون نوشته باشید، متوجه خواهید شد که اهدافتان درست در محتویات چشمنداز آرمانی شما قابل بازیابی هستند. به کمک چشمنداز آرمانی متوجه میشوید که ظرف پنج سال آینده می کجا باشید. اکنون ببینید که برای رسیدن به آنجا باید به چه اهدافی دست یابید. اهداف من عبارت بودند از راه اندازی یک شرکت انتشاراتی، تأسیس یک شرکت موفق، آغاز نوشتن یک کتاب، تکمین یک کتاب موفق، شروع به ضبط یک آلبوم موسیقی کردن، ضبط یک آلبوم موفق، انجام تحقیقات برای خرید املاک و مستقلات و غیره. بسیاری از اهداف من شامل شروع کردن کار میشد. زیرا در آن زمان هدفی برای ادامه دادن نداشتم. اولین باری که این تمرین مختصر را انجام میدادم، جمعاً دوازده هدف را یادداشت کرده بودم. همکنون تعداد اهداف من به 6 عدد کاهش یافته است. به نیروی تصور خود اجازه دهید که اوج بگیرد. شما جرأت پیدا کرده اید که خیال یک زندگی آرمانی را سر بگذرانید. به نظر شما برای تحقق این زندگی آرمانی، باید به چه اهدافی دست یابید؟ همین حالا و در همین لحظه هر هدفی را که در این خصوص به نظرتان میرسد یادداشت یاد داشت کنید. یک برگه کاغذ دیگر بردارید. در بالای آن واجه اهداف را یادداشت داشت کنید و بدون دنبال آن هر هدفی را که برای چند سال آینده می توانید در نظر بگیرید فهرست کنید. برای یک لحظه به تردیدها و حراسهای خود اجازه دهید که ناپدید شوند. همانطور که قبلا گفتم بعدا راجع به آنها صحبت خواهیم کرد. اگر به شما اجازه داده می شد که هر کاری می انجام دهید هر که می باشید یا هر چه می داشته باشید چه موردهایی را انتخاب می کردید؟ زندگی ما بدون اهداف هیچ جهتگیری مشخصی نخواهد داشت؟ زندگی ما با اهداف دارای جهتگیری و مقصود می گردد اکنون که فهرست اهداف خود را تهیه کرده اید، این سؤال بسیار خوب را برای خود مطرح کنید چگونه میتوانم به این اهداف دست یابم؟ چگونه می توانم در راستای هدف خود از اینجا به آنجا برسم اکنون در موقعیت خوبی برای شروع بحث در خصوص کار بعدی هستیم که بنده در جشن تولد سی سالگی پس از نوشتن فهرست اولیه اهداف خود انجام دادم کار بعدی من این بود که یک برگ کاغذ دیگر بردارم و بر روی آن هر هدف را به صورت یک عبارت تأکیدی بنویسم واژه عبارت تأکیدی از ریشه لاتین واژه اتفرما به معنی محکم کردن گرفته شده است عبارت تأکیدی درست می تواند بسیار قوی باشد با پیدا کردن عبارت تأکیدی که در شما اثر می کند می ذهنهای خلاقتان را بر روی اهدافتان متمرکز سازید و از این لحاظ به خودی خود بر بسیاری از تردیدها و حراس هایی که به طور طبیعی به محض انتخاب یک هدف در حال توسعه ایجاد می شوند غلبه کنید هر یک از اهداف خود را به صورت یک عبارت تأکیدی یادداشت کنید عبارت های تأکیدی خود را در زمان حال و ترجیحاً با استفاده از واژه اکنون در آنها بیان کنید. مثلا نگویید که من یک کسب و کار موفق به راه خواهم انداخت یا دوری زندگی هنری پرباری خواهم داشت زیرا این واجه ها موفقیت شما را به زمان آینده واگذار کنند. عبارت تأکیدی را با اصطلاحات مربوط به زمان حال ارائه کنید. مثلا بگویید من هم در حال به راه انداختن یک کسب و کار موفق هستم. یا اینکه من همکنون در حال خلق یک دوری زندگی هنری راضی کننده و پربار می باشم عبارات تأکیدی خود را در زمان حال تنظیم کنید انگار که آنها همکنون در حال رخ دادن هستند مثلا بگویید من اکنون در حال خلق موفقیت مالی و هنری می باشم در عبارتهای تأکیدی خود واجه را پیدا کنید که بر شما اثر می گذارند. آنچه که بر یک شخص اثر می کند ممکن است برای دیگری بی اثر باشد. های تکیدی را با واژه‌های مثبت بیان کنید. به عنوان مثال، نگویید که من دیگر در فقر به سر نمیبرم. در عوض، چیزی شبیه این عبارت را بیان کنید: من فردی منطقی هستم و های خود را زیر نظر دارم. من در حال خلق موفقیت کلی مالی می باشم. تا زمانی که بهترین نحوه بیان عبارت تکیدی را از نظر خودتان پیدا نکرده اید، بکار کردن و بازی کردن با هر عبارت تکییدی ادامه دهید. شما در نهایت فهرستی از اهدافتان را خواهید داشت که به صورت عبارت های بر روی یک یا دو صفحه نوشته شدند. من همیشه سعی می کنم آنها را در یک صفحه بگنجانم. تعدادی کلمه فوقلاد قوی وجود دارد که پیشنهاد می کنم آنها را به هر عبارت تکیدی بیفضایید. من این کلمات را در کتابی با عنوان قوانین پویای کامیابی نوشته کاترین پاندر کشف کردم. قبل یا بعد از هر عبارت تأکیدی، کلمات به شکلی ساده و راحت و به شیوه سالم و سازنده را اضافه کنید و گاهی اوقات، هر جا که مناسب به نظر می رسد، کلمات را در بهترین زمان خاص خود یا به نحوی که بیشترین سود را برای همه داشته باشد اضافه کنید. این کلمات را دوباره و این بار به عنوان بخشی از عبارتهای تأکیدی خود تکرار کنید. من همکنون به شکل ساده و راحت و به شیوه سالم و سازنده در حال ایجاد وفور در زندگی خود می باشم. قبل یا بعد از هر عبارت تحکیدی کلمات قوی را اضافه کنید. به شکل ساده و راحت و به شیوهی سالم و سازنده. من در آن زمان نمی دانستم که این کلمات قوی چقدر مهم هستند. اما با گذشت سالها به این مسئله پی بردم که این کلمات بر بسیاری از تردیدها و هراس که به شکل اجتناب به دنبال اظهار یک مطلب کلی و قابل تفصیل ایجاد می شوند غلبه می کنند. تردیدها و هراسهای ما نجوا کنان میگفتند که موفق شدن به طور قطع ساده یا راحت نخواهد بود راه انداختن کسب و کار شخصی یا موفق شدن در ارسی موسیقی تنشزاست. این کارها حتی ممکن است برای شما سالم یا سازنده هم نباشند این چهار کلمه، ساده، راحت، سالم و سازنده در صورتی که بارها تکرار شوند به قدری اثرگذار خواهند شد که حتی می توانند زندگی ما را تغییر دهند این چهار کلمه مختصر توانند بر قدرت فلج کننده امیقترین و ترین تردیدها و حراسهای ما نیز غلبه کنند در فرهنگ ما بسیاری از افراد حتی باور ندارند که میتوان موفق شد و همچنان زندگی راحتی داشت یا اینکه به اعتقاد آنها قبل از موفق شدن باید به شدت کار کرد یا شاید لازم باشد یک فرد معتاد به کار دارای تیپ شخصیتی علف بود آنها همچنین معتقدند که پس از رسیدن به موفقیت میتوان آرام گرفت و زندگی راحتی داشت بسیاری از افراد حتی میزان موفقیت را معادل میزان استرس صرف شده برای رسیدن به آن می‌دانند. یک باور درونی ژرفی وجود دارد که بر اساس آن جاده منتهی به موفقیت پر از تنش و دغدغه میباشد و این موضوع را باید همانطور که هست پذیرفت. بالاخره هرچه باشد برای موفق شدن باید از جمله افراد دارای تیپ شخصیتی الف بود. اما من کاملا مخالف این باور هستم. و تنها کسی نیستم که با این باور مخالفت میکند. من، افراد بسیاری هستند که معتقدند به طور دقیق عکس این باور درونی صحیح است. به اعتقاد آنها هرچه شما راحت تر باشید، زندگی راحت تری خواهید داشت و به موفقیت بیشتری دست خواهید یافت. وقتی که شما هر کاری را در حالت راحتی و آرامش مورد توجه قرار دهید، تصمیم بهتری خواهید گرفت. هر کسی ارزش موکول کردن تصمیم گیری به فردا را میداند. آنچه که در بعد از ظهر یک روز ممکن است برایتان پیچیده به نظر برسد در صبح روز بعد اغلب برایتان ساده و بدیهی خواهد بود تصمیماتی را که در شرایط نگرانی و پرتنش اتخاذ می‌کنیم اغلب تنش بیشتری را در ما ایجاد می‌کنند آنچه که می‌تواند موفقیتمان را به سطح بسیار بالاتری برساند استفاده از خط مشی‌ها یا طرح‌هایی است که در زمان راحت بودن به فکر ما می‌رسند این چهار واژه ساده راحت سالم سازنده نه تنها به شما در رسیدن به اهدافتان کمک خواهند کرد بلکه کیفیت زندگی را به مراتب بالاتری برایتان فراهم خواهند ساخت با فرض اینکه زندگی آن چیزی است که اکنون و در همین لحظه شروع می‌شود و ما در حال سپری کردن آن هستیم پس از اینکه این, این واژه ها را چند هزار بار تکرار کردم توانستم تغییرهایی را در زندگی خیش مشاهده و احساس کنم سرانجام در زندگی خود نه تنها گمان داشتم بلکه به حقیقت دریافتم که میتوانم به شکلی ساده و راحت موفق شوم. اگر من بتوانم به این شکل موفق شوم، شما نیز می توانید. موفق شدن به این شیوه چندان پیچیده یا مشکل نیست. شما تنها با یادداشت کردن عبارات تحکیدی خود و بارها تکرار کردن آنها گام بزرگی به سمت جلو برخواهید داشت. فهرستی از اهداف خود را به صورت عبارتهای تاکیدی یادداشت کنید، و آن یادداشتها را همراه خود داشته باشید. عبارتهای تکیدی خود را بارها تکرار کنید، تا آنها در ذهن ناخداگاه شما نقش ببندند. فهرستی از عبارتهای تاکیدی خود را یادداشت کنید، یا به وسیله رایانه از آنها پرینت بگیرید و آن را همراه خود داشته باشید. عبارتهای تاکیدی را بارها بخوانید. هر بار که آنها را می خانید، یا به زبان می آورید یا می نویسید آن لغات قوی در ذهن خلاق ناخداگاهتان نقش می بندند وقتی که کار نوشتن فهرست عبارتهای تأکیدی خود را به پایان رساندید شروع کنید به کسب طرهایی در خصوص گامهای بعدی که شما را به حرکت در جهت تحقق اهدافتان و داشت یا اینکه به سخنان فرد راهنمای گوش کنید که در آن لحظه به دقت به شما میگوید باید نسبت به چه امری آگاه باشید یا اینکه ممکن است اتفاقی رخ دهد که یک دفع شما را به حرکت واداشته و با این حرکت شما را به هدفتان بسیار نزدیکتر بسازد. به این ترتیب در فاصله زمانی کوتاه و گاه به صورت خود به خود شاهد شکلگیری طرحی خواهید بود و شما پی خواهید برد که قادر به برداشتن گامهای آشکار بعدی به شکل ساده و راحت و به شیوه سالم و سازنده خواهید بود. حتی در صورت مخالفت شما با بسیاری از گفته‌های من شما را به مبارزه فراخوانده و از شما می‌خواهم که فهرستی از های تأکیدی را تهیه کنید آنها را به مدت چند هفته و در بسیاری اوقات تکرار کرده و ببینید که چه اتفاقی می‌افتد به اعتقاد من این اصول و اقدامات مؤثر هستند البته نه به این علت که من بر اثر یک جهش اعتقادی به این باور رسیده باشم بلکه از این جهت که آنها را آزمایش کرده و شاهد تأثیر آنها بر زندگی خودم بودم وقتی که شروع به برداشتن این چند گام ساده کردم که نتیجه آن تنها شامل یادداشت‌های نوشته شده بر روی چند صفحه کاغذ میشد دوچار تردیدها و های بیشماری شدم اما در فاصله زمانی کوتاهی شاهد ایجاد تغییرات قابل توجهی در زندگی خودم بودم البته تردیدها و هراس ها همچنان پیش می آیند. اما ما می توانیم یاد بگیریم که چگونه به شکل موثری از پس آنها براییم چگونگی انجام این کار موضوع گام ضروری بعدی است که در جهت خلق دنیای آرزوهای خیش باید برداریم فصل سه. گام ما اولین گام ضروری را برداشته ایم این گام تنها شامل نوشتن چشمنداز آرمانی خود بر روی یک صفحه کاغذ می شد دومین گام ضروری را نوشتن اهداف خود به صورت عبارت های تأکیدی تشکیل می‌داد. آیا تا کنون گام های اول و دوم را برداشته اید؟ برای این کار تنها یک یا دو صفحه کاغذ نیاز دارید و این دو صفحه ممکن است حیاتی ترین و حتی تأثیرگذارترین صفحاتی باشند که شما تا کنون نوشته اید. لغاتی که شما روی این صفحات می به مهمترین ابزارهای شما برای موفقیت تبدیل می‌شوند. این لغات در طی زمان شما را به کشف گام های بعدی که لازم است بردارید، هدایت می چگونگی چگونه تأثیر گذاری این لغات بسیار مرموز است. اگر دوست داشتید، می توانید آن را یک جادو بنامید. شما می توانید آن را هر چه می خواهید بنامید. می توانید آن را به عنوان ای که انرژی خلاق فطری و طبیعی شما را بیدار می در نظر بگیرید. من دوست دارم آن را به عنوان یک جادوی پیشرفته و موثر در نظر بگیرم که تأثیر بزرگی بر زندگی من داشته است. البته مایلم که این اثرگذاری به شکل ساده و راحت و با ملاحظه شرایطی که حد اکثر سوداوری را برای همه به دنبال داشته باشد، صورت گیرد. این یک دوری آموزشی در زمینی جادو، جادوی پیشرفته و موثر است. همه کارها با یک خیال شروع می شود. به این شکل ما ابتدا به خود جرأت خیال پردازی می دهیم و سپس به نیروی تصور خود اجازه می دهیم که پرواز کند اجازه دهید تصور شما اوج بگیرد در شرایط آرمانی دوست داشتید چه نوع زندگی داشته باشید؟ برای رسیدن از اینجا به آنجا باید بر روی چه اهدافی تمرکز کنید. ما این اهداف را بر روی یک بری کاغذ یادداشت نموده و تصریح می کنیم که آنها همکنون در حال ورود به زندگی ما هستند. سپس چه اتفاقی میافتد؟ تقریبا همه ما به محض اینکه به خودمان اجازه می دهیم که خیال پردازی کنیم با تردیدها و هرراهایی مواجه میشویم هر چه خیالات ما گستردهتر باشند تردیدها و هرراهای ما بیشتر خواهند شد تردیدها و هراس ممکن است برایمان طاقت فرسا به نظر برسند آنها موجب می شوند که نسبت به تواناییهای خود شک کنیم آنها ممکن است ما را مجبور کنند به دلیل خیال پردازی احساس حماقت کنیم آنها می توانند ما را مجبور کنند خیال های خود را کاملا فراموش کنیم و به زندگی همراه با کسالت و جنگ و دعوا راضی شویم. گام ضروری سوم. گام ضروری بعدی برای تقریبا همه ما این است که یاد بگیریم چگونه به شکل موثری از پس تردیدها و هراس های خود براییم. تردیدها و هراس شخصی ما به عنوان بزرگترین مانع میان جایی که اکنون هستیم و جایی که برجسته ترین خیالات و جامعترین اهداف ما قرار دارند به شمار میروند. تردیدها و هراس‌های ما بزرگترین موانع ما هستند. تقریبا تمام کاری که برای خلق بزرگترین موفقیت قابل تصور باید انجام داد کاری درونی است. اک هارت طوله در کتاب قدرت زمان حال به شکل ساده و روشن بیان کرده است که درون خود را درست کنید و نگران بیرون خود نباشید بیرون شما مراقب خودش خواهد بود. نسبت به افکار و احساسات خود بیشتر آگاه شوید. اکنون این سوال پیش می آید که این کار درونی را چگونه انجام دهیم؟ این کار قبل از هر چیز بستگی به افزایش آگاهی ما از افکار و احساسات خودمان دارد. ما به کمک این افزایش آگاهی گام بزرگی در جهت تغییر تردیدها و هرراهای خود خواهیم برداشت فقط است در هر لحظه از افکاری که به ذهنتان میرسد آگاه باشید. ما مجبور نیستیم قربانیانی ناامید در یک جهان بیاطفه باشیم که به واسطه جریان های مهار نشدنی افکار و احساساتی که قادرند ما را از پای درآورند به یک سورانده شویم. ما میتوانیم به آسانی دریابیم که از توانایی آگاه شدن کامل از تردیدها و حراسهای خود برخورداریم و میتوانیم یاد بگیریم با دقت بیشتری مراقب افکار و احساسات خود باشیم. و از آنها آگاه تر شویم ما می یاد بگیریم که مراقب بیرونی را در درون خود جستجو و پیدا کنیم آگاهی بیشتر از افکار و احساسات خود گام بزرگی در جهت تغییر تردیدها و حراس هاست برای این منظور تنها کافیست نسبت به آنها آگاه تر شویم آن وقت ما، نه به کمک عقل خود، بلکه از طریق تجربه فیزیکی، روحی و عاطفی متوجه خواهیم شد که مراقب درونی ما از جایی آمده که کاملا متفاوت با محل افکار پرپیچ و تاب و تردیدها و حراسهای ماست. مراقب ما ناظری است که در یک مکان ساکت و آرام نشسته و بدون پیش داوری مراقب آنچه که در درون ما اتفاق می‌افتد میباشد. به طور طبیعی وقتی که ما چیزی اعم از غروب آفتاب، یک کار هنری، چشم های براغ و درخشنده یک بچه یا افکار شخصی خود را به خوبی مشاهده می کنیم، آرام و منطقی هستیم. اما اگر ما افکاری داشته باشیم که بیوقف وارد ذهنمان شوند، حتی قادر به مشاهده آنچه که درست در مقابل چهره ماست نخواهیم بود. افکار ما برای دیدن هر چیز باید یک لحظه دست از کار بکشند، به این ترتیب ما در همان یک لحظه آرام و منطقی خواهیم بود. ما در آن لحظه پذیرانیز هستیم و بدون هیچ مانع ایجاد شده توسط افکاری که به سرعت وارد ذهنمان می شوند قادر به مشاهده آنچه از مقابل چهرهمان میگذرد خواهیم بود. در آن لحظه هیچ تردید و حراسی وجود ندارد. افکار و احساسات خود را به روشنی مورد ملاحظه قرار دهید. بدون هیچ گونه پیش مراقب آنها باشید. آنها را هم در زمانی که وارد ذهنتان میشوند و هم در زمانی که از ذهنتان خارج میگردند تحت نظر قرار دهید. بیشتر افکار و حتی سرسختترین آنها را میتوان به آرامی کنار گذاشت. برای این منظور تنها کافی است که به خود بگویید: بسیار خوب، آن فکر را رها کن. تمرین ساده وجود دارد که قادر است زندگی زندگیمان را به شدت تحت تاثیر قرار دهد و این تمرین به این شرح است: هر وقت خواستید در همان لحظه احساس راحتی بیشتری کنید فقط یک نفس عمیق بکشید و همچنان که نفس خود را بیرون میدهید کلیه افکار خود را رها کنید اگر ناچار بودید بر روی کاری تمرکز کنید می توانید این تمرکز را بر روی بیرون دادن نفس خود قرار دهید و فقط برای یک لحظه کلیه افکار خود را رها کنید. با این تمرین شما می توانید حتی در عواط یک روز شلوغه کاری از یک لحظه آرام و 20 تا شوید من این تمرین مختصر را هر روز بارها انجام می دهم. این تمرین به طرز بی حد و اندازهی موجب آسانتر شدن زندگی من شده است بیشتر ما بر این باور هستیم که برای حل مشکلاتی که بانها مواجه میشویم به تفکر بیشتری نیاز داریم با این حال تعداد بسیار زیادی از ما به این موضوع پی بردند که وقتی ما افکار خود را رها می و هنگامی که در مواجهه با یک مشکل به راحتی آرامش خود را حفظ می کنیم و هنگامی که از کار کردن سخت برای حل آن مشکل دست می کشیم، در بیشتر موارد راه حلهای سادهی به شکل کاملا راحت و عادی برای من آشکار می شوند. ما در اثر کمتر فکر کردن به جای بیشتر فکر کردن از درک شهودی بالاتر برخوردار شده و حتی تیزهوشتر خواهیم شد. دیگر نیازی نیست که به افکار منفی و محدود کننده فکر کنید. وقتی که ما به این موضوع پی ببریم به صورت خودکار جهش بزرگ رو به جلوی دیگری را در جهت حیات بخشیدن به زندگی خیالات خیش خواهیم داشت وقتی ما طرز مراقبت از افکار خود را یاد بگیریم متوجه می‌شویم که قادر به انتخاب افکار خود هستیم ما میتوانیم تصمیم بگیریم آن دسته از افکاری را که دیگر به درد ما نمیخورد، رها کنیم و بر روی اموری تمرکز کنیم که به ما کمک میکنند سفر معنوی راحت و رضایت بخشی داشته باشیم راه حل آن این است که یاد بگیریم مراقب آنچه در درون ما اتفاق میافتد باشیم آن را کاملا بپذیریم و در نهایت آن را رها کنیم به عبارت دیگر باید یاد بگیریم که همه چیز را بدون مقاومت در برابر آنها مشاهده کنیم و سپس آنها را رها کنیم اکهارت تول یک بار دیگر در کتاب قدرت زمان حال این موضوع را به زیبایی در این جمله خلاصه کرده است منظور از ارزه نداشتن هیچ مقاومتی در برابر زندگی به سر بردن در حالت شکرگذاری، راحتی و وسبواکی است یاد بگیرید چگونه باورهای درونی محدود کننده خود را تغییر دهید. بیش از سی سال قبل از چنین روزی بازی یا فرایند یا هر چه شما میخواهید آن را بنامید ساده و مختصری را یاد گرفتم که زندگی مرا تغییر داد. نسخه اولیه این فرایند، توسط کن پسر که نویسنده ی کتاب راهنمای رسیدن به آگاهی بالاتر است ایجاد شد. بال وی شاکتی گاوین این فرایند را طی چندین سال اصلاح نمود و آن را در کتابچه‌ی راهنمای تجسم خلاق به رشته تحریر درآورد ما می باورهای خود را از طریق فرایند ساده‌ای به نام فرایند باور درونی تغییر دهیم تنها عاملی که این فرایند نیاز دارد این است که با خودتان صادق باشید در این خصوص دو نسخه وجود دارد که یکی نسخه کامل فرایند باور درونی و دیگری نسخه مختصر این فرایند است. نسخه کامل فرایند باور درونی. نسخه کامل فرایند باور درونی زمانی بیشترین کارایی را دارد که شما نگرانی دارید. می توانید این فرایند را هر زمانی که می خواهید یا حول هر موضوعی که مایلید انجام دهید. اما اگر زمانی آن را انجام دهید که نگران، مضطرب، عصبانی یا بیمناک هستید، اثر قوی و تأثیر آن را در تغییر زندگی خود تجربه خواهید نمود. گام های این فرایند ساده هستند. برای طی نمودن آنها است با صداقت به این سوالها پاسخ دهید. 1. مشکل چیست؟ مشکل، وضعیت یا حوزه خاصی از زندگی خود را که می خواهید بهبود دهید در نظر بگیرید. آن را توصیف کنید. فکر کردن یا صحبت کردن راجع به آن معمولا دو یا سه دقیقه طول می کشد. 2. چه هیجاناتی را احساس می کنید؟ خاص خود از قبیل ترس، عصبانیت، ناامیدی، احساس گناه و غم را نام ببرید. وارد افکار خاصی که در این لحظه دارید نشوید. فقط لغت واحدی که هر حیجان را توصیف می کند به دقت مشخص کنید. 3. در جسم خود چه حساسیت هایی را احساس می کنید؟ از انگشتان پا تا بالای سر خود را با دقت مورد بررسی قرار دهید. آیا در جای احساس تنش می کنید؟ نفس کشیدن شما چگونه است؟ در شکم شما چه می گذرد ؟ چهار راجع به چه چیزی فکر می کنید؟ در ذهنتان چه می گذرد؟ در حال حاضر دارای چه افکار منفی ترس ها یا نگرانی هایی هستید چه افکاری شما را شرطی شده یا برنامه ریزی شده کرده است؟ افکار خود را در ظرف چند دقیقه توصیف کنید؟ وقتی که شما این گام را انجام می دهید، مراقب را به صورت خودکار فرا میخوانید و فرایند جداسازی خود را از افکاری که وارد ذهنتان می شود آغاز می کنید. پنج بدترین اتفاقی که در این وضعیت ممکن است بیفتد چیست؟ بزرگترین ترس شما در این شرایط چیست؟ اگر بزرگترین ترس شما به حقیقت بپیوندد، بدترین اتفاقی که ممکن است بیفتد چه خواهد بود؟ اگر بدترین اتفاق ممکن هم رخ دهد، نهایت بدترین رویدادی که احتمال رخ دادن آن می رود چه خواهد بود؟ این سوالات موجب آشکار شدن عمیق ترس‌های شما می شوند. انجام این کار بسیار خوب است. زیرا وقتی آن دسته از میق ترس‌های خود را بیان می کنید، متوجه خواهید شد که احتمال اینکه برای پذیرفته شدن از سوی ذهنتان واقعا وارد آن شوند بسیار ضعیف خواهد بود. شش. بهترین اتفاقی که ممکن است بیفتد چیست؟ دوست داشتید که در شرایط آرمانی چه اتفاقی می افتاد؟ آرمانی شما برای این حوزه از زندگیتان چیست؟ بیان چشمنداز آرمانی ممکن است برایتان از بیان بدترین ترسهایتان مشکل تر باشد. اگر این موضوع صحت داشته باشد، احتمالا ترسهای شما بر رویای موفق شدن شما قلبه می کنند. شاید به دلیل این باشد که شما در زندگی خود بیش از نیمه پر لیوان بر نیمه خالی لیوان تمرکز می کنید. بهترین اتفاقها و بهترین پیشامدهای ممکن را در ذهن خود نگه دارید. رویای خود را فراموش نکنید. هفت. چه ترس یا باور محدود کننده شما را از خلق آنچه می خواهید باز داشته است؟ اکنون به اصل مسئله می رسیم و آن عبارت است از اینکه. چه ترس یا باور محدود کننده ای را میتوانید شناسایی کنید. پس از تحقیق و جستجو در خصوص این موضوع، ترس یا باور محدود کننده خود را تا جایی که میتوانید به سادگی و روشنی بیان کنید. یادداشت کردن ترس یا باور محدود کننده نیز به شما کمک می کند اگر تعداد آنها بیش از یکی است، تمام آنها را یادداشت کنید. آنها را به شکلی یک باور بیان کنید. مثلا بگویید من باور دارم که فرد نالایقی هستم. من باور دارم که به قدری که برایم کفایت کند دارایی ندارم. من باور دارم که پول درآوردن سخت است. من باور دارم که زندگیم گاه پرتنش و نابسامان شود. هر چه واجه هایی که به کار ساده تر باشند بهتر است. تا جایی که برایتون مقدور است واجه هایی را به برید که حتی یک بچه‌ام بتواند آنها را درک کند. اکنون نوبت به بررسی قویترین گام فرایند باور درونی می رسد. 8 برای بی اثر کردن و اصلاح نمودن باور منفی و محدود کننده یک عبارت تأکیدی ایجاد کنید عبارت تأکیدی باید کوتاه و ساده بوده برایتان معنادار باشد و در زمان حال بیان شود به نحوی که گویی همکنون در حال رخ دادن است در اینجا به برخی از عبارتهای تأکیدی اشاره می کنیم. من به اندازه کافی داره هستم من همکنون در حال ایجاد وضعیت وفور در زندگی خود هستم. من همکنون در حال ایجاد موفقیت مالی هستم. من همکنون در حال دستیابی به اهداف خود به شکل آسان و راحت و به شیوهی سالم و سازنده هستم. عبارت تأکیدی شما که برعکس باور درونیتان است، می یک عبارت منفی و محدود کننده را به یک عبارت مثبت و قابل توسعه تبدیل کند. در اینجا به مثالی در این خصوص اشاره می کنیم. من این فرایند را هنگامی انجام دادم که با توجه به وجود بدهی هزار دلاری در موجودی کارت اعتباری خود از لحاظ مالی در سطح پایین فقر و در آستانه ورشکستگی قرار داشتم. من در آن زمان به این باورهای درونی خود پی بردم. من یک احمق هستم که پول خود را با حماقت خرج می کنم. من کنترلی بر دارایی های خود ندارم. من دچار دردسر شدم. اما به محض اینکه آن باورهای درونی ژرف خود را به وضوح شناسایی کردم یک عبارت تأکیدی به ذهنم رسید که کاملا مغایر با آن باورها بود و خواندن آن به من احساس واقعا خوبی میبخشید. آن عبارت تأکیدی عبارت بود از من فرد منطقی هستم و بر های خود کنترل دارم من در حال خلق موفقیت مالی محض هستم آن عبارت تأکیدی را چندین بار به حروف بزرگ نوشتم و آن را در جاهای مختلف قرار دادم تا از مشاهده و به خاطر آوردن آن قافل نشوم برخی از این اینجاها عبارت بودند از کنار تلفن خود در اداره بر روی کمد خود در اتاق خواب روی آینه دستشویی و در کیف جیبی خود در کنار مقادیری ناچیز و طرحم برندیز پول نقدی که با خود حمل می کردم هر زمان که آن ترسهای سابق پیش می آمد با قاطعیت اظهار می کردم که من فردی منطقی هستم و بر دارایی‌های خود کنترل دارم من در حال خلق موفقیت مالی محض هستم. آن عبارت تأکیدی پس از صدها یا هزارها بار تکرار شدن شروع به اثرگذاری در زندگی من کرد. من به این موضوع پی بردم که منطقی بودن و کنترل داشتن بر دارایی های خود به جای احمق بودن به هیچ وجه مشکل نیست. این برای من یک انتخاب بود که قبلا به صورت ناخودآگاهانه و اکنون به صورت آگاهانه صورت می‌گرفت. من همچنان به خودم می میگفتم که فردی منطقی هستم و بر دارایی های خود کنترل دارم. و حالا بیا و ببین. من به فردی منطقی و مسلط بر دارایی خود تبدیل شدم. چنین تبدیل شدنی به هیچ وجه مشکل نبود. در واقع مدیریت پول من به شکلی بسیار ساده ای صورت گرفت. گام هایی که باید برمی داشتم روشن بود. آنها عبارت بودند از کمتر از درآمد خود پول خرج کردن. شروع به پسنداس کردن پول خود. خلاص شدن از دست بدهی کارت اعتباری خود تولید مجموعه متنوعی از اوراق سرمایه گذاری بهادار و به نوع یادگیری چگونگی سرمایه در رابطه با املاک و مستقلات آموختن چگونگی مدیریت پول به دشواری یادگیری دانش پرتاب موشک نیست هر کسی که بتواند عملیات ساده ریاضی را انجام دهد قادر به درک اصول رسیدگی به امور مالی شخصی خود خواهد بود وقتی که من به تعداد دفعات کافی و با قاطعیت اظهار کردم که منطقی هستم و بر های خود کنترل دارم در عمل و با کمک تجربه شخصی خیش درستی این موضوع را احساس کردم این مطالب در برگیرنده درس خوبی برای بسیاری از ماست مراقب آنچه می‌گویید باشید سخنانی که ما به خود می‌گوییم اثرگذار هستند هر فکری که ما در سر می‌پرورانیم تأثیر بزرگی بر شکل گیری تجربه زندگی ما می‌گذارد در اینجا مثال‌های بیشتری در خصوص باورهای کننده و عبارات تأکیدی که می‌توانند بر آن باورها غلبه کنند آورده شده است. بسیاری از آنها برگرفته از کتابچه‌ی راهنمای تجسم خلاق که اثر شاکتی نست است میباشند. باور کننده من وقت کافی برای کارهایی که می‌خواهم انجام بدهم ندارم. عبارت تأکیدی: من وقت زیادی برای کارهایی که می‌خواهم انجام بدهم دارم. باور کننده. من برای زنده ماندن مجبورم مبارزه کنم. عبارت تأکیدی من در حال خلق موفقیت محض به شکلی ساده و راحت و به شیوهی سالم و سازنده هستم. باور محدود کننده من در محیط کار تحت فشار زیادی قرار دارم. دوری کردن از این فشار در شغل پرتنش من اجتناب ناپذیر است. عبارت تأکیدی من همکنون در محیط کار راحت هستم و به من خوش میگذرد و هر کاری را به راحتی و به شکلی ماهرانه به انجام می رسادم. باور محدود کننده پول فساد می آورد عبارت تحکیدی. هر هرچه پول بیشتری وارد زندگی من شود، توان بیشتری برای انجام کار خیر برای خودم، برای دیگران و برای سراسر جهان خواهم داشت. باور محدود کننده جهانی که در آن زندگی می محل محل است عبارت تأکیدی. من همکنون در جهان امن و زندگی می کنم. باور محدود کننده ایجاد یک رابطی عاشقانه و تداوم بخشیدن به آن کار بسیار سختی است عبارت تأکیدی. من همکنون یک رابطی عاشقانه و پایدار ایجاد کردم که برای من حسی از لطافت، راحتی و سبکی را برمغان آورده است. باور محدود کننده. من از آنچه لازمه موفق شدن است برخوردار نیستم. عبارت تأکیدی. من از تمام آنچه که لازمه موفق شدن است برخوردار بوده و در حال حاضر در حال خرخ موفقیت شخصی خیش در حد توان خود می باشم. یا اینکه من همکنون در حال زنده ساختن خیالات خیش به شکلی ساده و راحت و به شیوه سالم و سازنده هستم. نه عبارت تاییدیه خود را ته یک دوره چندین روزه به تکرار با خود بگوید یا یادداشت کنید. عبارت تاییدیه خود را یادداشت کنید و آن را در جایی قرار دهید که اغلب اوقات بتوانید آن را ببینید. هنگام استراحت یا هر زمانی که تردیدها و حراسهای بیشتری برایتان پیش آمد، آن را با صدای آهسته برای خودتان تکرار کنید. همه چیز را به دقت به همان گونه‌ای که می‌خواهید در عمل اتفاق بیفتد، در ذهن خود مجسم کنید. شاکتی گاوین تمرین مختصری را پیشنهاد می کند که من تنبلتر از آن هستم که بتوانم آن را انجام بدهم ولی مطمئنم برای شما بسیار مفید خواهد بود این تمرین به این شرح است عبارت تأکیدی خود را در صورت لزوم ده یا بیست بار در روز یادداشت کنید تا وقتی که احساس کنید آن عبارت به صورت یک باور درونی مثبت ملکی ذهن شما شده است اگر افکار منفی به سراغتان آمد، آنها را بر روی صفحه کاغذ دیگری یادداشت کنید و سپس به نوشتن عبارات تاکدی در همان صفحه ادامه دهید تا وقتی که از هر مقاومت احساسی که منجر به شکل گیری افکار منفی می شود خلاص شوید. در پایان کاغذ حاوی تردیدها و حراسهای خود را دور بیاندازید. آن را پاره کرده و در ظرف بازیافت قرار دهید. همین که فرایند باور درونی را انجام میدهید، در وجود خود احساس خواهید کرد که، با گذشت زمان و همین که عبارت تأکیدی موثر بر خود را پیدا می کنید، باورهای جدید می توانند جایگزین باورهای قدیمی شوند و این گونه نیز خواهد شد. کل فرایند باور درونی در اینجا مورد بررسی قرار گرفت. این فرایند فوقلاده بر زندگی من و همچنین بر زندگی بسیاری از افراد دیگر اثر بوده بود است. خودتان آن را امتحان کنید و آماده مشاهده برخی از نتایج باشید. آن نسخه کوتاه فرآنده باور درونی. هرچند نسخه طولانی تر هنگام اضرااب واقعا اثرگذار است. نسخه ساده تر و معمولیتر نیز وجود دارد که در صورت تجربه کردن آن متوجه سادگی آن خواهید شد. نسخه کوتاه کاریست که میتوانیم آن را هر جا و در هر موقع از طول روز انجام دهیم. هر زمان که احساس می کنید تردیدها و هررا شما در حال ظهور است سعی کنید آنها را به روشنی مورد توجه قرار دهید. از آنها قدردانی کنید و آنها را به صورت عباراتی مانند موفق شدن کار بسیار سخت و تنش‌زایی است بیان کنید. وقتی ما بتوانیم تردیدها و های خود را به روشنی مد نظر قرار دهیم، قادر خواهیم بود عکس آنها را تصور کنیم. بگذارید این این تردیدها را در صورت لزوم با یک نفس عمیق رها کنیم و به خود بقبولانیم که دقیقا عکس آن تردیدها و ها در این لحظه ظهور خواهند یافت. مثلا ما میتوانیم تصور کنیم که در همین لحظه در حال خلق موفقیت به شکلی ساده و راحت و به شیوهی سالم و سازنده و درست در زمان آرمانی آن هستیم. هرگاه تردیدها و هراس ها ظاهر شدند آنها را با سادهترین عباراتی که می توانید بیان کنید سپس عبارات تأکیدی را که دقیقا عکس تردیدها و هراسهای شما را بیان می کنند پیدا کنید و آنها را به جای تردیدها و هراس ها به خود بگویید. عبارات تاکییدی را هر چند بار که لازم است برای خود تکرار کنید. عبارت تاکییدی می بسیار قوی باشد. عبارت تاکییدی صحیح می بر طرز فکر محدود شده، منفی، تردیدآمیز و ترس برانگیز که سالیان سال و حتی چندین دهه بر تفکر افراد حاکم بوده غلبه کند. افراد زیادی وجود دارند که نسبت به موثر بودن عبارات تاکییدی اعتقادی ندارند. اما من بر اساس تجربه شخصی خود به این اصل معتقد شدم که عبارات تأکیدی قوی هستند هر فکری میتواند قوی باشد من به این مسئله پی بردم که هر چیزی میتواند تواند موثر واقع شود عبارات تأکیدی موثر هستند هدفگذاری موثر است نوشتن چشماندوز آرمانی خود موثر است دعا کردن موثر است تصریح کردن ها موثر هستند تفکر مثبت موثر است تلقین‌هایی که به خود میکنیم مؤثر هستند. افکار ما ابزار قدرتمندی هستند که تأثیرات قوی را در جهان به جای می‌گذارند. اما مشکل در اینجاست که افکار منفی و محدود کننده نیز اثرگذار هستند. اگر به تردیدها و حراسهای خود اجازه دهیم که در ما نمود پیدا کنند، ممکن است واقعا اتفاق بیافتند یا اینکه کلیه عبارات ای تکیدی، دعاها و افکار مثبت ما را بی اثر کنند نظر من در این خصوص که تقریبا شبیه اظهار نظر لندرا کارول در کتاب بزرگ وی به نام خلق کلیه فراوانی ها می باشد، این است که دنیا به هر فکر و خیالی که در سر داریم پاسخ مثبت می دهد. یک نیروی قوی وجود دارد، آن را هرچه می خواهید بنامید. دنیا زمیر ناخداگاه ما، غریزه، روح، حضور، خداوند، انرژی خلاق یا هر چیز دیگر که ما به طور مستقیم به آن وصل شدیم و وقتی که ما خودمان فکر می کنیم که مثلا من میخواهم به دنبال آرزوی خود بروم یا آنچه را که در زندگی دوست دارم انجام دهم آنگونه که دوست دارم باشم یا آنچه را که دوست دارم داشته باشم دنیا به ما پاسخ مثبت می دهد و فوراً به ما نشان میدهد که برای دستیابی به آنها دقیقاً باید چه کار کنیم. با این حال اگر فکر بعدی ما این باشد که افسوس موفق شدن بسیار سخت است. افراد کمی موفق می شوند دنیا به ما پاسخ میدهد که بله موفق شدن برای شما با افکاری که دارید بسیار سخت است و سپس به ما نشان میدهد که موفق شدن چقدر سخت خواهد بود را که دنیا به ما میدهد دقیقا همان چیزی است که خودمان تقاضا کردیم. نه بیشتر و نه کمتر بنابراین پیوسته تقاضا کنید بارها به ما گفته شده است که تقاضا کنید و حتما آنچه را که تقاضا کرده اید دریافت خواهید کرد. هدف از گفتن این مسئله فریب دادن ما نبوده و به عنوان مثال به ما نگفتند که تقاضا کنید و در صورت شایسته بودن آنچه که تقاضا کرده ای دریافت خواهید کرد. این مسئله به قدری ساده و شفاف بیان شده که حتی یک پسر بچه نیز میتواند آن را درک کند. به محض اینکه این مسئله عمیقا و به کمک زمیر ناخداگاه ما درک شود آنچه را تقاضا کرده این دریافت خواهیم کرد. در اینجا عبارت حائز اهمیتی آورده شده که می توانید آن را به انتهای هر یک از عبارات تاکیدی خود اضافه کنید. این عبارت تاکیدی یا عبارتی بهتر از آن در همین لحظه در حال آشکار شدن است. البته نحوه آشکار شدن آن کاملا در جهت ارزای فرد و هماهنگی با جامعه بوده و مسلحت عمومی در آن در نظر گرفته شده است. پایان بخش این فصل اشاره به شعری است که برایم تاثیرگذارترین شعری بوده که حداقل تا این لحظه از عمرم خواندم این شعر برگرفته از کتاب کوچکی به نام همانطور که شما فکر میکنید است که در سال 1904 در انگلستان و توسط جیمز آلن که با من هیچ نسبتی ندارد نوشته شده است من بخش های از آن کتاب را به یاد دارم و نقل قول های وی در آن کتاب اغلب به ذهنم خطور میکند آن کتاب کوچک زندگی من را تغییر داده است قدر زمان صرف تعمل در این شعر کنید. وقتی که هدفی را آرزو می کنید و زمانی که به خود می قبولانید که آن هدف در همین لحظه و به راحتی و سادگی در حال محقق شدن است، نیروهای خلاق موجود در جهان در جهت حمایت از شما برای حرکت گام به گام به سوی تحقق آرزوهایتان بسیج می شوند. فصل چهار گام چهارم خلق کردن ما تاکنون چشماندازهای آرمانی خود را روی کاغذ نوشته‌ایم اهداف خود را فهرست کردیم بر آنها تاکید نموده ایم و شروع به کار بر روی تردیدها و حراس هایی کرده کردیم که به محض جرأت یافتن ما به رویاپردازی ایجاد می‌شوند فقط یک گام دیگر باقی می‌ماند که چهارمین و آخرین گام است انجام این گام وقت زیادی نمی‌برد فقط در حین انجام این گام لازم است به جای سخت‌تر کار کردن تر کار کنید. چهارمین گام ضروری. برای هر یک از اهداف اصلی برنامه خود را روی یک یا دو صفحه کاغذ بنویسید. سپس گام های آشکار بعدی پیش روی خود را که برای حفظ حرکت رو به جلو و در جهت برنامهتان باید بردارید یادداشت کنید. به محض اینکه شروع به تاکید بر اهداف خود کردم دو اتفاق به صورت پیاپی و به فاصله زمانی کمی از یکدیگر افتاد که اولی تردیدها و هراس بود که به شدت ظاهر شدند و پس از یک لحظه فراغت از آنها مسئله برنامه های لازم برای دسترسی به آن اهداف بود که به ذهنم خطور کرد انجام مکرر فرایند باور درونی و ذکر مرتب عبارات تأکیدی مثبت به من کمک کرد تا حداقل برخی از تردیدها، ترسها، و باورهای محدود کننده خود را کنترل کنم. من حتی گهگاه احساس می کردم که شاید استعداد درونی من بسیار بیشتر از آن است که جرأت کرده بودم در رؤیای خود تصور کنم. همچنین به شدت احساس می کردم که تنها به واسطه ترسها و باورهای خود محدود شدم، و اکنون ابزارهای بسیار خوبی را برای کمک به کنترل آن ترسها و باورها در اختیار دارم. من حقیقتی را کشف کردم که هنوز هم برای من عجیب و جالب توجه می باشد. و آن حقیقت عبارت است از اینکه نوشتن برنامه ها به خودی خود گام موثری در جهت تحقق آنهاست. یک قلم و یک صفحه کاغذ بردارید یا برنامه پردازشگر لغات خود را باز کنید. هدف خود را در بالای صفحه بنویسید و برنامه خود را برای دستیابی به آن هدف یادداشت کنید. برنامه کلی شما ممکن است به هیچ وجه واضح نباشد شاید فقط چند گام اول آن معلوم باشد. همین مقدار نیز کاملا مطلوب است. برنامه های بسیار کمی وجود دارند که از همان اول کاملا مرتب باشند بنابراین فقط تا حد توان خود در آن لحظه اقدام به نوشتن برنامه کنید شما می توانید بعدا که برنامهتان خود به خود گسترش یافت مطالب بیشتری را بان با بیافزایید. اولین برنامه های من و البته بیشتر برنامه های من تا به امروز بجز برخورداری از هدفی که در بالا نوشته می شود و گامهایی که برای رسیدن به آن هدف لازم است برداشته شوند کمتر ساختار یافته بودند. اهداف من سالها فاقد شکل، ساختار و اثر بخشی لازم بودند. من از حدود ده سال پیش تا کنون این روند را اصلاح کرده و گاه برنامه های ساختار یافته تری نوشتم. شما هم اگر بخواهید میتوانید از برنامههای ساختاریافته تری استفاده کنید هر چند که ممکن است نیازی به انجام این کار نداشته باشید در هر حال همه اینها بستگی به خود شما دارد من متوجه شدم که حتی جزئیات یا خصوصیات برنامه چندان مهم نیستند آنچه ضرورت دارد این است که یک هدف روشن را رو در قالب نوشتاری داشته باشید و نوعی برنامه برای رسیدن به آن هدف را نیز نوشته باشید و سپس گام های آشکار بعدی و پیش روی خود را بردارید آن گام های عملی که برمیدارید نتایجی را به دنبال دارند که بر روی بقیه برنامه های شما تأثیر گذاشته و حتی ممکن است برنامه شما را به شکل قابل توجهی تغییر دهند بنابراین از همان آغاز نگران برنامه خود نباشید زیرا در هر حال برنامه شما به طور قطع تغییر خواهد کرد فقط کافی با یک برنامه هر برنامه شروع کنید و همچنان که پیش میروید آن را تغییر داده و مواردی را به آن اضافه کنید تنها عنصری که هر برنامه به آن نیاز دارد فهرستی از راهبردهایی است که برای رسیدن به هدف مورد نظر باید مورد ملاحظه قرار داد من به جای واژه مفرد راهبرد از واژه جمع راهبردها استفاده کردم زیرا هر برنامهای باید دارای راهبرد چند جانبه باشد هرگز تمام نیروی خود را صرف تمرکز بر یک راهبرد نکنید برای رسیدن به هدف هرگز تنها بر روی یک راهبرد ریزی نکنید. چندین راهبرد داشته باشید. در صورتی که طرحهای اولیهتان آنطور که می‌خواستید موثر واقع نشد، از راهبردهای کمکی و جایگزین استفاده کنید. یک صفحه کاغذ بردارید. هدف خود را در بالای آن یادداشت کنید و راهبردهای خود را برای رسیدن به آن هدف فهرست کنید. پویایی برنامه خود را حفظ کنید. هر تعداد گامی که میتوانید بردارید و ببینید که چه اتفاقی می افتد. من تقریبا میتوانم برای شما تضمین کنم که اتفاقی غیرمنتظره منتظره که نمی آن را پیش بینی کنید برایتان رخ خواهد داد که شما را به هدفتان نزدیکتر خواهد ساخت و این اتفاق احتمالاً مسیر برنامه شما را نیز تغییر خواهد داد. با توجه به این تغییر مسیر برنامه خود را به روز رسانی کنید و گام های آشکار بعدی را بردارید. نتایج حاصل به معنای واقعی کلمه سهرامیز هستند. تعداد بسیار کمی از برنامه های من از همان آغاز کاملا متشکل و ساختاریافته بودند. با برخی از آنها فقط میتوانستم یک یا چند گام بعدی پیش روی خود را ببینم و بالاخره این که تقریبا تمام برنامه های من با گذشت زمان به صورت قابل توجهی تغییر کردند. نوشتن برنامه مربوط به فعالیت تجاری من چند سالی طول کشید. من در اوایل کار فقط می توانستم چند گام لازم نخستین را که پیش رو داشتم ببینم که عبارت بودند از یک خواندن یک کتاب قدیمی تجاری 101 صفحهی و صحبت کردن با افرادی که دانش تجاری آنها از من بیشتر بود و همچنین یادگیری مبانی تجارت دو پیدا کردن یک شغل هر شغلی که باشد و پس انداز کردن 20 درصد از درآمد خود جهت تامین بودجه پروژه های اولیه خود آنچه گفته شد همه آن چیزی است که در آغاز کار با کنار هم قرار دادن کلمات می توانستم برای انجام دادن در نظر بگیرم اما پس از اینکه گام ها را برداشتم گام های بعدی نیز برایم آشکار شد پس از گذشت مدتی به مزایای عظیم یک برنامه ساده، روشن و یک صفحهای پی بردم برنامه یک صفحه ای اثر گذار است زیرا ذهن نیمه خداگاه قوی شما را به حرکت وامیدارد اگر خواستار ساختار ساختاربندی بیشتری برای برنامه خود هستید، این سه ساختار ممکن را در نظر بگیرید. 1. یک، برنامه برنامههای یک صفحه من تنها فهرستی از انجام دادنی هست. که من در این ساختار هدف را در بالای صفحه قرار می دهم و سپس کلیه گامهایی را که به نظرم برای رسیدن به آن هدف ضروری است فهرست می کنم. دو، دومین ساختار ممکن کمی ساختار یافته تر است. در این ساختار لازم است این موارد را به ترتیب فهرست کنید. هدف اصلی هدف منحصر به فرد و فراگیر خود را در بالای صفحه یادداشت کنید ممکن است شما بخواهید مأموریت خود را که پیش از هر چیز عریض و طویل ترین دلایل خود برای انجام وظیفه اصلیتان است به این هدف بیفزایید اهداف اهداف چندگانه ای را که برای رسیدن به هدف اصلی باید محقق ساخت فهرست کنید راهبردها راهبردها همان گام هایی هستند که برای رسیدن به آن اهداف باید برداشت. 3. اگر باز هم خواستار ساختار و جزئیات بیشتری هستید، ساختار نوع سوم به شما پیشنهاد می شود. این ساختار برگرفته از کتابی با عنوان برنامه تجاری یک صفحهی نوشته جیم هوران است که حدود چهار یا پنج سال پیش به طور تصادفی آن را می خانده. برای گنجاندن قالب پیشنهادی وی در یک صفحه، ممکن است مجبور شوید کلمات را خیلی کوچک یادداشت کنید یا از حروف چاپی با اندازه کوچک استفاده کنید. البته گنجاندن برنامه تجاری در دو تا سه صفحه نیز مطلوب است، زیرا جزئیات بیشتری در آن ارائه می شود. قالب وی شامل این موارد می گردد. چشمنداز آینده شرکت، مسیر شغلی یا زندگی خود را چگونه تجسم می کنید؟ تصویر ذهنی شما از آنها در پنج سال آینده چگونه خواهد بود؟ طرح خود را به شکلی توصیف کنید که احساسات تند شما در آنها مهار شده باشد. دلیل شما برای انجام وظیفه اصلی خود چیست؟ احساس شما نسبت به انجام دادن این وظیفه چیست؟ با فرض اینکه شما صاحب یک شرکت باشید، به این سوال پاسخ دهید که چرا مشتریان باید کالا یا خدمات شما را خریداری کنند. اهداف اهداف شما کدامند؟ برای موفق شدن چه دستاوردهایی را باید کسب کنید؟ اهداف خود را در قالب اصطلاحات روشن همراه با مقاصد و چارچوب‌های زمانی فهرست کنید. راه بردها چه آملی شما را تا به امروز موفق نگه داشته است؟ با گذشت زمان چه آملی شما را موفق نگه خواهد داشت؟ ترها برای دستیابی به اهداف در سال جاری چه پروژه ها و اقدامات ویژهای باید به انجام برسد برای هر هدف اصلی طرح مختصری را یادداشت داشت کنید و طرح خود را به روز نگه دارید اینکه ساختار طرح شما چگونه باشد مهم نیست فقط طرحه شخصی خود را هر طرحی که می خواهد باشد به صورت کتبی تدوین کنید. پس از تدوین طرح خود، مرتب با آن رجوع کنید. گام های آشکار بعدی را بردارید و به این ترتیب احساس خواهید کرد که طرحتان نیروی محرکی لازم را به دست آورده است. سپس شروع به دیدن نتایج کنید. منضبط شوید. سالها پیش به یکی از دوستانم گفتم من شخص کاملا بی‌انضباطی هستم. اما او گفت نه اینطور نیست. شما در جایی که ضرورت داشته باشد منذبت خواهی بود. من فهمیدم که نگاه وی به این قضیه بسیار مثبتتر از نگاه من است و با گذشت سالها هر وقت خودم را در میابم به شلوغی روی میزم نگاه میکنم و با خودم فکر میکنم که بینزبات هستم عبارت تأکیدی مثبت من در جایی که ضرورت داشته باشد منضبط خواهم بود را جایگزین گذینه تفکر منفی خود میکنم. من سامانه سادهای را برای سازماندهی مطالب کتبی مهم خود ایجاد کردم. در کیف اسناد خود پوشهای دارم که درون آن گیره های کاغذی وجود دارد و تعداد زیادی برگه کاغذ را به آسانی نگه می‌دارند. روزی که 30 شدم، پوشهای را پیدا کردم که یک تصویر خیره کننده از کوه‌های عظیم پردود روی آن بود و این لغات را با حروف دروش روی جلد آن نوشتم. من اکنون در حال خلق زندگی مطلوب خویش هستم. سالها بعد نیز از پوشه فایل سادهای با برچسب به ابزار جادویی برای ذکر جملات معنادار خود استفاده کردم. اکنون یک پوشه دارم که داره چند پاکت است و بر روی جلد آن تصویر کره زمین قرار دارد. من در بالای تصویر زمین یک ستاره اضافه کردم و در زیر آن ستاره عبارت من هر لحظه توسط روح خود هدایت می شوم را نوشتم. هر دسته از لغاتی را که فکر می کنید برایتان معنا است، روی جلد پوشه خود یادداشت کنید. داخل پوشه چشمنداز آرمانی من، فهرستی از اهداف و عبارات تکیدی، یادداشت‌های اضافی و سایر وسایلی که با گذشت زمان به پوشه خود اضافه کرده‌ام، قرار دارند. فراهم کردن امکان دسترسی آسان به این پوشه و به روز نگه داشتن محتویات آن، موجب حفظ تمرکز شما بر موارد اصلی و ضروری خواهد شد. محتویات این پوشه می توانند تبدیل به چراغ هدایت شما در زندگی خود ساخته خودتان شوند بدون توجه به مفهوم نوشتهتان در فواصل زمانی معین بنشینید و به صورت کتپی به خود نشان دهید که در زندگی می خواهید به کجا بروید و انگیزه شما برای رفتن به آنجا چیست تنها وسایل دیگری که در سامانه کوچک منظم من وجود دارند مجموعی از پوشه های فایل است که هر یک از این پوشه ها به یکی از اهداف اصلی مربوط می شوند. داخل هر یک از این پوشه ها طرح یک صفحه‌ای من برای دستیابی به آن هدف در بالای صفحه آورده شده و به دنبال آن اطلاعات کمکی مناسب از قبیل بیانیه‌های مأموریت و فهرست آنچه باید انجام شود، بودجه لازم برای پروژه‌های پیشنهادی، یادداشت‌ها و هر وسیله دیگر مربوط به هدفی که می‌خواهم برای رسیدن به آن تلاش کنم بیان شده است. من مجموعه پوشه‌های فایل را درون کیف اسناد خود نگهداری می‌کنم. آنچه که گفته شد کل سامانه مختصر من است. آمده سازی نخستین این سامانه که پس از نوشتن چشمنداز آرمانی و فهرست اهداف خود به صورت عبارتهای تحکیدی صورت گرفت احتمالاً در حدود ده دقیقه طول کشید. حتی یک فرد تنبل نیز میتواند ده دقیقه وقت صرف این کار نماید و این کار مشکلی نیست. برای انجام این کار لازم نیست جسم سنگینی را بلند کنید. تنها لوازم مورد نیاز شما شامل نوعی پوشه، یک خودکار و تعداد زیادی پوشه ی فایل می‌گردد. یک سامانه ساده برای سازماندهی این اطلاعات فوق‌العاده مهم ابدا کنید. برای هر هدفی، پوشه ی فایل مخصوص به خود را که شامل برنامه‌ی شما و برخی از اطلاعات کمکی است، در نظر بگیرید. هرگاه احساس درماندگی کردید، احساس کردید که به هر دلیلی به سوی هدف خاصی در جهت رو به جلو حرکت نمی‌کنید، برنامه و تقویم خود را بیرون آورده و گام بعدی یا دو گام بعدی را که در تاریخ مشخصی باید بردارید در تقویم خود یادداشت داشت کنید. از تقویم روزانه خود برای بیاد آوردن روزهایی استفاده کنید که در آنها باید گامهای عملی مورد نیاز را برای بازیابی نیروی محرکی خود بردارید. در صورت ناتوانی از انجام آنچه که در تقویم روزانه خود ثبت کرده اید خود را سرزنش نکنید فقط است، که انجام آن را به تاریخ دیگری در زمان آینده موکول کنید و با قاطعیت اظهار دارید که همه کارها به شکل ساده و راحت و در زمان درست خودش در حال اتفاق افتادن است. خواسته های خود را به قصد ها و هدف ها تبدیل کنید. هنگامی که شما برنامه ای را به صورت مکتوب در اختیار داشته و گام های عملی آشکار بعدی را برمی دارید، این پیغام اثرگذار را به ذهن ناخداگاه خویش ارسال می کنید که آرزوها و خواسته های شما تبدیل به قصد ها و هدف ها شدند. وقتی شما برنامه مکتوبی داشته باشید که در آن آرزوی شما در بالای صفحه نوشته شده است، آن آرزو دیگر خیالی یا غیر واقعی نخواهد بود. وقتی یادداشت می کنید که چه می خواهید و چگونه برای رسیدن به آن برنامه ریزی کرده اید، خواسته شما دیگر زودگذر نخواهد بود. همچنان که به کار کردن با برنامه های مکتوب خود ادامه میدهید، فرایند جالبی به جریان میافتد که طی آن آرزوها و خواسته شما تبدیل به قصدها هدفها قصد ها و هدف ها میشوند. قصد به خود نیروی قدرتمندی است به طوری که وقتی شما قصد کاری را میکنید هر طور شده کاری میکنید آن اتفاق بیفتد. بالاخره دیر یازود قصد یا نیات شما معلوم خواهند شد. قصد کردن هم ذهن خداگاه و هم ذهن ناخداگاه ما را کاملا به خود مشغول میکند. و حمایت آنها را از کلیه جهاتی که نمیتوان پیش بینی یا حتی تصور کرد، به سوی خود جلب کرده یا برمی انگیزاند. در اینجا نقل قول دیگری از جیمز آلن که برگرفته از شعر با عظمت ویست آورده شده که در فصل سوم به بخش دیگری از آن شعر اشاره شد. شما همانی خواهید بود که قصد دارید باشید. وقتی که جرعت رویا پردازی پیدا می کنید و سپس یک برنامه مکتوب تهیه کنید، نیروهای خلاق جهان برای حمایت از شما به شیوه های ابتکاری بیشمار و پایان به سوی شما حجم خواهند آورد. کل این فریند شامل چهار گام ساده می شود. انجام این گام ها به قدری ساده است که حتی فردی به تنبلی من نیز می آنها را انجام دهد. شما مجبور نیستید که وقت یا تلاش زیادی را صرف انجام این گام ها کنید. تنها چیزی که در این بین اهمیت دارد این است که بتوانید ذهن خلاق خود را در جهت صحیح متمرکز کنید. مرور و بازنگری به زحمتش میارزد. ما برای یادگیری راه و روشهای جدید تفکر و عمل نیاز به تکرار کردن داریم. همین که شما طرحی را بر روی کاغذ میآورید در حال فرستادن پیغامی ساده و روشن به ذهن ناخودآگاه خود و به کل جهان و به هر کسی که در آن زندگی میکند هستید و آن پیغام این است: آرزو یا میلی که شما به چیزی داشتید، همکنون به یک قصد و هدف تبدیل شده است. شما نسبت به آنچه می‌خواهید خوب فکر کرده اید و آن را روی کاغذ یادداشت اید شما مصمم هستید و میخواهید هر طور شده، دیر یا زود آن اتفاق بیفتد. شما قصد دارید که در حد خود، به شکل ساده و راحت و به شیوهی سالم و سازنده، در زمان درست خیش و با بیشترین سود آن برای همه، آنچه می‌خواهید را انجام دهید. آن گونه که می‌خواهید باشید. یا آنچه می را داشته باشید. هدف خود را به صورت یک عبارت تأکیدی بیان کنید. مثلا بگویید من همکنون در حال خلق دوری زندگی موفقیت آمیز هستم. برنامه خود را به صورت مکتوب درآورید و سپس گامهای آشکار بعدی پیش روی خود را بردارید. وقتی که شما مطلبی را به صورت مکرر و با قاطعیت اظهار می کنید، هستی به شما پاسخ مثبت می دهد. و شروع به پرتاب کردن ترهایی به سوی شما می کند. مثلا به شما می گوید، می توانید از اینجا شروع کنید یا از آنجا شروع کنید. این کار را می توانید از این طریق انجام دهید یا از آن طریق انجام دهید. بسیاری از برنامه های شما موجب گسترش راه های چند شاخی مخصوص به خود می شود. به این صورت که اول شما این امکان بلغوه سپس آن امکان بالقوه را امتحان می کنید. و اگر هیچیک از آن دو موثر واقع نشد، سراغ امکان بالقوه دیگری می روید و به این ترتیب دیر یا زود به هدف خود در زمان درست آن می رسید. وقتی که برنامه های خود را به صورت مکتوب ارائه می کنید، ناگهان انرژی خلاق قوی را در وجود خود احساس کرده یا با آن ملحق خواهید شد و در جایی که قبلا تنها مشکلات و موانع را می دیدید شروع به مشاهده ی فرصت ها خواهید کرد شما به این مسئله پی خواهید برد که فرصت ها همه جا و در همه مواقع وجود دارند. گاهی اوقات شما آنها را میبینید و گاهی اوقات آنها را نمی بینید. در اینجا به اصل کاربردی جالبی اشاره می شود که عبارت است از هر آنچه ما به آن اهمیت دهیم بست و گسترش پیدا می کند. اگر افکار ما در درجه نخست بر روی مشکلات و موانع و نقاط ضعف خودمان ما متمرکز شود آنها گسترش یافته و حتی بزرگتر نیز می شوند. اما هرچه ما افکار خود را بیشتر در جهت آنچه میخواهیم می‌خواهیم در زندگی خود انجام دهیم آنگونه که می‌خواهیم در زندگی خود باشیم و آنچه میخواهیم می‌خواهیم در زندگی خود داشته باشیم معطوف کنیم بیشتر به خودمان اجازه تصور زندگی خیالی را داده و آنها در زندگی ما بیشتر بست و گسترش پیدا خواهند کرد نهایت امر را در ذهنتان نگه دارید. همین که قصد و هدف شما محکم شد، راه حل‌های مربوط به مسائل برایتان آشکار می‌شوند یا ممکن است آن چه قبلا برایتان مسئله بود دیگر برایتان اهمیتی نداشته و نامربوط شود. همچنین موانع و مشکلات شما برطرف میشوند. یا اینکه نهایتا ممکن است شما راه آسان و ساده‌ای را برای عبور از کنار پیدا کنید. هنگام انجام عمل ساده نوشتن یک برنامه یک صفحهی، طرح کلی برای موفقیت شما آشکار میشود. به تردیدها و هراس‌های خیش اجازه ندهید که باعث عقب افتادن شما شوند. شما در درون خود از هرچه چه لازمه خلق بزرگترین موفقیت رویایتان است برخوردارید. شما دارای ذهن شدیدن خلاقی هستید. بنابراین تنها بر روی هدف خود تمرکز کنید و گامهای آشکار بعدی پیش روی خود را بردارید. اگر شما به کار کردن با این ابزارهای ساده ادامه دهید شاهد ایجاد برخی از تغییرات فوق مثبت در زندگی خود خواهید بود. تصمیمگیری با خودتان است. شما می توانید بهترین مربی خیالی یا بدترین دشمن خودتان باشید. تمرکز خود را بر آرزوها و اهدافتان حفظ کنید و به این ترتیب با وجود تردیدها و حراسهای خود به آنها دست خواهید یافت. شما همکنون مسیر خود را تعیین کرده اید. بقیه کتاب صرفاً در رابطه با اصلاح مسیر است بخش 2 اصلاح پیوسته مسیر یک هواپیما در بیش از 90 درصد اوقات از مسیر خود خارج می شود با این حال خلبان هواپیما بارها مسیر خود را اصلاح می کند تا اینکه هواپیما وارد مقصد از پیش برنامه ریزی شده خود شود ما با برداشتن چهار گام ساده ای که قبلا اشاره شد مسیر خود را تعیین کردیم اکنون همه چیز بستگی دارد به اصلاح مکرر مسیر خود در هر زمانی که از مسیر اصلی خود دور می شویم. هر تردیدی ما را از مسیر رسیدن به هدف خود که همان تحقق بخشیدن به آرزوی خود است منحرف می‌سازد. هر مشاجری ما را از مسیر خود منحرف می‌کند. ما در هر زمانی که عصبانی، بیمناک یا نگران می‌شویم از مسیر خود منحرف می‌شویم. ما بارها و بارها در هر روز شاهد فراموش کردن آنچه که در قلب خیش می‌دانیم درست است هستیم. ما فراموش می‌کنیم که چه کسی هستیم. فراموش می کنیم که دارای چه ذهن به شدت خلاقی هستیم و بالاخره اینکه فراموش می چه هدایای بینظیری را برای اعتاب جهانیان در اختیار داریم ما باید بارها و بارها به خود یادآوری کنیم که مسیر خود را از نو تنظیم کنیم وقتی که این کار را به صورت پی در پی انجام دهیم به مقصد خود خواهیم رسید این امر قطعی و اجتناب ناپذیری است اولین و بدیهیترین راه برای حفظ حرکت خود در مسیر صحیح این است که مقصد خود را همواره به یاد داشته باشید. این کار بسیار بدیهی است. با این حال ما هر از گاهی مقصد خود را فراموش می کنیم و آنچه که میدانیم باید بارها و بارها به ما یادآوری شود. آرزوها و اهداف خود را همواره به یاد داشته باشید. همواره به یاد داشته باشید که شما فرد بینظیر و خلاقی هستید. یادتان باشد که ذهن خلاق خود را بر روی آرزویتان متمرکز کنید و یادتان باشد که در برداشتن گام‌های لازم برای محقق شدن آن آرزو مداومت نشان دهید. چهار گامی را که در این برنامه ریزی ساده بانها با اشاره شد فراموش نکنید. نگذارید که تردیدها و حراسها شما را وادار کنند که در کار خود تعلل ورزید، ناامید شوید یا حتی نتوانید از همان اول کار خود را شروع کنید. هر از گاهی بنشینید و چشمانداز آرمانی خود را بخوانید در صورت لزوم آن را بروز کنید حداقل دو بار در سال بنشینید و اهداف خود را به صورت عبارت های بازنویسی کنید آنها را بروز کنید و در ذهنتان نگه دارید من یک کپی از اهداف خود را که به صورت عبارت های بازنویسی شداند در جیب پشت خود نگهداری می کنم و در بسیاری از اوقات آن را از جیب خود بیرون کشیده و مرور می کنم. ترهای مربوط به هر یک از اهداف اصلی را به روز رسانی کنید. این کار آنقدرها هم که فکر می‌کنید زمان نمی‌برد. با این کار، های بعدی که باید بردارید برایتان آشکار خواهد شد و شما به این موضوع پی خواهید برد که در صورت داشتن باور قوی، قادر خواهید بود گامهای بعدی را به شکل ساده و راحت و به شیوه سالم و سازنده بردارید. رؤیاهای خود را همیشه به خاطر داشته باشید. داشتن هدفی روشن را برای سال جاری فراموش نکنید. مس میخواهید به چه هدفی نائل شوید؟ دستیابی به آن هدف چه مقدار درآمد برایتان ایجاد خواهد کرد؟ آیا اهدافتان به محض اینکه از شما سوال کردم به ذهنتان خطور کرد یا اینکه مجبور شدید راجع به آن فکر کنید؟ اهداف خود را در ذهنتان نگه دارید؟ یک راه مهم برای برگشتن به مسیر درست در حین منحرف شدن از آن به واقع این است که آنچه میدانید را به یاد داشته باشید و مقصدتان را از نظر دور ندارید؟ انواع مختلفی از راههای دیگر برای اصلاح مسیرتان وجود دارد. این دو فصل آخر را مورد بررسی قرار داده و ببینید که در کجا باید نکتههای را مورد توجه قرار دهید و در کجا باید موردی را در صورت لزوم تغییر دهید؟ بر روی معموریت و هدف خود تحمل کنید بسیاری از افراد وجود دارند که طی سالها، دهه یا حتی تمام طول عمرشان در حالت انحراف از مسیر اصلی به سر زیرا کاری که انتخاب کرده اند برایشان مناسب یا ارزا کننده نبوده است. چگونه کاری را پیدا کنیم که برای ما من مناسب است؟ طرح این سوال به تنهایی گامی است که در جهت صحیح برداشته شده است. طرح سوال و تلاش برای پیدا کردن پاسخ صحیح برای آن ما را وادار می کند که به جای سختتر کار کردن پوشمندان تر کار کنیم. اما چگونه می توانیم کار درست را پیدا کنیم؟ در این خصوص قبل از هر چیز قدری فکر کردن راجع به دو جنبه مهم از زندگیمان یعنی معموریت و هدفمان در زندگی قطعا می تواند مفید واقع شود وقتی که ما نسبت به معموریت و هدف خود در زندگی آگاه شویم ذهن خلاق خود را در جهتی متمرکز می کنیم که ما را به سوی راضی کننده ترین و پربارترین مکانها هدایت می کند واژه معموریت از واژه لاتینی که معنی آن صدا زدن است گرفته شده است واژه مأموریت همریشه با واژه صدا می باشد. مأموریت شما همان صدای فراخواننده شما در زندگی است. اگر چشماندوز آرمانی خود را تصور کرده باشید، در جایی از آن رویای پربار و آتی، مأموریت شما در حال صدا زدن شما میباشد. کنت نربورن این موضوع را در بخشی از کتاب نامه‌های برای فرزند من به زیبایی بیان کرده است. کار را به عنوان مأموریت در نظر بگیرید. کار شما باید همان باشد که شما را برای انجام کاری که دوست دارید فراخواند و کار شما باید همان باشد که بیان کند شما کیستید و چه مطلبی برای گفتن به جهانیان دارید. کار شما به خصوص باید این باشد که به شما اجازه دهد به دیگران عشق ببرزید یک برگ کاغذ بردارید و در بالای آن عبارت معموریت یا آنچه مرا فرا میخواند را بنویسید سپس به روح خود اجازه دهید که اوج بگیرد کار فوق‌العاده قوی دیگری که باید انجام دهید، آنچه میتواند می‌تواند شما را از سالها سردرگمی و انحراف از مسیر درست نجات دهد، این است که برگه کاغذ دیگری را بردارید و در بالای آن عبارت هدف من را بنویسید. سپس دوباره به روح خود اجازه دهید که اوج بگیرد. شما ممکن است با نوشتن حتی یک پاراگراف هم مشکل داشته باشید. در این صورت، نوشتن را برای مدتی کنار بگذارید و پس از مدتی دوباره به کار نوشتن برگردید. به طور مرتب از خود بپرسید هدفتان در زندگی چیست این یک سوال مهم است که می توانید برای خود مطرح کنید زیرا شما را وادار می کند به گونه ای فکر کنید که تصویر بزرگ را با بالاترین درجه کیفی ببینید شما دیر یا زود پاسخی را پیدا خواهید کرد که مشابه حقیقت است و در جایی از اعماغ درونتان وجود دارد شما از پاسخی که به آن دست یافته ممکن است شگفت زده شوید یا ممکن است شگفت زده نشوید هدف شما که تنها در یک پاراگراف بیان می شود، می تواند به چراغ راهنمای قوی برایتان تبدیل شود. که به شما کمک می کند تا در هر یک از روزهای عمرتان بهترین تصمیمات بزرگ و کوچک را بگیرید. جیمز الین در کتاب همانطور که شما فکر می کنید، سخن فعال ای را بیان کرده است. تا زمانی که فکر به هدف متصل نشود، هیچ دستاورد هوشمندانه ای حاصل نمی شود. شما دارای هدف منحصر به فردی برای زندگی کردن هستید. و برای نائل شدن به آن هدف استعدادها و توانایی‌های منحصر به فردی به شما داده شده است. وقتی پی ببرید که آن هدف چیست، قادر خواهید بود که دنیایی از سحر و معجزات را خلق کنید. نیمه پر لیوان و منافع نهفته در ناملایمات را ببینید. من دوستی دارم که زرنگ، با استعداد و پرانرژی است و با این حال همواره برای پرداخت اجاره منزل خود تقلا می‌کند. او در یکی از روزها از من سؤال طولانی و بی‌سرطهی کرد. که آن را به این شکل جمع کردم من به او گفتم که خب به عبارت دیگر سوال شما این است که اگر آنقدر زرنگ هستید چرا هنوز ثروتمند نشده اید او گفت: بله همینطور است سپس من به او گفتم این سوال مهمی است که می توانی برای خود مطرح کنی من سال هاست که او را خوب میشناسم او را به قدری خوب میشناسم شناسم که میتوانم به دقت آنچه در او دیدم را به او بگویم من به او گفتم فورا دو مورد به ذهن من خطور کرد یکی اینکه که تا اندازه‌ای شاید به طور ناخودآگاه به نظر میرسد که شما به دلایلی فکر میکنید واقعاً لیاقت موفق شدن را ندارید و یا شاید فقط فکر میکنید که خلق آنچه میخواهید سخت‌تر یا تنش‌زا‌تر از حد توانتان است. فرایند باور درونی را انجام دهید. عمیق‌ترین باورهای خود را به راستی مورد ملاحظه قرار دهید و به عبارت تأکیدی مانند اینکه من در حال خلق موفقیت کلی مالی به شکلی ساده و راحت و به شیوهی سالم و سازنده هستم برسید. عبارات تأکیدی مخصوص خود را بر زبان جاری سازید. اگر عبارت تأکیدی درست را پیدا کنید، به کمک آن می توانید بر کلیه انواع تردیدها و حراسها غلبه کنید و به مسیر درست خود بازگردید. مطلبی شبیه به این را به طور مرتب تکرار کنید و ببینید چه اتفاقی می افتد. من همکنون در حال ایجاد موفقیت کلی به شکلی ساده و راحت و به شیوهی سالم و سازنده هستم. موفقیت کلی برای شما به چه معناست البته تعریف آن بستگی به نظر خودتان دارد و هرچه چه آن را برای خودتان تعریف کنید زودتر آن را تجربه خواهید بخواهید کرد. من گفتم در اینجا به دومین موردی اشاره می کنم که با پیگیری شما دوباره به ذهنم خطور کرد و آن این است که شما اغلب تمایل دارید به جای تمرکز بر راه حلها بر روی مسائل متمرکز شوید شما زمان زیادی را صرف نگاه کردن به نیمه خالی لیوان می کنید اغلب میگویید که کارها سخت‌تر از آنچه که قبلا بودند شدند افسوس، افسوس، افسوس که این روزها رقابت بیشتری وجود دارد معنی این افسوسها این است که شما فکر می کنید اکنون فرصتهای موجود کمتری نسبت به آنچه قبلا وجود داشت در اختیارتان می باشد. باورهای نادرست ما به خودی خود حقیقت ندارند اما اگر باور کنیم که آنها درست هستند به حقیقت پیوستن آنها را تجربه خواهیم کرد. شما می توانید فکر خود را عوض کنید و بگویید این طرز تفکر که موفق شدن سختتر از آنچه قبلا بود شده است ابدا حقیقت ندارد. این فکر تنها هنگامی حقیقت پیدا می کند که شما همچنان به درستی آن باور داشته باشید. هرچند مجموعی فوق زیادی از افراد که شامل من نیز می شوند باورهای کاملا متفاوت یا منفی نسبت به آن داشته باشند. فرصت ها در همه جا حضور دارند، آنها همیشه در همه جا بودند، این فقط ما هستیم که آنها را ندیده ایم. زیرا خود را آماده دیدن آنها از طریق تنظیم روشن مسیرمان نکرده ایم، شما میتوانید فکر خود را با طرح این سوال از خود که در مسائل و مشکلاتی که با آنها مواجه میشوید، چه فرصت ها، مزایا و هدایای نهفته است، عوض کنید. میتوانم بگویم که اون متوجه منظور من شد. او از من تقاضا کرده بود که به او بازخورد بدهم و من هم به سریح ترین شکل ممکن به او بازخورد دادم. دفعه بعد که با هم صحبت میکردیم او یک مطلب خوب دیگری را به سخنانش افزود. آنچه که من در اوایل این کتاب نیز به آن اشاره کردم. او به من گفت میدانی؟ همچنان که به عقب نگاه میکنم حقیقت دیگری را میتوانم ببینم و آن حقیقت این است که من فاقد استقامت لازم در کارهایم بودم. من بعضی از طرحهای بسیار خوب را خیلی زود و فقط به خاطر برخورد با برخی از موانع رها کردم اکنون تصمیم گرفتم که پر تر بوده و همواره به یاد داشته باشم که ترجیحند به جای تمرکز بر مسائل و مشکلات بیشتر بر روی فرصت تمرکز کنم من اخیرا چندین بار با او صحبت کردم و تغییر جهت آشکاری را از تمرکز بر روی انرژی منفی به سوی تمرکز بر انرژی مثبت در او احساس میکنم های تأکیدی که او به حقیقت آنها پی برده، به او کمک می‌کند باورهای قدیمی و محدود کننده را تغییر دهد. وقتی که او در دام مسائل و مشکلات گرفتار می‌شود، خود را برای یافتن ها، مزایا و هدایا به چالش می‌اندازد و استقامت او با در نظر گرفتن یک هدف تا زمان رسیدن به آن در حال افزایش خواهد بود. من شک ندارم که او دیر یا زود آرزوهای خود را تحقق خواهد بخشید. البته به این شرط که به اصلاح مسیر خود ادامه دهد، مواظب رفتار خود باشد و به سمت های فکری قدیمی که از آرزوهای وی پشتیبانی نمی‌کنند نرود. با مشارکت همه زندگی کنید و کار کنید. این کار کلید بزرگی برای موفقیت پیوسته در عرصه تجاری و شخصی است. موضوعی است که مدت‌ها به صورت شهودی نسبت به آن آگاه بودم و است که از اولین روزهای دوران زندگیم تمام کوشش خود را کرده تا آن را عملی سازم شما هرچه بیشتر با مشارکت دیگران زندگی و کار کنید شادتر، سلامتتر و موفقتر خواهید بود تا به امروز هنوز تعجب می کنم که چطور بسیاری از افراد و بسیاری از کسب و کارها و شرکتها چه بزرگ و چه کوچک این موضوع ساده را درک نمی کنند. موفقیت پیوسته بر پایی مجموعی از همکاری ها از نوع برنده برنده ساخته می شود. شما هرچه به شکل موثرتری با مشارکت خانواده و دوستان خود خودکار کنید موفقیت شخصیتان بیشتر خواهد شد. همچنین شما هرچه به شکل موثرتری با مشارکت مشتری ها تأمین کنندگان و مهمتر از همه کارمندان خودکار کنید کسب و کارتان در بلند مدت موفقیت آمیزتر خواهد شد. تنها موارد فوق نیست، بلکه وقتی شما با همکاری دیگران زندگی و کار می کنید کل تجربه زندگیتان به مراتب لذت بخشتر و راضی کننده تر می شود. من در واقع نمیفهمم چرا بسیاری از مردم این موضوع را درک نمی کنند. برای من روشن است که همکاری و مشارکت با دیگران قویترین شکل موجود تعامل اجتماعی است. اگر شما بدون همکاری با دیگران کار کنید، ممکن است راهی را در پیش بگیرید که موجب انحرافتان از مسیر درست گردد. و برگشتن شما به مسیر درست ممکن است بسیار دشوار گردد. من نمیفهمم که چرا بسیاری از حکومت این موضوع را درک نکردند که یک حکومت با تک تک مردم خود شریک است و لازمه زنده ماندن و رشد ملت این است که هر ملتی چه بخواهد و چه نخواهد باید با سایر ملت ها مشارکت و همکاری داشته باشد. من نمیفهمم چرا بسیاری از کارفرمایان با مشارکت کارمندان خود کار نمی کنند. و به عنوان مثال مزایای فراوان حاصل از سهم ساختن کلیه کارمندان در سود شرکت را درک نمی کنند. من نصف سودهای شرکت خود را با کارمندان خود تقسیم می کنم. مردم فکر می کنند که این کار از روی سخاوتمندی من بوده، و اینکه های من از انجام این کار خالصانه و است اما من به سرعت به آنها می گویم که این کار را صرفا برای انگیزه های شخصی یا حداقل برای ارزای منافع شخصی خود انجام می دهم. زیرا به این حقیقت آگاه هم که وقتی کارمندان به شکل قابل توجهی در سود شرکت سهیم شوند شبیه صاحبان شرکت فکر و عمل خواهند کرد و به این ترتیب ما به شکل قابل توجهی سود بیشتری خواهیم برد. هر یک از کارمندان قادرند فروش را افزایش یا هزینه ها را کاهش دهند یا هر دو کار را انجام دهند و به این وسیله موجب افزایش سود خالص کردند. من به این حقیقت آگاه هم که در نتیجهسهیم کردن کارمندان در نصف سود شرکت خود، سودی را به دست خواهم آورد که به مراتب بیشتر از دو برابر سودی است که در غیر این صورت می توانستم به دست آورم. سود قبل از محاسبه مالیات بیشتر شرکت های انتشاراتی 5 تا ده درصد است. در آن زمان برای شخص واقعا احمقی مثل من این بدان معنی بود که به ازای هر دلار حاصل از فروش 5 تا ده سنت به سود خالص صورت حساب سود و زیان این شرکت ها افزوده خواهد شد. سود قبل از محاسبه مالیات شرکت ما 20 تا 25 درصد است من میدانم که این سود بالا به علت سحیم ساختن کارمندان در سود شرکت میباشد من در هر روزی که در اداره حضور دارم شاهد اثرهای طرح سهم سازی کارمندان در سود شرکت هستم اعداد دروغ نمیگویند ما با سهم سازی کارمندان خود در نصف سود شرکتمان سود خالصی کسب میکنیم که به مراتب بیشتر از دو برابر آن سودی است که در صورت حساب سود و زیان سایر شرکت ها مشاهده میشود بوسهیم کردن سخاوتمندانه دیگران نه تنها زیان نمی‌کنیم بلکه در نهایت سود بیشتری نصیب می می‌شود این یکی از عالی‌ترین موقعیت‌هایی است که می‌توان برای بازی بورد بورد تصور کرد سهم کردن کارمندان در سود شرکت نمونه آشکاری از قدرت کار کردن با مشارکت دیگران است من در هر هفته از هر سال این روند را رو در حین کار مشاهده می‌کنم این روند به این صورت است که وقتی یک شرکت کارمندان خود را در سودهای به دست آمده سحیم می کند، کارمندان آن سختتر و حوشمندانه تر کار کرده و در نتیجه سودهای حاصل افزایش خواهند یافت. با این کار، همه، صاحبان شرکت، کارمندان و مشتری ها در بلند مدت برنده خواهند بود. مشارکت و همکاری با دیگران بر پایه احترام، قدردانی و حمایت متقابل استوار است، موارد ذکر شده اساس هر نوع رابطه میزی را تشکیل می دهند با مشارکت دیگران کار کنید تا بانها با کمک کنید آرزوهای خود را تحقق بخشند به این ترتیب شما نیز از کلیه همایت های لازم برای تحقق آرزوهای خود برخوردار خواهید شد ریان آیسلر در کتاب برجسته خود به نام قدرت مشارکت راجع به اثرهای کار کردن با مشارکت دیگران مطالبی را به شکل استادانه به رشته تحریر درآورده است او در کتاب خود به تفصیل فراوان و به شکل بسیار جرف اندیشانه نشان می‌دهد که یکی از مؤثرترین و مفیدترین کارهایی که می‌توانیم انجام دهیم این است که در هر رابطه‌ای در زندگی خود از جمله رابطه با خود، خانواده‌های خود و دوستان نزدیک خود، کار و جامعه خود، ملت خود، جهان هستی خود، نیروهای طبیعت و عالم معنا آگاهانه به سمت مشارکت بهتر حرکت کنیم. زندگی کردن و کار کردن با مشارکت بهتر با دیگران چالش بزرگی برای همه ماست. آیسلر این چالش بزرگ را کار بزرگ نامیده و همه ما را با این گفته قاطعانه و دوراندیشانه خیش به چالش دعوت می کند. کار بزرگ پیش روی ما عبارت است از نوآفرینی و خلق مجدد جامعه ما به ای که جامعه جدید به جای مبتنی بودن بر تسلط و حکمرانی بر پایه مشارکت و همکاری ساخته شود. کار پیش روی ما کار دشوار و چالش برانگیزی است و همه ما هر یک بیشیوه منحصر به فرد و از روی احساس خیش میتوانیم با تبدیل شدن به شرکای بهتر برای هر کسی که میشناسیم و البته هر فرد روی زمین سهمی در این کار بزرگ داشته باشیم. به شکست اجازه ندهید که شما را متوقف کند. هر فرد موفقی که میشناسم از جمله خودم از شکستهای این جهان بی نبوده نبود است. به شکست به عنوان آنچه که هست یا حداقل به عنوان آنچه که اگر نگرشتان مثبت بود میتوانست باشد نگاه کنید. هر شکستی درس ضروری است که در طول مسیر منتهی به موفقیت قطعی خود لازم است یاد بگیرید. از شکست نترسید بلکه به آن به عنوان یک ابزار یادگیری ضروری نگاه کنید. هر شکستی به ما مطالب زیادی را میآموزد. هر شکست حداقل به ما میآموزد که چه کاری را انجام ندهیم و این بسیار ارزشمند است تمام افراد موفقی که من با آنها صحبت کردم عاشق تعریف کردن داستانهایی از شکستهای خود بودند شکستهای ما همان هزینه آموزش زندگی واقعی به ما هستند ما از اشتباهات خود درس می‌گیریم. اخیراً به عبارت بسیار زیبایی برخوردم که روی برچست به سپر یک خودرو نوشته شده بود آنقدر شکست بخورید تا پیروز شوید من دوستی دارم که به عنوان بازیگر در فیلمی به کارگردانی و نمایش نام نویسی جان کلارک دوناهو محشر به پا کرده است. هر زمان که من با او صحبت می کنم او حرف با ارزشی برای عرضه کردن دارد. او اخیرا مطلبی شبیه این را بیان کرده است. چرا ما اینقدر از شکست خوردن می ترسیم؟ ما باید آن را جشن بگیریم؟ وقتی بتوانیم به خود اجازه دهیم که شکست بخوریم چه در مقیاس کوچک و چه به صورت شکست های چشم گیر بزرگ توسط روح خلاق خود به سوی هدف بزرگی هدایت میشوییم. او در عمل گفته است: شکست با را جشن بگیرید. اگر شکست خوردید مهمانی مفصلی را برای خود راه بیاندازید و جشن بگیرید یا اینکه حداقل برای خود یک هدیه خوشحال کننده بخرید و از خود تعریف و تمجید کنید مثلا بگویید، شما با شجاعت و از خودگذشتگی برای رسیدن به هدفتان تلاش کردید. آفرین بر شما. چه کسی میداند؟ شاید دفعه بعد یا دفعه بعدتر موفق شوید. به شکست اجازه ندهید که شما را متوقف کند. تلاش خود را برای رسیدن به آرزوهایتان ادامه دهید. تنها شکست واقعی متوقف شدن و دست از کار کشیدن است. بقیه شکست ها همگی مراحلی هستند که در مسیر رسیدن به آرزوهایتان باید با آنها مواجه شوید. اجازه ندهید که آرزویتان بیش از حد کوچک باشد مسئله دیگری که موجب می شود افراد از مسیر درست منحرف شوند یا از همان اول موفق به تنظیم مسیر خود نشوند این است که آنها جرأت نمی کنند به دنبال آرزویی بروند که واقعا آن هستند و به جای آن به هدفی که به مراتب چالش کمتری می تلبد و امتر، خسته کننده تر و خفه کننده تر است راضی می شوند آنها به جای رفتن به دنبال کاری که با آن علاقه دارند، به انجام یک وظیفه مختصر راضی میشوند. این وظیفه من و به طور قطع بخشی از رسالت و هدف من است که به تشویق نمودن هر کسی که قابل توسعه ترین آرزوهای ممکن را در ذهن خود تصور میکند، ادامه دهم. با چشماندوز آرمانی خود که بزرگترین آرزویتان است، شروع کنید و به هر شکلی که میتوانید در جهت رسیدن به آن کوشش کنید. خلاصه این که طرز فکر و آرزوهای بسیاری از افراد بیش از حد کوچک است. اگر شما کوتاه فکر باشید، هرچه خلق می کنید، کوچک باقی خواهد ماند. به دنبال بزرگترین آرزوهای خود بروید. شما هرگز از این کار پشیمان نخواهید شد. من هرگز کسی را ندیدم که به دنبال بزرگترین آرزوهای خود رفته باشد و بعداً از کار خود پشیمان شده باشد. شما صرف نظر از آنچه که ممکن است برایتان اتفاق بیفتد، حتی اگر یک شکست فوق العاده باشد افسوس نخواهید خورد زیرا آرزوهای خود را مورد تشویق و حمایت قرار داده اید برای روح خود فرصتی فراهم ساخته اید که اوج بگیرد شما از این کار رضایت و خرسندی را به دست خواهید آورد که فراتر از آن است که تاکنون تجربه کرده اید نویسندهی بزرگ به نام گوته طرز فکر عالی داشته است که در اینجا به آن اشاره می شود. هر کاری را که می انجام دهید یا خیال می کنید که می انجام دهید، شروع کنید. شجاعت شما به خودی خود موجب شکوفایی استعداد ذاتی، توانایی و قدرت افسونگری شما میگردد. هر کاری با آرزوی شما شروع می شود. بنابر این آرزوی کنید که قابل توسعه باشد. وقتی که شما به خودتان اجازه می دهید آرزوی بزرگی را در سر بپرورانید و به هر شکلی که می توانید دنبال آن بروید، درخواهید یافت که از توانایی‌های منحصر به فرد خاص خود و حتی از استعداد ذاتی، توانایی و قدرت افسونگری منحصر به فرد خاص خود برخوردارید. با تردیدهای خود کنار بیایید. من از روی تجربه شخصی خود بسیار خوب می‌دانم که هرچه آرزوی شما بزرگتر باشد، تردیدها و های شما قوی‌تر و تکرار تر خواهند بود. و اینکه آن تردیدها و هراس ها ممکن است به سرعت بر آن آرزوی شکننده غلبه کرده و آن را در هم شکنده. اما ما چگونه میتوانیم بر این مشکل بسیار جدی غلبه کنیم؟ من تنها از طریق امتحان کردن دریافتم که میتوانم تا حدودی با تردیدها و هراس خود وارد مذاکره شوم. به منتقد درونی سرسخت خود و همه آن دست از نداهای درونی ترسآور دیگر گفتم. یک یا دو سال به من مهلت دهید تا به عنوان یک تجربه به دنبال آرزوهای خود رفتن را به سبک خاص افراد تنبل دارای تیپ شخصیتی یه و به شکل ساده و راحت و به شیوه سالم و سازنده امتحان کنم خودتان این کار را به عنوان یک تجربه امتحان کنید برای این منظور یک یا دو سال به خود مهلت دهید در طول آن زمان فقط هر تعداد اقدامی را که به نظر خود قادر به انجام آن هستید انجام دهید هر زمان که دوست داشتید کارتان را برای استراحت کردن متوقف کنید. بعضی وقتها به خودتان اجازه دهید که تنبل باشید. اگر این کار را انجام دهید، متوجه خواهید شد که در وقت‌های دیگر انرژی بسیار بیشتری دارید. با تردیدها و هراس‌های خود کنار بیایید. تا زمانی که این تجربه را امتحان می‌کنید، از تردیدها و هراس‌های خود بخواهید که به مدت یک یا دو سال دست از انتقاد شما بردارند. به شکل ساده و راحت و به شیوهی سالم و سازنده به دنبال بزرگترین آرزوهای خود بروید. این تجربه را امتحان کنید و ببینید که چه اتفاقی میافتد. تردیدها و حراس های خود را تنها به عنوان یک تجربه کنار بگذارید. این تجربه برای من با وجود کلیه تردیدها و حراس هایی که داشتم مؤثر واقع شد. سه اصل ضروری برای موفق شدن به رغم حرفهایی که تردیدها و حراسهای ما برای گفتن به ما دارند، ثابت شده که موفق شدن در امر تجارت یا موفق شدن به عنوان یک هنرمند آنقدرها هم دشوار نیست. این کار به دشواری دانش پرتاب موشک یا جراحی مغز نیست. همچنین برای این کار نیازی به یادگیری ریاضیات پیشرفته یا حتی برخورداری از سطح خاصی از تحصیلات وجود ندارد. اگر شما یک پدر یا مادر باشید می توانید قضیه موفقیت را به این شکل در نظر بگیرید که پرورش و تربیت فرزند کار به مراتب دشوارتر و چالش برنگیزتری نسبت به آفرینش یک کسب و کار یا دوران زندگی موفقیت آمیز است. زیرا در تربیت فرزند قوانین به طور پیوسته تغییر می کنند و فرزندان شما نیز به طور دائم تغییر کرده و راههای جدیدی را برای مخالفت با شما پیدا می شما به عنوان یک پدر یا مادر هرگز متوجه نمی که در تربیت فرزند خود بیش از حد آسانگیر یا بیش از حد سخت گیر شده اید. تفکیک این دو موضوع به شکل پایان نپذیری دشوار است. آفرینش یک کسب و کار یا دوران زندگی هنری موفقیت آمیز به مراتب ساده تر از تربیت فرزند است. زیرا آنها مبتنی بر اصول محکمی هستند که با گذشت صدها سال تغییر نکردند. فناوری به رشد خود ادامه می دهد و انواع مشکلات و فرصت هایی که دارید در حال تغییر هستند اما قوانین اولیه موفقیت همواره یکسان باقی میمانند برای آفرینش یک کسب و کار یا دوران زندگی موفقیت آمیز تنها سه عامل اساسی وجود دارد که باید هرص آنها را با هم داشته باشید در این رابطه وجود تک تک آنها برای موفق شدن ضروری است به طوری که اگر شما یکی از آنها را نادیده بگیرید موفق شدن برایتان به مراتب دشوارتر خواهد شد برای موفقیت در عرصه تجاری و هنری تنها نیاز به سه عامل ضروریست که در ادامه میشنوید یک محصول یا خدمتی را که عاشق آن هستید پیدا کنید بدیهی است که اولین عامل لازم برای خلق موفقیت نوع محصول یا خدمت است کالید موفقیت و رضایتمندی حقیقی در این عرصه پیدا کردن کاری است که عاشق انجام هستید. به همین دلیل است که شروع کردن با چشمانداز آرمانی یا بزرگترین آرزویتان و به ذهن سپردن آن در حین خلق محصول یا خدمت خود کار بسیار خوبی است. اگر می توانستید هر کاری که دلتان خواست انجام دهید چه می کردید؟ اگر پول برایتان عامل مهمی نبود چه نوع زندگی را خلق می کردید؟ در حقیقت عاشق انجام چه کاری هستید با طرح این سوال از خود شروع کنید آنچه چه عاشق آن هستید را انجام دهید تا پول خودش به دنبال شما بیاید و شما در طی این مسیر رضایت و خرسندی را پیدا خواهید کرد که وصف آن در کلام نمی گنجد دو برای بازاریابی کار خود یک راهبرد چند جانبه را توسعه دهید در همان هنگام که محصول یا خدمت خود را خلق کردید، باید به دنبال راهی برای آوردن آن به بازار و فروش باشید. یک راه حل کلیدی آن است که راهبرد برد چند را توسعه دهید که هرگز پاسخ منفی را تحمل نکند. این عزم راسخ را در خود پرورش دهید که هر طور شده راهی را برای فروش موفقیت آمیز کار خود پیدا خواهید کرد. اینجاست که برنامه کتبی بسیار با ارزش می شود. راهبردهای مورد نظر خود را برای تبلیغ و فروش کارتان به صورت کتبی فهرست کنید. مطمئن شوید که راهبردهای فراوانی در اختیار دارید به طوری که اگر تلاش‌های نخستین شما موفقیت آمیز نبود، همیشه راهبرد دیگری هست که بتوانید با آن تکیه کنید. راه‌های مختلف بیشماری برای بازاریابی کار شما وجود دارد. خلاق شوید. دریابید که انجام چه کاری در گذشته برای دیگران موثر واقع شده و همان کار را انجام دهید اگر دیدید که آن کار هم اثر ندارد مورد کاملا جدیدی را امتحان کنید اگر دیدید که آن هم موثر واقع نمی شود به عقب برگردید و یک راه مثبت ارزیابی شده دیگر را که در گذشته موثر واقع شده امتحان کنید اگر دیدید که آن هم موثر نیست کاری را که کاملا غیرعادی و خارج از چارچوب فکری معمول است امتحان کنید برتلار که یکی از بازیگران فیلم های کمدی است این مطلب را بسیار خوب بیان کرده است. بازی چرخ و فلک را به قدر طولانی کنید و به آن ادامه دهید که هر طور شده جایزه حلقه برنجی را نصیب خود کنید. شما در صورت مقاومت کردن دیر یازود به آنچه برایتان موثر واقع می پی خواهید برد. برد.سه. کنترل‌های مالی برقرار کنید. این مورد آخرین تکی از جورچینی بود که موفق به تجسم و بیان آن در جای مناسب خود شدم. با کنترل‌های مالی خوب، شما می توانید حتی با سطح فروش بسیار کم نیز موفق باشید. اما با کنترل‌های مالی ضعیف، بدون توجه به سطح درآمدتان، حتی اگر شما یک میلیاردر، مانند برادران باستر در تگزاس یا صاحب یک شرکت چند میلیارد دلاری مانند شرکت انرون که زمانی به عنوان هفتمین شرکت بزرگ در ایالات متحده به شمار میرفت باشید ممکن است سرمایه خود را یک بار به دهید اما منظور من از کنترل‌های مالی چیست من نسبت به این موضوع بی اطلاع بودم تا اینکه 5 سال پس از آغاز به کار شرکتمان خانمی به نام ویکتوریا کلارک را به عنوان حسابدار خود استخدام کردیم معلوم شد که او جز مجموعی از مهارت‌های حسابداری اطلاعات به مراتب بیشتری را برای عرض کردن به شرکتمان با خدا آورده است. او به من نشان داد که چگونه سود کسب کنم. ما در پنجمین سال پس از تأسیس شرکت من خط تولید خوب و در حال توسعی داشتیم و از چند توضیح کننده خوب برخوردار بودیم که محصولات ما را در سرتاسر سر کشور و حتی در سراسر دنیا می فروختند. اما ما باز هم در آخر هر ماه دچار زیان مالی می شدیم. خانم ویکتوریا وضعیت دفاتر حساب ما را بهبود بخشید و سپس گزارش یک صفحهی را به من ارائه داد که هرگز آن را فراموش نخواهم کرد. زیرا همان یک صفحه به من نشان داد که کنترل های مالی چه هستند و برای پیاده کردن آنها چه باید کرد. این صفحه شامل دو ستون میشد. در ستون سمت چپ نام شرکت در بالای صفحه و در زیر آن درآمد شرکت در سال گذشته نوشته شده بود. خانم ویکتوریا سپس در زیر آن، کلیه هزینه های انجام شده در طی سال گذشته را در چهار گروه عمده هزینه‌های ویراستاری یا توسعه محصول، ساخت و تولید، بازاریابی و هزینه‌های جی اند ای یا مخارج عمومی و اداره یا هزینه های ثابت طبقه بندی و ثبت نموده بود. همچنین در زیر هر گروه هزینه های عمده، هزینه‌ها باز هم به زمینه‌های خاص بیشتری شکسته شده بودند. به عنوان مثال خانم ویکتوریا خزینه‌های جی اند ای را باز هم به چند گروه خاص‌تر دیگر شامل هزینه های اجاره، تسهیلات رفاهی، تجهیزات اداری و غیره طبقه بندی و ثبت نموده بود. به علاوه برای هر هزینه یک نمودار درصدی ترسیم شده بود که با یک نگاه درصد درآمد سالیانه صرف شده ما را برای گروه‌های ای هم برای گروه خزینه‌های عمده‌ای از قبیل خزینه‌های میراثداری، ساخت و تولید غیره، و هم برای گروه هزینه های خواستر از قبیل هزینه اجاره تسهیلات، تجهیزات اداری و غیره نشان میداد ستون سمت راست چشم من را برای دیدن برخی از مسائل گشود در این ستون و در زیر عنوان متوسط های صنعت به طور دقیق به تعداد همان گروه های هزینه معرفی شده نمودارهای درصدی فهرست شده بود که سهم هزینه ها را از درآمد در یک شرکت متوسط صنعتی نشان میداد مقایسه گروههای مختلف هزینه ای در یک نگاه به دقت به من نشان داد که حزینه های ما در کجاها از کنترل خارج شدند. در رابطه با حزینه های ویراستاری ما تقریباً 44 درصد از درآمد خود را صرف توسعه پروژههای خود می کردیم و این در حالی است که سهم ها از درآمد در یک شرکت متوسط صنعتی حدود 25 درصد است در رابطه با حزینه های ساخت و تولید ما 38 درصد از درآمد خود را صرف هزینه‌های خود میکردیم. و این در حالی است که سهم هزینه‌ها از درآمد در یک شرکت متوسط صنعتی 29 درصد است. در رابطه با هزینه‌های بازاریابی، ما تنها دو درصد از درآمد خود را صرف هزینه‌های خود می‌کردیم و این در حالی است که سهم هزینه‌ها از درآمد در یک شرکت متوسط صنعتی 11 درصد است. در رابطه با هزینه‌های های ای، سهم هزینه‌ها از درآمد ما 25 درصد بوده. که اتفاقا با این سهم در یک شرکت متوسط صنعتی برابر میباشد. آن یک صفحه شبیه تصویر کلی بود که شرکت ما را به طرزی که قبلا هرگز ندیده بودم به من نشان میداد. ویکتوریا با این گفته سخنان خود را جمبندی نمود. مشکل شما در اینجاست که درآمد خود را خیلی بیش از حد صرف هزینده های ویراستاری و ساخت و تولید میکنید ولی برای بازاریابی به قدر کافی هزینه نمیکنید. سهم خزینه‌های ای شما از درآمدتان نیز درست با این سهم در یک شرکت متوسط صنعتی همتراز است. ناگهان احساسی شبیه این به من دست داد که یک حباب چراغ در بالای سرم روشن شده است. آنچه به ذهنم می رسید بسیار ساده و روشن بود. اگر شما درصد خزینه‌های از درآمد شرکت را برای چهار گروه خزینگی عمده، یعنی وراثتاری، بازاریابی، ساخت و تولید و جی ان ای جمع میزدید متوجه می شدید که در مجموع صد و نه درصد از درامد شرکت ما صرف هزینه های عمده شده که این رقم برای شرکت ما به معنی ضرر 9 درصدی بوده است. اما جمع سهم هزینه ها از درآمد در ستون متوسط های صنعت 90 درصد بود که این رقم به معنی سوددهی 10 ده درصدی برای شرکت متوسط نوعی به اندازه ما در صنعت می باشد. ما در طی چند ماه آینده با کم کردن هزینه‌های ویراستاری، ساخت و تولید و افزایش مخارج بازاریابی کنترل‌های مالی را اعمال نمودیم. هر چند کاهش‌های صورت گرفته در هزینه ها خیلی جالب توجه نبود، ولی برای موفقیت شرکت ضروری بود. ظرف مدت کوتاهی شرکت ما سودآور شد و از آن زمان به بعد همچنان سودآور مانده است. خانم ویکتوریا، من تا ابد از شما سپاس گذارم از شما متشکرم که به من نشان دادید که کنترل های مالی به طور کلی چه هستند. از شما متشکرم. ما در هر سال دو یا سه بار جلسات مالی برگزار می کنیم. خانم ویکتوریا در آغاز سال برآوردهای خود از درآمد و حذینه های سال آتی را که به گروه های مفصل نیز شکسته شدند به ما ارائه می دهد. ما در پایان دوره چهار ماهه یا شش ماهه، حزینه واقعی آن دوره را در مقابل آنچه چه قبلا برآورد کرده بودیم، مورد بازنگری قرار می دهیم. ما حتی هر هزینه کوچکی را مورد توجه قرار می دهیم و مطمئن می شویم که آن هزینه با آنچه چه شده مقایرت نداشته باشد. ویکتوریا در چنین شرایطی مطالب شبیه به این را خواهد گفت. هزینه های پست ما از مقدار برآورد شده یک و یک ده همه درصد از درآمدمان به یک و سه ده همه درصد از درآمدمان رسیده است اکنون چرا باید اینگونه باشد؟ و به این ترتیب ما خواهیم نشست و موضوع هزینه پست را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم. تا ببینیم که آیا ما به آنها اجازه داده ایم که بیش از حد معقول از کنترل خارج شوند یا آنها به دلایل دیگری از کنترل خارج شدند ما اکنون با کنترل‌های مالی سفت و سختی شرکت خود را اداره می‌کنیم. توسعه محصول، بازاریابی موثر آن و کنترل هزینه‌ها سه عنصر ضروری برای موفق شدن هستند. در یک شرکت بزرگتر، هر یک از این کارکردهای مختلف را افراد مختلفی مدیریت می‌کنند. اما اگر شما یک شرکت کو... اگر شما صاحب یک شرکت نوپای کوچک یا هنرمندی را هستید، چند بار در ماه بنشینید و کلاه بازاریابی خود را قاضی کنید و حداقل هر سه ماه یک بار بنشینید. کنترل های مالی خود را برقرار نموده و آنها را مورد بازنگری قرار دهید من در اواخر بیست سالگی عضو یک گروه موسیقی راک بودم وقتی به گذشته نگاه میکنم سخت دچار تعجب می شوم که چگونه ما در این گروه حدود دو سال دوام آوردیم زیرا ما اصلا مدیریتی نداشتیم و فاقد هرگونه بازاریابی و کنترل های مالی بودیم تنها دلیل دوام آوردن ما در این گروه این بود که ما به زندگی کردن با درآمد بسیار کم عادت کرده بودیم اگر من در آن زمان آنچه را که اکنون میدانم میدانستم حداقل یک یا چند بعد از ظهر در ماه با سایر اعضای گروه می نشستم و به آنها می میگفتم ببینید ما داره محصولی از خود هستیم. ما در حال ساختن آهنگ موسیقی خوبی هستیم اما هیچ مدیری نداریم. بنابراین حداقل تا مدتی مجبور خواهیم شد که به تنهایی عضای خودمان را مدیریت کنیم. اما ما برای مدیریت گروه خود باید چه کارهایی را انجام دهیم. پاسخ به این سوال در آن زمان آشکار بود. ما برای پیشبرد امور گروه خود نیاز به یک برنامه با راهبرد جانبه داشتیم. اولین گامی که باید برمی داشتیم نیز آشکار بود. ما های موسیقی زیادی داشتیم که ارزش مطالبه آنها کمتر از مطالب نسخه اصلی نبود. ما باید یکی از آنها را ضبط می‌کردیم و به نحوی از تولیدکنندگان می‌خواستیم که آن را تولید کنند تا به این ترتیب در هر جایی که اجرا می‌کردیم، محصولی برای فروش داشته باشیم. سپس باید به دنبال راه‌های دیگری برای فروش آلبوم خود میگشتیم اما من در آن زمان آنچه را که اکنون می‌دانم نمی‌دانستم ما در آن زمان عنصر اول از میان انصر لازم برای موفق شدن یعنی محصول خوب را در اختیار داشتیم کاری را انجام می‌دادیم که عاشقش بودیم اما از آنجا که فاقد عناصر بازاریابی و کنترل‌های مالی بودیم زیاد دوام نیاوردیم ضرب المثل معروفی است که می‌گوید افراد احمق هرگز از اشتباهات خود درس نمی‌گیرند افراد زرنگ از اشتباهات خود درس می‌گیرند و افراد عاقل از اشتباهات دیگران درس میگیرند. شما نیز می از اشتباهات من درس بگیرید و محصول یا خدمت درست را برای عرض کردن پیدا کنید. همراه با سرسختی به بازار یا بیان ادامه دهید و کنترل های مالی را برقرار کنید. آنچه گفته شد، فرمول موفقیت است. تکنیک حل و فصل مشاجره را یاد بگیرید و تمرین کنید. من تا به حال به کسی بر نخوردم که چشمنداز آرمانی وی شامل جر و بحث کردم و درگیری باشد. شما مسیرتان را با تصور چشمنداز آرمانی خود و برداشتن گامهای ملموس در جهت محقق ساختن آرزوهایتان تعیین کرده اید. حال اگر در طول این مسیر متوجه شدید که در دام یک مشاجره گیر افتاده اید چه در یک رابطه فردی و چه در یک اقدام بزرگ تجاری در که این موضوع که با مشاجری کردن راه به جایی نخواهید برد برایتان بسیار مفید خواهد بود. به محض اینکه درگیر یک مشاجره می, شوید، می توانید به طور قطعی بدانید که از مسیر درست منحرف شده اید و قبل از اینکه بتوانید به مسیر درست بازگردید، باید گامهایی را که برای حل و فصل مشاجره ایجاد شده بردارید. به بیان ساده‌تر باید بگویم که به راه انداختن مشاجره ها به طور قطع شیوه موثری برای برقراری ارتباط با دیگران نیست مشاجرات بیش از آنکه مفید باشند آسیب میرسانند تا کنون هیچ کس در تاریخ بشریت در وسط یک مشاجره داغ نیستاده و به طرف مقابل نگفته است راستی بهتر است بدانی که نظرت راجع به آن موضوع صحیح است من عقیده خود را عوض کردم من کاملا با شما موافق هستم این امر هرگز اتفاق نیفتاده و نخواهد افتاد زیرا به محض شروع یک مشاجره برقراری ارتباط مؤثر غیر ممکن می‌گردد اما در طول یک مشاجره چه اتفاقی افتد؟ اتفاقی که میافتد این است که هر یک از دو طرف دعوا عصبانی و سرخورده می‌شوند زیرا به حرفی آنها گوش داده نمی شود و هیچ یک از آنها نیز به حرفهای طرف مقابلشان گوش نمی‌دهند دهند. همچنان که مشاجره شدت میگیرد خشم و عصبانیت کامل بر افراد مسلط شده شروع به گفتن حرفهایی می کنند که حتی قصدی از گفتن آنها را هم ندارند. وضعیت عاطفی آنها در اصل شبیه وضعیت عاطفی کودکان سه ساله است که والدینشان اجازه انجام کاری را ندادند. سر آنها فریاد میکشند که از شما متنفرم. است که آنها از والدین خود متنفر نیستند. در حقیقت آنها والدین خود را به شدت دوست دارند. با این حال آنها عصبانی و سرخورده هستند. و همراه با جیغ کشیدن ممکن است سخنان آزاردهندهی را به زبان بیاورند که هرگز قصدی از بیان آنها را هم ندارند. مشاجرات بیش از آن که مشکلی را حل کنند، بر مشکلات ایجاد شده می اگر وارد مشاجره با کسی شدید، می توانید آن را با استفاده از روش حل و فصل مشاجره به سرعت حل کنید. این روش ساده دارای دو شکل است که عبارتند از شکل طولانی و شکل مختصر اجازه دهید که اول شکل طولانی تر را مورد بررسی قرار دهیم. زیرا وقتی که شما روش مفصل را به خوبی درک کنید، قادر به درک سریع شکل مختصر آن نیز خواهید بود. شکل طولانی روش حل و فصل مشاجره اگر متوجه شدید که در حال ورود به مشاجره با کسی هستید، این گامها را بردارید. 1. دهانتان را ببندید و به صحبتهای طرف مقابلتان گوش دهید. هنگامی که وارد مشاجره با کسی میشوید این نکته را به خاطر داشته باشید با این مشاجره راه به جایی نخواهید برد جر را بحث کردن کمکی به حل مسئله نخواهد کرد بنابراین، اولین کاری که باید انجام دهید خیلی ساده بوده و این است که دهانتان را ببندید اجازه دهید طرف مقابلتان حرفایش را بزند و شما به حرفهای وی گوش دهید صحبت‌های طرف مقابلتان را قطع نکنید پس از اتمام سخنان وی به شما مجال صحبت کردن داده خواهد شد فعلا بدون اینکه گفته های وی را انکار کنید یا بخواهید موضع دفاعی بگیرید یا به هر نحوی چه از طریق گفتار و چه از طریق ارتباط غیر کلامی خود یا طرف مقابلتان را تخحقیر کنید به صحبت های وی گوش دهید فقط به آنچه که وی برای گفتن دارد گوش کنید آن را درک کرده و به عنوان آنچه که به دقت در آن لحظه باید به شما گفته شود بپذیرید انجام این کار برای اولین بار برای بیشتر مردم از جمله خودم سخت است اما با تکرار پی به اهمیت بالای ماهر شدن در اجرای آن خواهید برد. زیرا به کار بستن چنین مهارتی نه تنها باعث حل و فصل مشاجرات می‌گردد، بلکه قدرت شما را در جریان مشاجره به شدت افزایش می‌دهد. اگر این مهارت را امتحان کنید، به سرعت پی به علت اهمیت آن خواهید برد. من در طی سی سال گذشته این فرایند را بارها و بارها انجام دادم. انجام این گام هرگز بیش از دو یا سه دقیقه طول نکشیده است. وقتی که حتی در وسط یک مشاجره داغ به صحبت‌های طرف مقابل گوش داده شود وی می‌تواند در ظرف چند دقیقه آنچه باید به شما گفته شود را برایتان بازگو کند دو اکنون نوبت شماست که افکار و احساسات خود را بیان کنید شما بدون قطع کردن صحبت‌های طرف مقابلتان به سخنان وی گوش داده اکنون از طرف مقابلتان بخواهید که بدون قطع کردن صحبت‌هایتان به سخنان شما گوش دهد این یک راه حل کلیدی برای حل و فصل مشاجره است. آنها بعداً فرصت دیگری برای بیان مطالب خود خواهند داشت، اما اکنون نوبت شماست که صحبت کنید. متوجه خواهید شد که انجام این گام نیز بیش از دو یا سه دقیقه طول نخواهد کشید. 3. اکنون نوبت طرف مقابلتان است که پاسخ شما را دهد. بنابراین بدون قطع کردن صحبت وی به آنچه که او میگوید گوش دهید. شما فرصت بیشتری برای پاسخ دادن خواهید داشت اما در این لحظه مانند آنچه که در گام یک انجام دادید بدون قطع کردن صحبت طرف مقابل فقط به آنچه که اون می‌گوید گوش دهید انجام این گام به ندرت بیش از یک یا دو دقیقه طول می کشد چهار اکنون نوبت شماست که پاسخ طرف مقابلتان را بدهید اکنون شما پاسخ طرف مقابلتان را می دهید. شما برای بار دیگر ممکن است بر لزوم قطع نکردن صحبت خود توسط طرف مقابلتان تاکید کنید. در صورتی که شما صحبت طرف مقابلتان را قطع نکرده باشید، انصاف حکم می‌کند که طرف مقابلتان نیز بدون قطع کردن صحبت‌های شما به آنچه گویید گوش دهد. شما ممکن است مجبور شوید این دو گام اخیر را چندین بار تکرار کنید. به این صورت که شما اول به طرف مقابلتان اجازه می‌دهید صحبت کند. و سپس خودتان بدون اینکه حرفتان توسط وی قطع شود صحبت می کنید و این فرایند تکرار می شود. تکرار بیش از دو یا سه بار این فرایند به ندرت ضرورت پیدا می کند. شما خودتان متوجه خواهید شد که در چه زمانی آماده رفتن به سراغ گام بعدی هستید. پنج از طرف مقابلتان بپرسید که خواسته وی از شما چیست؟ بدون قطع کردن صحبت طرف مقابل به سخنان وی گوش دهید علت هر مشاجری بر این امر مسلم و سوار است که افراد درگیر در آن به آنچه که میخواهند نمی رسند. 6. به طرف مقابلتان بگویید که دقیقا چه خواسته ای از وی دارید. تا جایی که میتوانید با طرف مقابلتان صادق و رو راست باشید. خواسته خود را به سریح ترین شکل ممکن بیان کنید. اکنون آماده بررسی گام آخر هستید هفت. مذاکره کنید و به توافق روشنی دست پیدا کنید. یک یا هر دوی شما ممکن است در مواردی مجبور شوید که مصالحه کنید اما بهتر است تا زمانی که به توافقی دست نیافتید که هر دوی شما از آن راضی باشید به مذاکره کردن ادامه دهید در این گام ممکن است مجبور شوید قدری فکر بکر و ناگهانی همراه با خلاقیت بکنید و چند پرسش چه می شود اگر مانند اگر این را امتحان کنید چه می شود یا اگر به جای آن دیگری را امتحان کنید چه می شود را مطرح کنید اما با انجام این کار سرانجام راه حل سازنده پیدا خواهد شد که شرایط آن به نفع هر دو طرف باشد در صورتی که به کار کردن بر روی گزینه‌های مختلف ادامه دهید راه حل سازنده را پیدا خواهید کرد توضیح دادن روش حل و فصل مشاجره ساده است اما اجرای آن در ابتدا آسان نیست هنگامی که این روش را برای اولین بار اجرا می‌کردم تمام سعی و تلاش خود را به بردم تا صحبت طرف مقابلم را قطع نکنم به رغم تاکید مداوم من بر اینکه همه چیز به شکل ساده و راحت برایتان آشکار می شود، اجرای این روش در ابتدا آسان نبود. من حتی از یک دفتر یادداشت کوچک استفاده کرده و از آنچه گفته میشد به سرعت یادداشت برمی داشتم تا یادم باشد برای هر موضوعی که او راجب آن صحبت کرده است پاسخی را ارائه دهم. پس از اینکه فرایند فوق را چند بار انجام دادم، متوجه شدم که اصلاً نیازی به پاسخ دادن هر حرفی که طرف مقابل گفته است وجود ندارد و یادداشتها کاملاً غیر ضروری هستند. هنگام رسیدن نوبت شما برای صحبت کردن، تمام آنچه که لازم است انجام دهید این است که پاسخگوی هر آنچه که از صحبت‌های طرف مقابل به ذهنتان می‌رسد یا به طور اتفاقی به یاد می‌آورید باشید. شما در صورت تمایل می‌توانید یادداشت برداری کنید. مشروط بر اینکه همچنان به حرفهای طرف مقابل خود گوش دهید و صحبت‌های وی را قطع نکنید. همچنین شما نباید گفته‌های وی را انکار کنید یا موضع دفاعی بگیرید یا به هر نحوی حتی از طریق ارتباط غیر کلامی خود طرف مقابلتان را تحقیر کنید. نتیجه نهایی از انجام این روش که به زحمتش میارزد این است که این روش ساده به شما نشان می‌دهد چگونه در حالت توافق و سازش با دیگران زندگی کنید. شکل مختصر تکنیک حل و فصل مشاجره. حتی راه سادتری هم برای استفاده از این روش وجود دارد. اگر وارد مشاجره با کسی شدید، دهانتان را ببندید. صحبت طرف مقابل را قطع نکنید و به حرفهای او گوش دهید. وقتی که طرف مقابلتان بی‌وقفه در حال صحبت است، از او بخواهید که صحبت شما را قطع نکند و آنگاه مطلب خود را بیان کنید. این فرایند را تا زمانی که مشاجری ایجاد شده حل و فصل شود به تعداد دفعات لازم تکرار کنید. این روش تقریبا بسیار ساده به نظر می رسد اما اگر آن را امتحان کنید خودتان خواهید دید. پس از اینکه شروع به گوش کردن به حرفای طرف مقابل می کنید خیلی طول نمیکشد که خشمتان برطرف می شود. همچنین به محض اینکه شروع به گوش دادن به حرفهای طرف مقابلتان می کنید مشاجری ایجاد شده به مورد کاملا متفاوتی تبدیل می شود. اگر بخواهیم از سبک گفتاری رایان آیسلر استفاده کنیم باید بگوییم ما به کمک این روش به جای پیروی از الگوی رفتاری قدیمی مبتنی بر سلطه‌گری و سلطه‌پذیری رو به سوی پیروی از الگوی مبتنی بر همکاری حقیقی و مؤثر میآوریم. همکاری به مراتب مؤثرتر از سلطه‌گری است بحث و گفتگو در مورد مسائل در یک جلسه بحث و تبادل نظر که در آن به سخن تمام افراد بدون قطع کردن حرفشان گوش داده می‌شود، در مقایسه با مشاجرات ارتباط به مراتب مؤثرتری برقرار می‌کند. راه دیگری نیز برای استفاده از این روش پیش پا افتاده وجود دارد. اگر دو نفر دیگر درگیر یک مشاجره شوند، شما می‌توانید مداخله کرده و با تاکید شدید بر پیروی هر دو طرف از تنها یک قانون بین آنها داوری کنید. و آن قانون این است آنها باید بدون قطع کردن سخن یکدیگر با هم صحبت کنند ممکن است لازم شود که این قانون را بارها و بارها به با آنها یادآوری کنید اما پیروی از این قانون همواره موثر واقع می شود زیرا وقتی که دو طرف دعوا بنشینند و به صحبت های یکدیگر گوش دهند دیگر اصلا با هم مشاجره نخواهند کرد با کشف این موضوع که چگونه میتوان بدون پاسخ دادن فوری و به عجله کردن برای انکار حرفهای طرف مقابل یا گرفتن موضع دفاعی در برابر حرفهای وی به سخنان او یا هر کس دیگری گوش داد اتفاق بسیار مهمی رخ میدهد و آن این است شما به یک فرد یافته تبدیل میشوید و توانمند میگردید و نتایج این فرایند ساده به قدری زیاد است که توصیف آن در دایری لغات نمیگنجد. فصل ششم سفر پیوسته و پایدار ممکن است همه آنچه که گفته شد برایتان خیلی زیاد به نظر برسد شاید بعضی وقتها احساس کنید که از پایدار آمده و شکست خورده اید زیرا کارهای زیادی وجود دارد که باید انجام شود و جزئیات بسیار زیادی وجود دارد که باید با رسیدگی شود این احساسات عادی بوده و شما را از مسیر خود منحرف می‌کنند شاید این چکیده سری از مطالب گفته شده بتواند شما را به مسیر درست بازگرداند. این چکیده سریع خلاصه همه آن است که برای گفتن دارم و آن را برای دوست جوانی می نویسم که تنبلتر از آن است که نیم صفحه یا کمی بیشتر از این کتاب را بخواند. دوره کامل مطالب این کتاب در دو جمله خلاصه می شود. خط مشکی را تعیین کنید که بر اساس آن بتوانید با انجام آنچه که عاشقش هستید موفق شوید. به انجام آنچه که عاشقش هستید ادامه دهید و گامهای آشکار بعدی را که برای آنها برنامه ریزی کرده اید بردارید. به این ترتیب شما به نحوی از طریق بخت محض خود و به صورت کاملا تصادفی وارد جریان گذاری خواهید شد که نتیجه مطلوبی را برایتان به دنبال خواهد داشت. به طور کلی مطالب این کتاب در طرح ساده زیر که برای هر کسی قابل فهم است خلاصه می شود. آنچه را که به شدت به آن علاقمندید انجام دهید. ترهی را به صورت کتبی تدوین کنید که به طور اجمالی نشان دهد شما چگونه میخواهید در انجام آنچه به آن علاقه موفق شوید. گام های آشکار نخستین پیش روی خود را برای کسب موفقیت بردارید. سپس ببینید که چه اتفاقی می افتاد. قبل از اینکه گام‌های گام های آشکار بعدی را بردارید، طرح خود را به صورت منظم مورد بازبینی قرار دهید و آن را در صورت لزوم بروز کنید. این اینکه اگر به آزمایش امکانات بالقوه بعدی در ترکتان ادامه دهید دیر یا زود به کمک بخت محض و بدون برنامه ریزی قبلی به نتیجه مطلوب و تاأثیر خود دست پیدا خواهید کرد. ما برای توصیف آن نیرویی که ما را به نتیجه مطلوب خود سوغ می میدهد از واژه بخت استفاده می کنیم اما با انجام این فرایند ساده در خواهیم یافت که خودمان نیز می توانیم نقشی در خلق آن داشته باشیم. ما بخت مختص خود را خلق می کنیم. بخت ما صرفاً به عنوان فرصتی برای مواجهه با آنچه خودمان از قبل آماده کرده ایم به شمار می رود. وقتی که ما خودمان را از هر جهتی که در آن لحظه می توانیم آماده می کنیم به نیروی خلاقی تبدیل می شویم که به کمک آن بخت مختص به خود را خلق می کنیم بهترین راه برای آماده سازی خودمان این است که یک طرح مکتوب تهیه کنیم بنابراین به شما توصیه می شود که به کار کردن بر روی ادامه دهید. تا فرصت را پیدا کنید که قبلا تصور آنها را هم نمی کردید. سرانجام این که شما به طور تصادفی وارد جریان گذاری خواهید شد که نتیجه مطلوبی برایتان به دنبال خواهد داشت و شما به اهدافی مانند کسب موفقیت مالی و انجام آنچه که به شدت به آن علاقه دارید دست پیدا خواهید کرد راهنمودهایی برای افرادی که در فرهنگ آنها بر کار شدید و برخورداری از تیپ شخصیتی تاکید شده است همه ما نیاز داریم که هر از گاهی به تعطیلات برویم، استراحت کنیم و برای مدتی کار خود را کاملا فراموش کنیم. توصیه می شود که قدری از وقت خود را صرف انجام تمرینات آرامسازی و پرداختن به تفریح و سرگرمی کنید. تمرین آرامسازی از قدرت احیا کنندگی برخوردار بوده و به عنوان یکی از اجزای ضروری برای دستیابی به سلامت و تندرستی به شمار می روید. اگر برایتان ممکن است به مدت یک روز، یک هفته یا یک ماه به گوشه‌ای پناه برده و به خودتان استراحت دهید. هیچ کاری انجام ندهید. آرام باشید. تنبلی کنید. به مدت نیم روز یا حتی یک ساعت خلوتی را برای خود برگزینید. روزهای شنبه به خصوص روزهای خوبی برای خلوت گزینی هستند. به قدری خوب که من تقریبا در هر روز شنبه به گوشه‌ای پناه برده و خلوتی را برای خود برمی‌گزینم. من در روزهای شنبه به هیچ وجه کاری انجام نمی دهم یا به انجام فوری هر کاری که دلم می خواهد می پردازم. من تقریبا هر صبح نیز فرصتی را به خلوت گزینی مختصر اختصاص می دهم. خانه خود را به عنوان مرکز خلوت خود و جایی برای استهمام کردن با آب معدنی در نظر بگیرید. اگر در حمام خود وان آب داغ دارید در آن استراحت کنید و در غیر این صورت فقط یک حمام طولانی با آب داغ بگیرید. در حالی که برای مدتی به پشت خود دراز کشیده اید، کاملا احساس آرامش کنید هر از گاهی خود را مشتمال دهید کار خود را فراموش کنید گرفتاری ها و ناراحتی های خود را فراموش کنید کلیه افکار خود را تا جایی که ممکن است از ذهنتان خارج کنید از احساس عجیب آرام شدن کامل بدن و ذهن خود لذت ببرید به خصوص اگر شما از جمله افراد دارای تیپ شخصیتی الف هستید برای سلامتیتان مهم است که هر ازگاهی با تبدیل شدن به فردی با تیپ شخصیتی یه تعادل از دست رفته خود را جبران کنید اگر شما فرد معتاد به کار هستید به این شکل به قضیه نگاه کنید وقتی که ما تنها برای لحظات مختصر یا دوره های زمانی طولانی تری به خود استراحت می دهیم کار مهم ما همچنان در حال انجام شدن است در واقع این شیوه کار تو با استراحت در دراز مدت بهترین و کاراتترین راه برای انجام کارها خواهد بود به خصوص در صورت تنشزا بودن اوضاع کاریتان، چند راه مختصر برای آرام شدن در طول روز پیدا کنید. در اینجا به تمرین مختصر ساده اشاره می شود که همه ما می توانیم به میزان زیادی از آن بهره مند شویم. در هر زمانی از طول روز، به خصوص در حین مواجه شدن با آنچه که برایتان یک مشکل یا وضعیت تنشزا به نظر می رسد، یاد بگیرید که به مدت یک لحظه یا حتی یک نفس کشیدن آرام بگیرید. در طی یک روز یادتان نرود که فرصتی را به آرامسازی خود اختصاص دهید. فقط یک نفس عمیق التیام دهنده بکشید و به آرامی آن را خارج کنید. آرام شوید و با نفس کشیدن اتان به کلیه افکار خود اجازه دهید که از ذهنتان خارج شوند. این کار را همین حالا انجام دهید. این کار را در طول روز بارها انجام دهید. تمام چیزی که این کار می تنها یک نفس کشیدن است، البته اگر هر بار دو یا سه نفس بکشید بهتر است فقط به مدت یک لحظه به افکار خود اجازه دهید که از ذهنتان خارج شوند تا به این ترتیب به جایگاه گم شده سکوت و آرامش که همواره در وجود ماست ولی در زمان جاری شدن افکار همیشگی و مزاحم در سرمان کاملا نسبت به آن می میشویم پی ببرید چگونه می توان این کار را ساده تر کرد هر زمانی که یادتان است به خصوص هنگامی که در موقعیت‌های تنش قرار دارید فقط یک نفس عمیق بکشید آرام شوید و همچنان که نفس خود را بیرون می دهید به افکار خود اجازه دهید که از ذهنتان خارج شوند اگر با طرح یا مسئله درگیر شده اید فقط کافیست کلیه افکار خود را برای ای از ذهنتان خارج سازید وقتی شما دوباره شروع به فکر کردن می کنید احتمالا دورنمای روشندتری را در مورد آن مسئله خواهید داشت به این ترتیب پیدا کردن راه حل برای مسئله شما ممکن است بسیار سادهتر از آن چیزی باشد که فکر می کردید شما در آن لحظه آرام شدن کار خیلی مهمی را انجام داده اید. همه ای ما ارزش به فردا معکول کردن کار یا چیزی را می دانیم در بیشتر مواقع آنچه که در بعد از ظهر یک روز پیچیده و دشوار به نظر می رسد صبح روز بعد به مراتب صدهتر، روشنتر و واضحتر خواهد بود اتفاق مشابهی در یک یا دو یا سه نفس کشیدن ممکن است رخ دهد از این جهت که در آن زمان مختصر نفس کشیدن فرصتی برای معلوم شدن یک راه حل جدید ایجاد خواهد شد چنان که در کتاب قدرت زمان حال اظهار داشته است وقتی که وجود شما لبریز از مسائل و مشکلات مختلف می شود مجالی برای ورود چیز جدید یا یک راه حل به آن پیدا نخواهد شد بنابراین، هر وقت که می توانید برای ورود موارد فوق، فرصت ایجاد کنید یا فضایی را خلق کنید. بهترین کاری که می توانید در میان انجام فعالیت خود انجام دهید، این است که لحظه ای آرام بگیرید و هر آنچه که در ذهنتان است حتی کلیه افکار خود را رها کنید. تنها یک نفس کشیدن عمیق فشار خون را کاهش می دهد و استرس را از بین می برد. درست همانطوری که تحقیقات نشان داده است که حتی یک یا دو دقیقه فعالیت بدنی سخت و شدید میتواند تفاوت بزرگی را در سطح انرژی شما ایجاد کند. انجام تمرین آرامسازی در ظرف حتی یک دقیقه میتواند اثر آرام کنندی داشته باشد که به مدت ساعتها ادامه پیدا کند. زمانهای کوتاهی را در طول روز پیدا کنید که میتوانید آرام بگیرید. به عنوان مثال شما می توانید لحظه متوقف ساختن کار روزانه برای رفتن به دستشویی را به لحظه مفرغ کسب آرامش از طریق سکوت و رهاسازی افکار خود تبدیل کنید من گاهی از اوقات در طول روز فقط به پشت خود دراز می کشم و کاملا به خود استراحت می دهم استراحت دادن به خود به هر مدت زمانی چه به مدت یک دقیقه یا یک ساعت یا بین این دو زمان شما را دوباره سر حال خواهد آورد بیشتر استراحت کنید تا سالمتر بمانید در گذشته رسم ما بر این بود که جمعه ها را به عنوان روز استراحت در نظر می گرفتیم اما امروزه بسیاری از ما به نوع این رسم را از یاد برده ایم. پس بیایید دوباره این رسم را احیا کنیم بالاخره هر چه باشد همه ما در هفته به یک روز استراحت نیاز داریم روز جمعه برای من روز استراحت کردن، عبادت کردن و در کنار خانواده بودن است من در روزهای جمعه هرگز کار نمیکنم. روز شنبه روز تنها به سر بردن من است. تا از این طریق بتوانم استراحت کنم یا به انجام فوری هر کاری که دلم میخواهد بپردازم. روزهایی بوده است که از خواب برخاستم، یک فنجان قهوه قلیز نوشیدم و سپس دوباره به رخت خواب برگشتم. این رفتار به اعتقاد خانواده من خنده است. در حالی که به نظر من یکی از تبییترین کارهای قابل مشاهده در جهان است. من همه را تشویق می کنم که تا جایی که ممکن است به خود استراحت دهند و چرت بزنند. ما میتوانیم از گربه ها و سگ های خود مطالب زیادی را بیاموزیم. چرت زدن گربه در طول روز این جانور را به شدت سرحال می آورد. من هر روز صبح خود را متوجه خوابیدن دراز کشیدن به پشت، نوشتن، وقت وقتگذرانی، تنبلی کردن و انجام فوری هر کاری که دلم می خواهد می کنم. تا بعد از ظهر روز سهشنبه سر کار نمیروم. اما تا آن موقع آماده ای کار کردن پر انرژی و پرشور و نشاط هستم. من علاوه بر این به طور مرتب و زیاد به تعطیلات روم. تعطیلات مهم هستند. هرگز به قدری مشغول کار نشوید که فراموش کنید به تعطیلات بروید. به تعطیلات بروید. روح شما نیاز به دست کشیدن از کار و رفتن به تعطیلات دارد. تعطیلات به ما یادآوری می کنند که موارد مهمی در زندگی وجود دارد. همه ما نیاز داریم به تعطیلات برویم. هر از گاه لازم است که فعالیت تقریبا بیوقفه ما با قدری تنبلی کردن اساسی متعادل شود. مسئله دیگری که باید به با آن توجه داشته باشید این است که محض رضای خدا هنگامی که در تعطیلات خود به سر می‌برید، آرام بگیرید. تعداد بسیار زیادی از افراد در حین انجام فعالیت‌های تنش‌زا در تعطیلات خود به قدری این طرف و آن طرف می‌دوند که وقتی به خانه می‌رسند، حسابی خسته شدند. و برای برگشتن به وضع عادی نیاز دارند که یک بار دیگر به تعطیلات بروند. هنگامی که در تعطیلات خود به سر میبرید هنر ظریف آرامسازی استراحت و دوباره زنده شدن را تمرین کنید ایستگاه های بزرگی را برای توقف زمان داشته باشید که در آنها به جز آرام گرفتن کار دیگری انجام ندهید بسیاری از ما عادت داریم حتی در مواقع تعطیلات هم دچار استرس شویم در این رابطه، هر کاری را که برای رهایی از آن استرس باید انجام دهید، عملی کنید. در برخورد اول با مطالب این کتاب، شاهدیم که بیشتر پای موضوعاتی از قبیل این که چگونه میتوان طرز تفکری داشت که همواره تصویر بزرگ را دید یا اینکه چگونه میتوان با در نظر گرفتن طیف وسیعی از مسائل برنامه ریزی کرد به میان کشیده شده، یا به این موضوع اشاره شده که ما اهداف و ترهای بلندمدت خود را روی کاغذ آورده و سپس گام های آشکار بعدی پیش روی خود را برمیداریم. داریم هرچند که تعیین خط محش های و به خاطر سپردن آنها ضروری است ما نیاز داریم که این همه فعالیت خود را با قدری سکون و آرامش متعادل کنیم آرزوهای خود را به کامل ترین شکل ممکن تصور کنید و سپس آنها را رها کنید. این همه فعالیت خود را با کمی تنبلی کردن جدی متعادل کنید. در اینجا به طرح دیگری اشاره می شود که برای کلیه افراد مانند شما که دارای تیپ شخصیتی الف بوده و در حال مطالعه این کتاب هستید مفید خواهد بود. گاهی از اوقات رفتن به تعطیلات از جمله مهمترین کارهایی است که می توانیم برای کسب موفقیت در تجارت و حرفه خود انجام دهیم. رفتن ما به تعطیلات زمانی را برای تمرکز دلها و ذهنهای ما بر روی آنچه که برایمان دور از دسترس بوده اما در عین حال بسیار مهم و حیاتی هستند فراهم می‌سازد. رفتن به تعطیلات می‌تواند زندگی مان را در جایگاه روشنتر خود قرار دهد و همچنین می‌تواند به تصمیم گیری های جسورانه و تغییرات گسترده و همه همهجانبهای در زندگی من منجر شود وقتی ما طرح روشنی را در ذهن خود داریم چه پشت میز خود نشسته و بیوقفه بر روی آن کار کنیم و چه در حال نشستن بر روی ساحل شنی گرم کنار دریا بر روی آن کار کنیم همچنان شاهد تداوم انجام کار مهمی بر روی طرحمان خواهیم بود گاهی اوقات ما در حین بسر بردن در تعطیلات خود به پیشرفت های ناگهانی دست پیدا می کنیم که با کار کردن معمولی هرگز امکان نداشت به این پیشرفتها نائل شویم شما در صورت تمایل می توانید از زندگی برخوردار شوید که گامهای حرکت آن آهسته تر بوده و راحتی و آرامش بیشتری در آن حاکم است انتخاب با شماست از اولین باری که چشمندوز آرمانی خود را تصور کردم بخش مهمی از آن کاملا در رابطه با داشتن زندگی راحت و آرام زندگی با گامهای حرکت آهسته تر و همراه با فرصت‌های زمانی زیاد برای اختصاص دادن به خود و خانواده خود بوده است داشتن یک خانه زیبا در صورت کار کردن مداوم شما و نداشتن وقتی برای لذت بردن از آن چه فایده ای دارد طی سالهای متمادی بخش از ششمنداز آرمانی من که اختصاص به خودم دارد برایم بسیار آشکارتر شد و متوجه شدم که برای مدت زمان زیادی که تقریبا حدود یک سوم از ساعت‌های بیداری من را تشکیل میداد نیاز دارم که گوشه نشسته و تنها باشم برای من چنین تنظیم زمانی موجب ایجاد تعادل کامل میان امور زندگی هم شده است. من حدود یک سوم از وقت خود را به شکل بیس و صدا صرف گوش نشینی معمول هفتهگی خود می کنم. یک سوم دیگر را صرف رسیدگی به امور خانواده خود کرده و یک سوم دیگر را به اقدامات کاری از قبیل بررسی مجدد ترکهای مربوط به پروژه های مختلف خود و برداشتن هر تعداد که بعداً باید برداشت شود، اختصاص می دهم. این هدف برای من به حقیقت پیوسته است همکنون رویای خود را که تبدیل شدن به یک گوشه نشین نیمه وقت بوده است محقق ساختم من وقت‌های خیلی زیادی را تنها هستم و از آن اوقات برای مراقبه، آرامسازی، خوابیدن، مطالعه، وقتگذرانی و تنبلی کردن استفاده می‌کنم. این یک فراخوان برای اقدام است طرحهای خود را تعیین کنید آنها را روی کاغذ بیاورید و گام‌های ضروری پیش روی خود را بردارید این نیز یک فراخوان است اما شما را به تنبلی کردن دعوت می‌کند. زمانی را برای آرام گرفتن، وقت گذرانی و تنبلی کردن اختصاص دهید. من برای گذراندن زمان‌های گوشه‌نشینی خود از چند عادت ساده پیروی می‌کنم. مانند هر مطلب دیگری که در این کتاب مطرح شده، ممکن است بخواهید عادت‌های من را کاملا نادیده گرفته و عادت‌های جدیدی را در خودتان پرورش دهید. عادت من این است که در چنین زمان‌های تنها باشم. از منزل خود خارج نشده و به جایی نمی روم هیچ طرحی را برای اجرا کردن ندارم به اینترنت متصل نمی شوم یا پست الکترونیکی رد و بدل نمی کنم من در اداره از دسترسی به پست الکترونیکی یا اینترنت خودداری می کنم و حتی در خانه خود هم به آنها دسترسی ندارم من زمانی در طول روز به مراقبه می میپردازم معمولاً در حالی که به پشت خود دراز کشیدم و هر وقت دلم خواست میخوابم همچنین گاهی از اوقات مشغول نویسندگی شده و گاهی هم دور حیات خانه گشتی میزنم. معمولاً هنگام عصر حمام بخار گرفته یا خود را در وان حاوی آب داغ شستشو می دهم. من حتی فقط پس از یک یا دو روز گوشه‌نشینی همواره احساس راحتی کرده، پر انرژی شده، به شکل ساده و راحت و به شیوهی سالم و سازنده و در صحیح‌ترین زمان آماده رفتن به هر جایی که بخواهم یا لازم باشد بروم هستم. شما می توانید یاد بگیرید که چگونه بر زمان مسلط شوید. بیشتر ما این ضرب المثل قدیمی را شنیده ایم که میگوید کار ما به قدری گسترده و بزرگ میشود که زمان اختصاص داده شده به آن توسط خودمان را پر کند. بیشتر ما در زندگی حرفی خیش شاهد رخ دادن این اتفاق بوده ایم. به این شکل که ما فرضیهی را در خصوص اینکه چقدر زمان باید وقف حرفی خود کنیم می کنیم. و قبل از اینکه خودمان متوجه شویم فرضیه ما به حقیقت می ما به ندرت صبر میکنیم تا از خودمان بپرسیم که آیا امکان دارد آن فرضیهایی که بنا کردیم مانند بقیه باورهای کلیدی ما به حقیقت بپیوندد یا خیر زیرا پیشگویی در مورد آن حتما درست از آب در خواهد آمد اگر شما باور داشته باشید که برای موفق شدن یا حتی به زحمت گذراندن امور زندگی نیاز به 60 تا هشتاد ساعت کار کردن در هفته دارید سرانجام به همین مدت زمان کار خواهید کرد. این همه کار کردن برای من بی به نظر می رسد. من در یک هفته این نوعی حدود سی ساعت توجه همراه با تمرکز را وقف انجام امور شرکت می کنم و این زمان کافی است. کار من برای پر کردن زمانی که صرف انجام می کنم کوچک می شود. وقتی که این اصل را درک کنیم می بر زمان مسلط شویم. اگر شما باور داشته باشید که با سی ساعت کار کردن در هفته قادر به انجام هر کار لازم برای کسب موفقیت در تحقق آرزوهای خیش هستید سرانجام به همین مدت زمان کار خواهید کرد در این عبارت نقل قولی از جیمز الن آورده شده برگرفته از شعر بزرگ وی که قبلا در این کتاب به بخشی از آن اشاره شد اراده انسانی که به شکل نامرئی فرزند یک روح جاویدان را تحت تأثیر قرار میدهد قادر است بر زمان مسلط شود و حتی بر مکان بر بخت و اقبال و تقریبا هر شرایطی که با آن مواجه می‌شویم شویم فائقایت تسلط بر زمان غیر ممکن نیست این کار مستلزم توجه بیشتر به باورهای خود در مورد زمان و تمایل به تغییر برخی از باورهای قدیمی است. افراد زیادی که شامل بیشتر مردم ساکن در این کوره زمین می شوند، از تجربه بسیار متفاوتی از زمان در زندگی خیش برخوردارند افراد مختلف دارای مجموع باورهای متفاوتی در خصوص زمان هستند و به همین دلیل در دنیای کاملا متفاوتی نسبت به یکدیگر زندگی می کنند. چرا در تعداد بسیار زیادی از فرهنگ های دیگر مردم وقت بسیار زیادی را برای زندگی کردن و لذت بردن از زندگی دارند اگر آنها میتوانند از زندگی لذت ببرند چرا ما نتوانیم من شخصا وقت آزاد زیادی برای انجام فوری آنچه میخواهم انجام دهم دارم در واقع این زمان معمولاً بیش از زمانی است که صرف کار کردن در اداره می کنم و اگر من می توانم این گونه از وقت خود استفاده کنم چرا شما نتوانید پاسخ این است که شما نیز در صورت تمایل به بررسی مجدد باورهای به شدت حفظ شده تان در مورد زمان قادر به انجام این کار خواهید بود وقتی که راجع به این موضوع فکر می کنید متحیر می شوید همه ما دارای مجموعه عقاید گسترده و پیچیده ای در مورد زمان هستیم با این حال میتوان گفت که ما تقریبا هرگز راجب آن باورها فکر نمی کنیم و به ندرت آنها را آگاهان مورد بررسی قرار می دهیم. وقتی که ما قدری راجب باورهای خود در مورد زمان فکر کنیم، به زودی متوجه می شویم که آنها نیز مانند کلیه باورهای دیگر ما لزوما و به خودی خود درست نیستند. اما اگر ما باور داشته باشیم که آنها درستند، ناگزیر شاهد به حقیقت پیوستن همان باورهای قدیمی در زندگی زندگیمان خواهیم بود. تنها با در نظر گرفتن باورهای خود و انجام فرایند باور درونی در زمان مورد نیاز، متوجه میشویم که میتوانیم آن دست از باورهای قدیمی خود را تغییر دهیم. ما میتوانیم باورهای خود را تغییر دهیم تا در نتیجه آن دنیای بیرون من هم تغییر کند. قبل از آنکه و 35 سال شوم معتقد بودم که در زندگی خود زمان یا پول کافی ندارم. این دو به یک نحوی به هم مربوط میشدند. و من برای کسب به هر دوی اینها مبارزه می کردم به نظر می رسید که خداوند به هر دلیلی از آنها به قدر کافی خلق نکرده است زمان همواره با بی از کنار من می گذشت. من زمان کافی برای انجام آنچه که دوست داشتم انجام دهم ده در اختیار نداشتم متوجه این موضوع شده بودم که کارها همواره به مدت بسیار بیشتری از آنچه که برنامه ریزی کرده بودم طول می کشند زمان به سرعت در حال گذشتن بود. آیا شما هم باورهای مشابهی را تجربه کرده اید؟ و این باورها به نظرتون آشنا میرسند؟ سپس تغییری در نظام باور من پدید آمد. من به این موضوع پی بردم که میتوانم انتخابی آگاهانه برای تغییر باورهای خود و تولید زمان بیشتر در زندگی خود داشته باشم. عبارتهای تکیدی که من به طور مداوم تکرار میکردم به نحوی از قدرت تأثیرگذاری بر نتایج برخوردار بودند. تجربه زندگی من در آن زمان تحت تأثیر قرار گرفته و تغییر اساسی پیدا کرد و علت آن این بود که عبارتهای تأکیدی در مقایسه با باورهای قدیمی و محدود کننده هم از قدرت بیشتر و توان اثرگذاری بیشتری بر زمیر ناخودآگاه من برخوردار بودند تقریبا مطمئنم تنها کار و در عین حال مؤثرترین کاری که انجام دادم این بود که همراه با اهداف خود این واژه ها را با قاطعیت بیان کردم به شکل ساده و راحت و به شیوهی سالم و سازنده، درست در زمان آرمانی آن و به نحوی که بیشترین سود را برای همه داشته باشد. این واژه‌ها با گذشت زمان و در صورت تکرار به اندازه‌ی کافی، می‌توانند بر نتایج تأثیر بگذارند. همچنان که باورهای جدید ما مبنی بر اینکه زمان کافی در اختیار داریم، بر باورهای قدیمی ما مبنی بر اینکه با کمبود زمان مواجه هستیم، غلبه پیدا می‌کنند، کل تجربه زندگی ما دگرگون می‌شود. آیا شما هنگام انجام نوعی مسابقه با زمان اغلب دچار استرس می شوید؟ در آن زمان به چه فکر کنید و به خودتان چه می‌گویید؟ آیا باور دارید که با کمبود زمان مواجه هستید؟ آیا باور دارید که جهان به نحوی زمان کافی برایتان خلق نکرده است؟ نگاه خوبی به باورهای خود در مورد زمان بیندازید و گامهای لازم را برای تغییر آنها بردارید. در اینجا به یک فرمول جادویی اشاره می شود. چیزی شبیه این را با قاطعیت بیان کنید. آرزوها و اهداف من به شکل ساده و راحت و در زمان آرمانی در حال تحقق یافتن هستند. این واجه ها جادوی محض هستند. آنها می توانند به شما کمک کنند بر زمان مسلط شوید. ما تنها تا زمانی اسیر زمان خواهیم بود که خودمان این موضوع را باور داشته باشیم. ما کاملا قادر به تسلط بر زمان هستیم. تحقق این امر بستگی به بررسی و تغییر باورهایمان دارد. هیچ قانون جهان که به کمبود زمان در جهان اقرار کند وجود ندارد. ما در جهان وفور و فراوانی زندگی می کنیم و این وفور شامل وفور زمان، پول و هر چیز دیگر می گردد. شما می توانید ارزش پول را درک کرده و بر آن مسلط شوید. من تا قبل از 35 سالگی در زندگی خود واقعا پول کافی نداشتم. انبوهی از باورهای سازمان نیافته درباره پول داشتم. به عنوان مثال معتقد بودم که به دست آوردن پول مشکل است. پول کمیاب است پول علف خرس نیست. من همچنین معتقد بودم که برای پول درآوردن باید به سختی کار کرد اما وقتی که صادقانه به درون خود مراجعه می کردم متوجه می شدم که واقعا دوست نداشتم کارهای سخت زیادی را انجام دهم و باور حقیقی من این بود که برای پول درآوردن باید هوش و استعداد زیادی داشت. و این اینکه من در درون خیش به طرز دردناکی از حماقت و نادانی خود در طیف وسیعی از زمینه ها از جمله پول درآوردن آگاه بودم وقتی در آن زمان به زندگی خیش نگاه می کردم برایم آشکار بود که را لازمه موفقیت است در اختیار ندارم من به سختی می توانستم پول اجاره ماهیانه خود را بپردازم بنابراین پیداست که از هوش یا استعداد کافی برای تسلط بر پول خیش برخوردار نبودم من معتقدم برای پول درآوردن باید پول خرج کرد و از آنجا که هیچ پولی نداشتم، اوضاع بر وفق مراد من نبود. بخت و اقبال نیز قطعا با من یار نبود. اوضاع اقتصادی نیز به گونه بود که ثروتمندان ثروتمندتر شده و فقیران فقیرتر می شدند با این حال، پول در دست آدم احمق نمیماند و وقتی که در آن زمان به سابقه تسلط بر پول خود نگاه می کردم متوجه می شدم که مسلما یک احمق هستم. من به تجربه شخصی خود پی بردم که حماقتم حقیقت دارد زیرا مقدار زیادی از پولی که درآورده بودم تقریباً به صورت فوری از بین رفت. علاوه بر این در باتن خیش احساس میکردم که شاید پول ریشه تمام زشتهی ها و بدی هاست یا اینکه پول عامل فساد است یا اینکه امکان ندارد یک شخص ثروتمند آدم خوبی باشد یا همونطوری که برادرم ویل زمانی به من گفت افراد ثروتمند آدم های احمقی هستند. آیا هیچ یک از این باورها به نظرتان آشنا نمی رسند یا خودتان آنها را تجربه نکرده اید وقتی ما راجب آن باورها فکر می کنیم شگفت زده می شویم همه ای ما دارای مجموعه بزرگ و پیچیده ای از باورها در خصوص پول هستیم با این حال درست همانند باورهایمان در خصوص زمان تقریبا هرگز راجب آن باورها فکر نمی کنیم آنها دقیقا در جای خود و به صورت بررسی نشده قرار دارند ما بسیار به ندرت از خودمان ما می پرسیم که آیا آن باورها معتبر بوده یا واقعا درست هستند. باورهای ما درباره پول مانند کلیه باورهای دیگرمان حقیقتی ناگزیر برای ما باشند. آنها لزوماً و به خودی خود درست نیستند. این طرز فکر ماست که ما را ناگزیر به پذیرش حقیقت آنها می کند. بسیاری از مردم در مورد پول به گونه دیگری میاندیشند. و باورهای بسیار متفاوتی نسبت به آن دارند که این امر ثابت می‌کند باورهای ما به خودی خود درست نیستند. باورهای ما با گذشت زمان ممکن است تغییر کند و تغییر هم خواهد کرد. من به تجربه شخصی خود دریافتم که این موضوع قطعاً حقیقت دارد. آیا شما معتقدید که کمبود پول در جهان وجود دارد؟ آیا معتقدید که جهان به هر دلیلی پول کافی برای شما خلق نکرده است؟ آیا معتقدید که از استعداد لازم برای درآوردن مقدار قابل توجهی پول برخوردار نیستید؟ آیا معتقدید که پول درآوردن سخت است؟ آیا معتقدید که اگر صاحب پول شوید، شخص دیگری مجبور می شود که بدون آن سر کند یا اینکه پول درآوردن شما یک نوع ضرر دیگری به وی وارد خواهد ساخت؟ آیا معتقدید که پول موجب فاسد شدن شما خواهد شد؟ آیا معتقدید که پول موجب منحرف شدن توجه شما از امور مهم در زندگی خواهد شد؟ راجع به پول چه فکری میکنید و چه مطلبی به خودتان میگویید؟ نگاه خوبی به باورهای خود در خصوص پول بیاندازید و گامهای لازم را برای تغییر آنها بردارید. این یک اقدام کلیدی برای تسلط بر پولتان است. روی فرایند باور درونی کار کنید. به گفتن عبارتهای تحکیدی خود ادامه دهید. پس از اینکه من برای مدتی روی این عبارات تأکیدی کار کردم، نوعی تغییر و دگرگونی در نظام باورم در خصوص پول و دسترس پذیری به آن ایجاد شد. در نهایت به این درک و باور رسیدم که پول میتواند به نیروی عظیمی برای هدایت ما به انجام امور خیر در زندگی خود و در زندگی بسیاری از افراد دیگر تبدیل شود. ده. من در نهایت به این درک و باور رسیدم که از همه آنچه که لازمه خلق موفقیت آمیز آرزوهایم است برخوردارم. این کار فقط مستلزم این بود که با مکتوب کردن ترهای خود و برداشتن گام های آشکار بعدی تمرکز ذهن خلاق خود را بر روی آرزوهایم حفظ کنم. شما میتوانید تصمیم آگاهانه برای تغییر باورهای خود و کسب پول بیشتر در زندگی بگیرید. انتخاب با خود شماست. من تقریباً به طور قطع می میتوانم بگویم که یکی از موثرترین کارهایی که در این عرض انجام دادم عبارت بود از تقاضا کردن. خواهش کردن یا هرچه میخواهید آن را بنامید برای مقدار مشخصی پول که حتی تصور آن هم برایم به عنوان جهش بزرگی به سوی پیشرفت به شمار میرفت من به محض اینکه تقاضای مقدار پول زیادی را می کنم شروع به دریافت طرحهای ابدای جدیدی برای رسیدن بان میکنم و امکانات بالقوه فراوانی که ممکن است به شکل بسیار خوبی منجر به دریافت آن مقدار پول مورد تقاضای من شوند به ذهنم خطور می کنند. به دنبال این تقاضا فرصت های مختلفی به طور ناگهانی ظاهر نظاهر می شوند و چنین به نظر می رسد که این فرصت ها همواره درست در پیش روی من بودند اما از آنجا که من با ذهنیت به اندازه کافی باز به با آنها نگاه نکرده بودم آنها را در پیش روی خود ندیده بودم برخی از این امکانات بالقوه به مسیرهای منتهی میشوند می شوند که نمیخواهم در آنها قدم بردارم یا هیچ علاقه با دوام یا انرژی برای حرکت به سوی آنها ندارم برخی دیگر از آنها نیز به دورنماهای می میشوند که آنها را نمیپذیرم زیرا مسیر رسیدن با آنها نوعا ساده، راحت، سالم یا سازنده به نظر نمی رسد. البته برخی از این امکانات بلغوه عاملی را در درون من برمیانگیزانند و مرا به مسیرهای جدیدی هدایت می کنند که هم چالشزا و هم ارزا کننده هستند ما چه از طریق خواهش کردن برای دستیابی به وفور نعمت چه از طریق تاکید کردن بر وجود آن چه از طریق تجسم، چه از طریق هیملوتیسم خود، چه از طریق انجام خودالغایی یا انجام فرایند تفکر مثبت یا انجام هر تعداد کار دیگر، در نهایت میتوانیم به این درک و باور عمیق برسیم که در جهانی زندگی میکنیم که واقعا در آن وفور نعمت وجود دارد. ما میتوانیم راههای ابدایی بیشماری را برای ایجاد جریانهای درآمد از منابع گوناگون وسیع کشف کنیم. ما آنچه را که می میکنیم دریافت خواهیم کرد. نه بیشتر؟ و نه کمتر. این کلام یک کلید قوی برای حل مسائل شماست تقاضا کنید تا دریافت کنید شما آنچه را که تقاضا می‌کنید دریافت خواهید کرد نه بیشتر و نه کمتر همچنان که باورهای جدید من در خصوص وفور نعمت به تدریج جایگزین باورهای اولیه هم در مورد کمیابی شدند تجربه کلی من از واقعیت تغییر کرده است من دیگر برای پول درآوردن سخت کار نمی‌کنم من کاری را انجام می‌دهم که عاشق انجام آن هستم و همواره پول بسیار زیادی را از این کار به دست می‌آورم. این همان واقعیتی است که من به درستی آن باور دارم و این همان واقعیتی است که در زندگی من به حقیقت پیوسته است. من در زندگی خود و همچنین در دنیا از وفور پول برخوردارم. آیا شما در باور کردن این قضیه مشکل دارید؟ شاید اگر به این شکل به قضیه نگاه کنید برایتان کمک کننده باشد. پول از برخ جهات شبیه قزا است در واقع هر یکی از این دو را میتوان به جای دیگری فرض کرد غذا به مقدار زیادی در جهان وجود دارد در این کشور به قدری قزا یافت می شود که دولت به کشاورزان مبلغی را می پردازد تا دست از کاشتن غذا بردارند با این حال افرادی در این کشور وجود دارند که در گرسنگی بسر میبرند مشکل این کشور در کمبود غذا نیست بلکه در توزیع غذا میان مردم است در مورد پول هم دقیقا همین موضوع سخت دارد هیچ کمبود پولی در جهان وجود ندارد مقادیر زیادی پول در سراسر جهان به شکل‌های بسیار مختلف مانند پول نقد سهام، مستقلات طلا جواهر و آثار هنری وجود دارد با این حال امروزه در سطح جهان تعداد افراد به شدت فقیر بسیار بیشتر از افراد ثروتمند است چرا این اینگونه است هیچ کمبود پولی در جهان وجود ندارد ولی مشکل ما در توضیع پول میان انسان هاست با استفاده از ابزارهایی که در این کتاب بانها با اشاره شد شما می توانید نحوه جمعوری پول به مراتب بیشتری را در زندگی خیش کشف کنید آن وقت توانید اقدام بسیار جدی و اساسی را برای کمک به کاهش فقر اشخاص دیگر و همچنین خودتان انجام دهید هنری فورد این موضوع را به زبان ساده، پر محتوا و تأثیر گذار بیان کرده است اگر شما فکر می‌کنید که میتوانید پول درآورید یا اگر فکر می‌کنید نمیتوانید پول درآورید در هر دو صورت حق با شماست. در صورتی که شما بتوانید موضوع پیش‌رو را مورد تایید و تصدیق قرار دهید و آن را باور داشته باشید، امکان تحقق یافتن آن برایتان وجود خواهد داشت. آن موضوع این است. دیگر لازم نیست برای پول درآوردن سخت کار کنید. شما می‌تونید کاری را انجام دهید که عاشقش هستید. و هموار پول زیادی را بابت آن کسب کنید همه چیز بستگی به باورهای شما دارد اگر شما باور داشته باشید که پول کمیاب است در زندگیتان با کم پول مواجه خواهید شد اما اگر باور داشته باشید که مقدار پول در گردش فراوانی در جهان یافت می شود که همینطور هم هست در زندگیتان با وفور پول مواجه خواهید شد. این یک اصل غیرقابل تغییر است آن را باید به همان گونه که هست پذیرفت. تبدیل شدن به یک جادوگر پول در صورتی که پس از تمام کردن مطالعه کل این کتاب و پس از پیگیری این دوره مختصر در زمینه تجلی راحتی در زندگی خیش هنوز در خصوص پول درآوردن یا خرج کردن آن مشکل دارید به شما توصیه میکنم که کتاب جادوی پول نوشته دبورا ال پرایس را بخوانید و روی آن کار کنید نویسنده این کتاب یک مشاور مالی با تجربه و باهوش است و با ارزشترین قسمت کتاب او حداقل برای من بخشی است که در آن نحوه شناسایی هشت تیپ شخصیت پولی ممکن را معرفی می‌کند. احتمالا شما هم می توانید فقط از روی برچسب وی تیپ شخصیت پولی خود را تعیین کنید و سپس نشان می‌دهد که چگونه می توان از تیپ شخصیت پولی فعلی به سمت تیپ شخصیت پولی آرمانی یا شخصیت جادوگر پول حرکت کرد. آیا شما خود را با هیچ یک از این تیپ‌های شخصیت پولی یکی میدانید؟ تیپ آدم بیگنا. همه ما از اینجا شروع می‌کنیم، اما بسیاری از ما در همین جا گرفتار میمانیم به اعتقاد چنین شخصی پول معمایی است که با قوه درک خود قادر به شناخت آن نیست. حتی اصول اولیه پسنداز و گذاری را به ما یاد ندادند. تیپ آدم قربانی. تقصیر من نیست. همواره نیروهای فراتر از قدرت کنترل من اوزای مالی من را آشفته می کنند. تیپ آدم جنگجو مبارزه می کند و بر دنیای پول غالب می گردد. او که اغلب موفق می شود، به ندرت از آن موفقیت راضی یا خوشنود است تیپ آدم شهید خود را فدای برآورده ساختن نیازهای دیگران می کند. تیپ آدم احمق شامل قماربازها و ماجراجوهای می گردد که پولی را که نصیبشان شده در دستشان نمانده و آن را به زودی از دست می دهند. تیپ شخصیت پولی من سالها از این نو بود تیپ آدم جمع پول، هنرمند برخورد دوگانهی نسبت به پول دارد به طوری که هم برای آوردن پول از آثار هنری به سمت آن جذب می شود و هم به دلیل مسائل معنوی از آن دوری می جوید. تیپ شخصیت پولی من از بچگی تا عواست سنین بین سی و چهل سالگی از این نو بود تیپ حاکم ستمگر از پول برای سلتگری و کنترل دیگران استفاده می کند. چنین فردی در نتیجه رفتار خود در زندگی مدام با دیگران دعوا اختلاف خواهد داشت. تیپ جادوگر پول که تیپ شخصیت پولی آرمانی است. میفهمد که چگونه پول به دست بیاورد؟ چگونه تقاضای پول کند و چگونه پول دریافت کند. همانطور که دب پراکس در کتاب جادوی پول بیان می کند، جادوگران پول با بهره برداری از مجموعه جدید و همیشه در حال تغییر از فعل و انفعالات پویای موجود در جهان مادی و نیز در عالم معنا، نحوه تغییر دادن یا آشکار ساختن هویت پولی مختص به خود را می دانند. همه ما در بهترین حالت جسمی یا روحی خود و هنگامی که می خواهیم مدعی قدرتمندی شخصی خودمان شویم، جادوگر هستیم. جادوگران مجهز به دانش گذشته هستند. با پیشینه شخصی خود آشتی کردند. و این موضوع را درک می‌کنند که منبع قدرت آنها در دل توانایی آنها نسبت به درک و زنده ساختن حقیقت وجودیشان است جادوگرها می‌دانند که تجلی منبع قدرت آنها در توانایی آنها نسبت به بهره برداری از قدرت بالاتر خود پیدا می‌شود جادوگرها به کمک قوه ایمان، عشق و صبر خود و با علم به اینکه کلیه نیازهای ما همواره برآورده می‌شود به راحتی و با آسودگی خاطر منتظر میمانند جادوگرها زندگی درونی را به عنوان محلی برای کسب ثروت معنوی و زندگی بیرونی را به عنوان تجلیگاه رستگاری در جهان مادی در آغوش می‌گیرند. آنها به طرز نامحدودی به هستی درونی و بیرونی خویش متصل هستند. همه ما در بهترین حالت جسمی یا روحی خود و هنگامی که می‌خواهیم مدعی قدرتمندی شخصی خودمان شویم، جادوگر هستیم. با علم به اینکه کلیه نیازهای ما همواره برآورده می شود به راحتی و با آسودگی خاطر منتظر بمانید. اگر آنچه که گفته شد برایتان به قدری پیچیده است که نمیتوانید آن را درک کنید و همچنان با قضیه پول مشکل دارید کتاب فکر کنید و ثروتمند شوید نوشته ناپلون هیل را بخوانید. این کتاب پر از ابزارهای موثر برای تسلط بر پول است. با این حال در یک جا راه هیل و من از هم جدا می شود. او در یک جا اظهار می‌دارد البته اگر درست به یادم مانده باشد که تمایل شما برای کسب ثروت باید تبدیل به یگان مشغله ذهنی آتشین شما گردد خب این طرز فکر برای من کمی وسواس‌آمیز به نظر می‌رسد این طرز فکر شبیه آن است که از یک زندگی متعادل و پربار که شامل صرف و اوقاتی برای خانواده، دوستان، اظهار نظرهای شخصی، استراحت کردن و نیز پول درآوردن می‌گردد جلوگیری کنید من در زندگی شخصی خود شاهد به حقیقت پیوستن این عبارت ساده بودم. شما می توانید پول و هر چیز دیگری را که می خواهید به طرزی معقول و سنجیده و به شکل ساده و راحت و به نحوی که بیشترین سود را برای همه به همراه داشته باشد بدست آورید. اصلا هیچ نیازی به داشتن وصفه های آتشین وجود ندارد. بله، نیاز به اهداف روشن وجود دارد، ولی نه به وصفصه های کاملاً حد و شدید. ما می زندگی متعادلی داشته باشیم که در آن وقت فراوانی برای استراحت و آرامش و خانواده وجود داشته باشد و با این حال زندگی رویای خیش را بنا کنیم. را که دقیقاً می خواهید، با سراحت به جهان اعلام کنید. سپس آن را به کلی رها کنید و اجازه دهید که جهان فکری به حال جز آن کند. روز خود را به شکل ساده و راحت سپری کنید و در آن کلیه گام های پیش روی خود را در مناسب ترین زمان و به نحوی که بیشترین سود را برای همه به همراه داشته باشد بردارید. مراقب خودتان باشید. مراقب دیگران هم باشید. اینها اعمال است که قادر به درک آنچه که در زندگی مهم است می باشد. هدف از نهاد خانواده اگر شما در حق خانواده و دوستان خود کوتاهی میکنید و از آنها قافل میشوید بدانید که در حال انحراف از مسیر خود نیز هستید اگر شما کارهایتان را بدون مشارکت خانواده و دوستان خود انجام میدهید بدانید که به طور قطع از مسیر خود منحرف شده اید و با کارهایتان مدام بین خود و آنها مشکل و درگیری ایجاد خواهید کرد من تقاضا کرده ام که این سخنان را با اندازه بزرگ بنویسند و آن را بر روی دیوارم نصب کنند هدف از نهاد خانواده چیست؟ هدف مورد نظر خانواده عبارت از محافظت و پشتیبانی کردن از هر یک از ما، مشارکت و همکاری ما با یکدیگر، احترام قائل شدن و عشق ورزیدن به یکدیگر و گوش کردن به سخنان هم، تشویق یکدیگر به شاد بودن و سالم زیستن و کمک کردن به همه ما به منظور برآورده ساختن عالی ترین آرزوهای آرزوهایمان است. آنچه گفته شد در رابطه با هدف و اهمیت خانواده بود. به یاد آوردن این موضوع که همه ما اعضای یک خانواده کوچک هستیم که در آن رابطه نزدیکی با یکدیگر داریم و نیز به عنوان بخشی از خانواده بزرگ بشریت به شمار میاییم به طور قطع به ما کمک میکند که در مسیر درست باقی بمانیم همه ما بر روی زمین در کنار یکدیگر مانده ایم و همدیگر را رها نکردیم درست همانطور که در کنار بستگان درجه یک خود منده ایم و نمیتوانیم آنها را تغییر دهیم یا آنها را با شخص دیگر ما کنیم. همه ما انسان ها با هم یک خانواده بزرگ جهانی و البته به هم ریخته‌ای را تشکیل می دهیم و به همین دلیل باید یاد بگیریم که بدون تهدید کردن همدیگر یا تلاش برای استثمار و قلب یافتن بر یکدیگر با هم سازگار شویم. پاسخ به این سوال هدف از نهاد خانواده چیست؟ مسلما در واژه مشارکت نهفته است. پس بیایید حداکثر تلاش خود را بکنیم تا کارهایمان را با مشارکت خانواده خود که شامل خانواده بشریت و کل موجودات زنده روی زمین نیز می شود انجام دهیم. از اقامه های دعوی اجتناب کنید. بدون در نظر گرفتن چند مورد استثنای بسیار کم، اقامه های دعوی به جای خلق حل های موثر بر بار مسائل می افضاید. می توان گفت که تقریباً کلیه اقامه‌های دعوی ما را از مسیر خود منحرف می‌کنند. آنها فقط راهی برای تلف کردن احمقانه زمان و پول شما هستند و وقتی که ما کارهایمان را با مشارکت دیگران انجام دهیم و یاد بگیریم که چگونه دعواها را فیصله دهیم، اقامه‌های دعوی کاملاً غیر ضروری خواهند بود. شما با یک جنگ و دعوا مواجه شده اید و تنها راه موثر برای حل دعوا و جنگ از طریق میانجیگری و یافتن راه حل‌های مورد توافقی است که به سود کلیه های درگیر تمام شود. اگر شما در هر صورت با دعوا و مشاجرهی روبرو شدید که نتوانستید آن را به تنهایی حل کنید، میانجی خوبی پیدا کنید و به کمک وی راه حلی را برای مشکل خود بیابید. میانجیگری بر پایه مشارکت استوار است. در قراردادهایی که ما با شرکت انتشاراتی نیو ورلد لایبرری بسته بندی وجود دارد که به موجب آن هر گونه اختلافی که ممکن است بین طرف های درگیر پیش بیاید با روحیه آکنده از احترام و همکاری و با راضی شدن به مصالحه حل خواهد شد و در صورتی که ما نتوانیم آن را حل کنیم به یک فرد میانجی مراجعه خواهیم کرد اگر این کار هم نتیجه نداد با هم توافق می کنیم که برای حل مورد اختلاف خود به داوری که نسبت به مسائل حقوقی مقید است مراجعه کرده و آن را در آنجا حل و فصل کنیم اقامه دعوا گزینه خوبی برای حل اختلاف نمی باشد. من با تجربه تقریباً سی ساله خود در امور بازرگانی هرگز مجبور نشدم که مورد اختلاف خود را به یک داور حقوقی ارجاده دهم من فقط یک بار به با عنوان آخرین راه حل برای دریافت پول از شرکتی که بابت توضیع و فروش آثار موسیقی من به ما بدهکار بود به دادگاه مطالبات جزئی مراجعه کردم. آنچه در دادگاه شد، فرایند سادهای بود که نیاز به صرف وقت یا حزینه زیادی نداشت. در این فرایند، پای هیچ وکیلی به میان کشانده نشد و من از این اقدام خود تجربه خوبی را کسب کردم. من از آن زمان به بعد، هرگز خود را درگیر هیچ اقامه دعوی دیگری نکردم. فقط در یک مورد برای حل مشکل خود از فرد میانجی استفاده کردم و آن یک مورد، از سوی کلیه افراد زیرفت به عنوان تجربه بسیار امیدوار کننده و نمونه شگفتانگیز از الگوی همکاری ارزیابی شده است. ما راهی را پیدا کردیم که با پیگیری آن هر دوی ما توانستیم به آنچه میخواستیم برسیم و در این حال طرف مقابل را نیز در رسیدن به آنچه که میخواست کاملا پشتیبانی کنیم. به راهحل حل دست یافتیم که برای کلیه افراد درگیر به طور قطع به عنوان یک تجربه برنده برنده به شمار میرفت. زندگی کردن و کار کردن با مشارکت دیگران ترجیحاً به جای ایجاد اختلاف به سازگاری و هماهنگی منجر می شود و حاصل فرایند میانجیگری رسیدن به توافق و تجربه کردن احساسات خوب است. و ما کار کردن خلاقانه و لذت بخش با یکدیگر را تا به امروز ادامه دادیم و آن را ادامه خواهیم داد. صداقت و شفاف بودن. این بخش برای بیشتر شما بدیهی به نظر خواهد رسید. پیداست که کار کردن و شراکت با هر فردی مستلزم برخورداری از صداقت و شفافیت می باشد. با توجه به اینکه که ما پایههای موفقیت خیش را از طریق روابط تجاری یا شخصی برنده برنده خیش با دیگران بنا میکنیم و برای دستیابی به این رابطه باید صادق و شفاف بود میتوان این دو ویژگی را به عنوان دو جزئی که بررسی آنها در خط سیر پیوسته مطالب این کتاب کاملا ضروری است در نظر گرفت خود شما نیز از این قضیه آگاهید آیا این طور نیست؟ هنگام کار کردن و شراکت با هر فردی، چه این شراکت در زندگی شخصی باشد و چه در زمینه امور تجاری، برخورداری از صداقت و شفافیت کاملاً ضروری است. من و همسرم با هم جلسات تجاری ماهیانه ای را برگزار می‌کنیم. زمانی که این جلسات تشکیل می‌شود، در طول یک ماه تقریباً تنها زمانی است که راجع به پول صحبت می‌کنیم. کلیه داد و ستدهای مالی ما کاملاً شفاف و روشن است. ما حسابهای مشترک مخصوص به خودمان را داریم که از آنها برای پرداخت سرعت حسابها استفاده می کنیم. و هر یک از ما حسابهای شخصی یا جداگانه نیز داریم که در خصوص آنها هر یک از ما به دقت از میزان موجودی حساب دیگری آگاهیم. ما هرگز در مورد پول با هم جر رو بحث نمی کنیم زیرا هر دو ما مبلغی از پولی را که ماهیان نصیبمان به می شود به خرچ کردن دلخواه اختصاص میدهیم. اینکه همسرم پول خود را صرف چه کاری می کند به خودش مربوط است. و متقابلا اینکه من پول خود را صرف چه می کنم به خودم مربوط است. مواقعی پیش می آید که همسرم با برخی از راه های مخاطره آمیزی که برای خرچ کردن پولم انتخاب می کنم موافق نیست. من بسیار بیشتر از همسرم ریسک پذیر هستم. با این حال ما راجع به این موضوع با هم دعوا می کنیم. زیرا هر یک از ما حجم پول زیادی داریم که جدای از دیگری است و میتوانیم به انتخاب خود با آن بازی کنیم. در جلسه اخیری که با همسر خود داشتم، او به من گفت که قصد دارد به یکی از بستگان خیش کمک مالی کند. وقتی که او وضعیت موجود را توصیف نمود، من به این فکر افتادم که در اینجا توصیفی از سرگذشت آن زن و شوهر را بیاورم. زیرا شرح حال آنها نشان راه دیگری است که بسیاری از افراد موفق از طریق آن به بیراهه رفته یا از مسیر خود منحرف شده و حتی زندگی خود را تباه نمودند. آن زن و شوهر زوجی هستند که یک فرزند دارند. آنها هر دو در کار تجارت هستند و از تجارت موفقیت موفقیت‌آمیزی نیز برخوردارند. بخش نسبتاً زیادی از ارسی که آن زن از خانواده خود دریافت کرده بود، توسط آنها در زمینه تجارت سرمایه گذاری شد و این سرمایه به شرکت آنها کمک کرد تا به میزان قابل ملاحظه‌ای رشد کند. آنها دارای یک خانه بزرگ، دو ماشین قشنگ، فرصتی برای سفر و کلیه مزیت‌های دیگر موفقیت هستند. آن زن حسابدار شرکت است. و های متمادی به نظرش می رسد که میزان قابل توجهی از موجودی شرکت در حال ناپدید شدن است. وقتی که این موضوع را با شوهرش در میان میگذارد شوهرش به او میگوید که راجع به این موضوع اطلاعی ندارد و اینکه کار شوهر تداوم بخشیدن به کسب پول نقد و کار همسر مدیریت آن است. آن زن بالاخره پی میبرد همانطور طور که زنها به طور اجتناب‌ناپذیری پی خواهند برد که شوهرش با زن دیگری رابطه دارد. و اینکه شوهرش در حال تهیه پول برای خرید منزل و سایر وسایلی است که مشوقش به آنها نیاز دارد. باز هم از این بدتر اینکه او با جیب زدن مقدار زیادی پول نقد از شرکت خود و منتقل کردن آن به جای عمد در حسابهای بانکی مخفی خود در سوئیس در حال آماده سازی خود برای جدا شدن احتمالی از همسرش می باشد. وقتی که روز جدا شدن آنها از یکدیگر فرا می رسد، شوهر آن زن ادعا می کند که بجز خانه که مدعی مالکیت آن است، صاحب های بسیار کمی است. او یک وکیل پرخوشگر را به خدمت گرفته و به همین دلیل همسر وی نیز مجبور شده برای دفاع از حقوق خود یک وکیل استخدام کند. مبارزه آنها به تدریج تبدیل به یک جنگ وخیم می شود و طول نمی کشد که آنها بجز از طریق وکلای مدافع خود که به ازای هر دقیقه مداخله مقدار گزافی پول مطالبه میکنند، دیگر حتی با یکدیگر صحبت هم نمی کنند مدافع فوری مداافه فوری صورتحساب صادر می کنند به طوری که اگر آنها کاری را با تلفن در ظرف یک دقیقه انجام دهند صورت حساب را برای یک رب ساعت کار برای افراد میفرستند در نهایت وکلای حقوقی به مقدار پول قابل توجهی می رسند تجارت این زن و شوهر آسیب می درآمد آنها کاهش می آبد و طی نمیکشد که این زن و شوهر هر دو واقعا دچار گرفتاری مالی می شوند. باز هم از این بتر اینکه شوهر این زن هم از پسر خود و هم از همسر قبلی خیش کاملا دلکنده و از آنها جدا شده است. آنها هرگز یکدیگر را نمیبینند او از کلیه لذت و مسئولیت های و خوشنود کننده پدری محروم مانده است. مشکل کار در آنچه که توضیح داده شد چیست؟ این زن و شوهر در یک وضعیت بازنده بازنده به سر میبرند. در موقعیت فعلی تنها وکلا برندند. و آنها به نحو قابل ای برنده هستند چه میشد اگر این زن و شوهر به جای جنگ و دعوا با مشارکت یکدیگر و همراه با صداقت و شفافیت کار می کردند؟ شوهر این زن خیلی زودتر از اینها می توانست برای همسرش فاش کند که با دیگری رابطه دارد آنها می توانستند خیلی زودتر از اینها تصمیم بگیرند که از هم جدا شوند و بدون حضور هیچ وکیلی بنشینند و نگاهی به کلیه های خود بیاندازند و در مورد تقسیم عادلانه آن با هم گفتگو کنند اگر انجام این کار به لحاظ احساسی برایشان مشکل بود میتوانستند از یک فرد میانجی دعوت کنند که کار آنها را راه بیندازد آنها میتوانستند درک کنند و بایستی درک میکردند که حتی اگر از هم جدا شوند همچنان در کسب و کار خود با هم شریک هستند و در امر پرورش فرزند همواره با هم شریک خواهند بود آنها میتوانستند راجع به کلیه گذینه های پیش روی خود در مسیر همکاری تجاریشان با هم گفتگو کنند. برخی از این گزینه‌ها ها عبارت بودند از اینکه آیا امکان دارد که یکی از آنها سهم دیگری را خریداری کند؟ آیا آنها میتوانند به نحوی به کار کردن با یکدیگر ادامه دهند؟ آیا آنها میتوانند کل کسب و کار خود را بفروشند؟ آنها می توانستند اطمینان پیدا کنند که فرزندشان همچنان توسط هر دوی آنها تربیت و حمایت می شود. در جدایی پدر و مادر معمولا بیشترین آسیب را فرزندان میبینند. ولی اگر والدین این موضوع را درک کنند که آنها همواره در قبال فرزند خود مسئولیت قطع نشدنی دارند، این آسیب ممکن است به حداقل برسد. نیازی نیست که بچه‌ها به دنبال جدا شدن پدر و مادرشان یکی از آنها را از دست بدهند. نیازی به تنبیه فرزندانی که والدینشان نمی‌دانند چگونه با هم ارتباط موثری برقرار نمایند وجود ندارد. والدین این فرزند می‌توانستند با نشان دادن صداقت و شفافیت پا بر جای خود، حتی در موقعیت بسیار احساسی جدایی از هم و موقعیت‌های دیگری مانند همکاری تجاری و پرورش فرزند، به یک راه حل برنده برنده دست پیدا کنند. اما عدم صداقت و شفافیت شوهر همه چیز از جمله وضعیت خودش را خراب کرد. این زن و شوهر موجب شدند که وکلایشان به مراتب ثروتمندتر شوند اما خودشان مجبور شدند که تمام خرچ را متحمل گردند. شخص عاقل از خطاها و اشتباهات دیگران درس میگیرد نگاهی به افراد پیرامون خود که میشناسید بیاندازید شما می از موفقیت و شکست های آنها درسهای فراوانی بیاموزید در موردی که بان با اشاره شد می این درس ارزشمند را یاد بگیریم روابط تجاری موفق مانند روابط شخصی بر پایه صداقت، شفافیت و احترام متقابل استوار است. آیا آنچه می‌خوام بگویم برایتان روشن و بدیهی نیست؟ هدف من از این طرف و آن طرف رفتن برای تبلیغ مزایای صداقت، دلسوزی، سازش کردن و سخاوت ورزیدن این نیست که نشان دهم من آدم خوبی هستم و اینها از ویژگیهای افراد فداکار و دلسوزی مانند من است. من این خصوصیات را به این دلیل تبلیغ می کنم که برخورداری از آنها مسلماً بهترین راه برای اداره یک کسب و کار موفق و ساختن یک زندگی ارزا کننده است. من برای دستیابی به اهداف خودخواهانه خود دست و دل باز هستم. این کار را به این دلیل انجام می دهم که به من کمک می کند مراقب خودم باشم. مراقبت از فرد شماره یک یعنی مراقبت از خود اشکالی ندارد و در واقع ضروری است، جای تعجب دارد که بهترین راه برای مراقبت از خود این است که به بهترین شیوه هایی که برایتان ممکن است به دیگران عشق بورزید و به آنها خدمت کنید. راه حل 10 درصدی را برای مسائل شخصی و جهانی بکار بندید. شما قبلا بارها و بارها راجع به این کلید بزرگ موفقیت مطالبی را شنیدید. همه ما این کلید را می‌شناسیم، ولی معلوم نیست که چرا بیشتر ما آن را به حداقل ده درصد از درآمد خود را پسنداز کنید در این کشور افراد معمولی در زندگی کاری خود بیش از یک میلیون دلار درآمد کسب می کنند. این مورد را تصور کنید، اگر میانگین درآمد شما تنها سی هزار دلار در سال باشد، پس از چهل سال صاحب یک میلیون و دویست هزار دلار خواهید شد. اگر شما تنها ده درصد از این پول را پسانداز کنید پس از چهل سال اصل ای به میزان صد و بیست هزار دلار خواهید داشت. در زم در طی چهل سال به سپرده شما سود و بهره و افزایش تدریجی نیز تعلق خواهد گرفت پسنداز کردن 20 درصد از درآمد حتی از این هم بهتر است وقتی که من هنوز کاملا بالغ نشده بودم همسایه دیوار به دیوار ما دارای شغل آزاد نقاشی ساختمان بود ما از این موضوع خبر نداشتیم ولی او هر ماه 20 درصد از درامدی را که به صورت چک حقوقی دریافت می کرد پسنداز می نمود. او در حالی که نسبتا جوان بود، بازنشسته شد. با پول خود یک خانه مسکونی خرید و حاضر شد که با درآمد غیرپویا و پیوسته حاصل از سهامها و اوراق قرضه خود به زندگی ادامه دهد. پس انداز ده تا بیست درصدی درآمد خود را به عنوان یک هدف قرار دهید و اگر مقداری درآمد غیر منتظره، پرداخت پرداخت‌های اضافی، حق امتیازها، پول‌های بازداورده، پاداش‌ها یا ارسیاها از جای دریافت کردید، درصد آن را پس انداز از پس های خود در وهله اول برای پرداخت بدهی کارت های اعتباری خود و سپس برای خرید اولین خانه و سپس برای بر راه انداختن مجموعی متنوع از ها در زمینه اوراق بهادار، اوراق قرضه و در نهایت اگر خیلی مایل بودید گذاری اضافی در زمینه خرید املاک به منظور کسب درآمد از اجاره آنها استفاده کنید. با افزایش دادن مرتب سرمایه های خود مجبات حفظ رشد آنها را فراهم کنید حتی اگر شما تنها ده درصد از درامد خود را پسانداز کنید مبلغ پسانداز شما به سرعت تبدیل به میزان پول قابل توجهی خواهد شد سپس جادوی بهره مرکب اتفاق میافتد و آن پول کم به تنهایی شروع به تولید پول قابل توجهی خواهد نمود شما اکنون از یک درآمد غیرپویا برخوردارید بدون هیچ تلاشی پول در میآورید که این بهترین راه کسب درآمد برای افراد دارای تیپ شخصیتی یه یعنی به شدت تنبل است شما با پسند از عادی پول خود می توانید به یک جادوگر پول تبدیل شوید راه حل ده درصدی را می توان از یک وجه دیگر نیز تحقق بخشید این راه حل را نیز صدها بار شنیدید حداقل ده درصد درآمد خود را ببخشید و به این ترتیب اوضاع زندگی خود و جهان را بهبود خواهید بخشید. من بار دیگر تاکید می کنم بخشنده بودن من نه به خاطر پاکی قلبم است بلکه به این دلیل است که می دانم بخشنده بودن بهترین راه برای زندگی کردن و خلق موفقیت در زندگی است. بخشنده بودن ما نه تنها موجب کمک به دیگران می شود بلکه به خودمان نیز کمک می کند که رشد کنیم. و حتی در زندگی خیش موفق تر گردیم. بخشنده بودن به انسان قدرت تولید کنندگی می دهد. در واقع هر دو لغت بخشندگی و تولید کردن از واژه ریشه یکسانی نشأت گرفتند. واژه جینس که در لاتین به معنی رشد کردن و تشکیل خانواده دادن می باشد. بخشنده بودن به معنی تولید انرژی بیپایان سازنده است. این همان انرژی است که به سوی شما برمیگردد و از شما حمایت می کند. و از راه های بیشمار به سعادت و رفاه شما کمک می کند. نویسنده به نام چارلز کلتون نقل قول عالی و دورندیشانه را عرض داشته که در میان مردم رواج یافته است. اگر نیکوکاری در جهان شایع می زمین تبدیل به بهشت شده و جهنم چیزی جز افسانه ساختگی نبود. اینها سخنان خردمندانه ای هستند. آیا اینطور نیست؟ اگر همه ما به نیکوکاری عادت می کردیم، زمین تبدیل به بهشت میشد هرچه که تعداد بیشتر و بیشتری از ما از تشکیلات ارزشمندی که در راه هدف شایسته کار می کنند پشتیبانی کنیم جهان بیش از پیش تبدیل به جهانی می شود که برای کلیه ساکنین خود کار می کند آسان ترین راهی که من برای پسنداز کردن و هدیه دادن پول خود پیدا کردم عبارت از باز کردن سه حساب جاری است برای این منظور درآمد خود را در حساب سپرده معمولی خود قرار دهید. سپس به شکل فوری حداقل ده درصد از آن را به حساب پسانداز و ده درصد دیگر از آن را به حساب هدیه منتقل کنید. فقط شاهد باشید که به محض اینکه به روشنی در ذهنتان گذاری می کنید که باز کردن این حساب ها یک اولویت در زندگیتان است و اینکه باز کردن حساب جداگانه برای پسنداز کردن و هدیه دادن پول کمک بزرگی به دیگران و خودتان می باشد متوجه خواهید شد که کاملا قادر به زندگی کردن با 80 درصد از درآمدتان میباشید. قبل از اینکه شما واقعا و از عمق درون خود این اولویت را درک کنید ممکن است دوچار لغزش ها و خطاهای جزئی شوید که مانع از درک درست شما از آن گردند با این حال شما به طور علنی به ذهن ناخداگاه و به شدت خلاق خود گفته اید که پسنداز کردن و هدیه دادن از اولویت های زندگیتان است. در این صورت، زمیر ناخداگاهتان نیز با شما موافقت می کند و به دقت به شما نشان می که چگونه به آسانی و بدون صرف تلاش به این اولویت ها رسیدگی کنید. برخی از اقدامات شما در این راه ممکن است شامل پیدا کردن جریان های درآمدی جدید یا ساده سازی زندگیتان از برخی لحاظ و کاهش هزینه زندگی باشد. ده درصد از درامدتان را پسنداز و ده درصد آن را ببخشید. به این ترتیب شما در راه رسیدن به استقلال مالی گام برمی دارید و در مسیر راه خود می توانید به دیگران کمک مالی کنید. فقط در ذهن خود مجسم کنید شما به جای اینکه به طور ناخوشاگاه بخشی از مسئله باشید، به طور آگاهانه به بخشی از راه حل تبدیل شده اید. به شما تبریک می گویم. از دور مسابقه شغلی خارج شوید و راحت باشید. در اینجا سوال مهمی وجود دارد که باید برای شما مطرح شود. شما چگونه می توانید راحت و آسوده باشید و همچنان با موفقیت به انجام کاری که دوست دارید بپردازید؟ چرا اینگونه به قضیه نگاه نمی کنید؟ همه ای ما در سن مشخصی می خواهیم از دور مسابقه شغلی خارج شویم. از کار پرزحمت دست بکشیم و زندگی را به خود سخت نگیریم. من که یک فرد دارای تیپ شخصیتی یه هستم، در تمام طول عمر خود خواستم که زندگی را سخت نگیرم اکنون که اواخر سالهای پنجم زندگی خود را سپری می کنم در سنی هستم که بیشتر مردم با من هم عقیده خواهند بود که زمان بیشتر استراحت کردن برای من فرا رسیده است هرچند که حتی در تمام طول سالهای دهه دهی بیستم و سیم زندگیم هم نیز همواره ندایی در وجود من زمزمه می کرد و از من میخواست راحت باشم و کمتر فعالیت کنم و به طور دائم بان با سختی کار نکنم من می‌خواستم با راحتی و فراغ بال کارها را انجام دهم. حقیقت این امر در لحظه‌ای که برای اولین بار به چشمنداز آرمانی خود فکر کردم برایم آشکار شد و در یک زمانی از طول عمر خود شروع به مشاهده این موضوع کردم که برخورداری از راحتی و فراغ بال در زندگیم به هیچ وجه بستگی به شرایط بیرونی ندارد بلکه یک امر درونی است. پیدا کردن راحتی که طالب آن بودم دست خودم بود. راحت بودن هرگز چیزی نخواهد بود که برای رسیدن به آن نیاز به انجام کارهای لزومن عجیب و غریبی مانند افزایش درآمد به یک سطح مشخص یا خریدن خانه رویایی یا داشتن همسر آرمانی و دونیم بچه در جهان داشته باشد. برخورداری از راحتی و فراغت بال در زندگی یک امر درونی است. درک این موضوع کارها را بسیار آسانتر می کند. آیا اینطور نیست؟ قبل از آن که ما بتوانیم در سرتاسر سر روز احساس راحتی کنیم، مجبور نیستیم کار دیگری در جهان انجام دهیم. ما در لحظه فعلی و قبل از آن که بتوانیم زندگی راحت و با فراغ بالی داشته باشیم، نیاز به چیز دیگری نداریم. مسابقه شغلی کاملا ساخته و پرداخته ذهن ماست. چرا اینگونه به قضیه نگاه نمی‌کنید؟ مفهوم مسابقه شغلی را خود ما ایجاد کرده‌ایم. مسابقه شغلی کاملا ساخته و پرداخته ذهن خود ماست. ما معمولاً خودمان به شکل ناخودآگاه برای خودمان استرس ایجاد می‌کنیم. تمام آنچه که برای رفع این استرس لازم است انجام دهیم کمی کار درونی است. بنابراین، بیایید تصمیم بگیریم که از دور مسابقه شغلی خارج شویم و زندگی همراه با راحتی و آسایش بیشتری را اختیار کنیم. ما می‌توانیم این کار را در هر زمانی و در هر سنی انجام دهیم. بنابراین، شما نیز ممکن است تصمیم بگیرید همین حالا از دور مسابقه شغلی خارج شوید. چرا این کار را نکنید به شما تبریک میگویم شما تصمیم گرفته اید زندگی پرسترس را رها کرده و در عوض اید راحت باشید و زندگی لذت ببرید و تا جایی که ممکن است هر کاری را که دوست دارید انجام دهید فوق است خودتان را برای دست کشیدن از کار در سن جوانی فلان سالگی تحسین کنید تنها با گرفتن این تصمیم درونی شاهد خواهید بود که دنیای بیرونی از شما پیروی خواهد کرد این باور درونی را که اهداف شما به شکل ساده و راحت و به شیوهی سالم و سازنده توسط شما در حال برآورده شدن هستند، بارها مورد تاکید قرار دهید و به این ترتیب شاهد ایجاد تغییرات بزرگی در دنیای بیرون خود خواهید بود. ممکن است تمام اهداف و آرزوهای شما تحقق پیدا نکنند. من در طی سالها بر روی اهداف و آرزوهای بسیار بسیار زیادی تحکید کردم که تحقق پیدا نکردند با این حال برخی از آنها محقق شدند یا به زودی محقق میشوند. در واقع وقتی که راجع به این مسئله فکر می کنم متوجه می شدم آن اهدافی برایم محقق شدند که برایم آرمانی بودند. این موضوع به طور قطع یک کلید فوق‌العاده است. سرانجام آن دست از اهداف و آرزوهای شما که برایتان آرمانی هستند تحقق پیدا خواهند کرد. بزرگ آرزو کنید. اگر مایل بودید در چند بعد مختلف آرزو کنید. برخی از آرزوهای شما که برایتان آرمانی هستند تحقق خواهند یافت. اگر خدا بخواهد به طور قط اینگونه خواهد شد. عشق بورزید خدمت کنید و به یاد داشته باشید. من دوستی در شهر بولدر واقع در ایالت کلورادو دارم که برای دو نفر کار میکند که این دو نفر سر و کارشون با پول و سرمایهگذاری به شیوه است. که حتی وقتی دوستم با دقت سعی کند آن شیوه ها و آنچه که آنها در کل روز انجام می دهند برایم توضیح دهد از آنها نمیتوانم سر در بیاورم. اما من یک چیز بسیار مهم را از او یاد گرفتم. او یک بار به من گفت که عاشق کار کردن در آنجاست. زیرا صاحبان شرکت آنها یک هدف اصلی را در کارشان دنبال می کنند و آن این است که آنها فقط میخواهند توسط روح هدایت شوند. من هر روز صبح که از خانه زیبای خود خارج می شوم، اول از همه به مدت چند لحظه فقط ذهن خود را ساکت می کنم. سپس کمی دعای شکرگزاری با خود زمزمه می کنم. همیشه سعی می کنم در دعای خود با آن دسته از نعمت های الهی که قبلا به حساب نیاورده ام اشاره کنم. زیرا فهرستی که بابت آنها سپاس گذارم، از قبیل هر ابر موجود در آسمان، هر جیرجیرک، و هر پهنای برگ موجود در جهان و تنوع تکامل پایان ناپذیر خود زندگی نامحدود است. من خواستار هدایت شدن توسط روح می شدم و سپس ذهن خود را دوباره ساکت می کنم و به این ترتیب روح صحبت می کند. آنچه روح می گوید تقریبا همواره یکیست: عشق ببرزید، خدمت کنید و به یاد داشته باشید چه مطلبی را به یاد داشته باشیم؟ یادتان باشد که چه کسی هستید. شما یک موجود روحانی هستید که از تجربه جسمانی حضور در این جهان برخوردارید. اتصال خود به روح را همواره به یاد داشته باشید. راحت باشید. نفس عمیق بکشید. شما توسط روح هدایت میشوید. یادتان باشد که به دیگران خدمت کنید. بخشی از شعر زیبای تاگر را که در اینجا آمده به یاد داشته باشید. من خوابیدم. و در خواب دیدم که زندگی کردن یعنی لذت بردن از خواب بیدار شدم و دریافتم که زندگی کردن یعنی خدمت کردن خدمت کردم و بنگر که چه شد خدمت برایم تبدیل به لذت شد مهمتر از همه این که یادتون باشد همدیگر را دوست بدارید زیرا دوست داشتن یکدیگر ترین چیزی است که در آموزه های دینی بان اشاره شده است قانون جدیدی به شما تقدیم می شود و آن این است که یکدیگر را دوست بدارید. همسایه که خود را دوست بدارید. حتی دشمنان خود را دوست بدارید. همه را دوست داشته باشید و از سر تخصیرات همه درگذرید زیرا آنها نمی دانند که چه می کنند. به خصوص اینکه خالق خود را هر طور که مایلید بابت تشکر از نیروهای عظیم و رمزالودی که به واسطه آنها شما و جهان هستی را به وجود آورد دوست بدارید. رامانا ماهارشی که یکی از بزرگترین چراغهای هدایت جهان در قرن اخیر است، جمله را بیان کرده که به اعتقاد من شاید ژرفترین و مهمترین جمله بینظیری باشد که تا کنون توسط یک انسان بیان شده است. پایان هر عقل و خردی اشق است و عشق است و اشق. به همه انسانها و به کل بشریت که شامل خودتان هم می شود، بورزید و خدمت کنید. به کره زمین که مادرتان است و به طبیعت وحشی عشق بورزید و خدمت کنید. به خدای درون خود عشق بورزید و خدمت کنید. خدای درونتان به همون شکلی که کهکشان که ها را هدایت می کند در حال هدایت شماست. وقتی که هدف شما عشق ورزیدن و خدمت کردن باشد، هر تصمیمی را به ای می گیرید که بیشترین سود را برای همگان به دنبال داشته باشد. با دنبال کردن این هدف شما به شکل ساده و راحت و به شیوه سالم و سازنده در بهترین زمان خاص خود و به گونه ای که بیشترین سود را برای همگان به دنبال داشته باشد نه تنها به سوی بزرگترین موفقیت قابل تصور بلکه به سوی رضایت بخشترین و خوشنود کننده ترین زندگی ممکن هدایت می شوید. مهمترین کلیدهای موفقیت در کار زندگیتان را می توان در این چند واژه اثر گذار که قادر به تغییر زندگی افراد است خلاصه نمود. عشق بورزید و خدمت کنید. این واجه ها را به یاد داشته باشید و به این ترتیب همواره در راه درست باقی خواهید ماند. <smart> o <noise>